يُمَنِّعُ لِيَوْمٍ وَرَبَأْسًا شَدِيدًا مِلَّتُهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ما كفِينَا فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله الذي قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کلمتا تخرج من افواهیم این یقولون الا کذبا سوره مبارکی کهف هست سوره کهف از سوره های مکی قرآن مجید هست از نظر ترتیب 69 نهمین. سوره هست که بر آن حضرت صلی علیه و وسلم نازل شد مناسبت این سوره با سوره گزشت این هست که در سوره گذشته در سوره بنی اسرائیل در ارتباط با معجزات که اونها معجزات را مطالبه میکردند پاسخ داده شد الله تعالی بعضی از معجزات را بیان فرمودند یکی از معجزات اسرا و معراج بود و معجزه بزرگتر و مهمتر قرآن بود که در سوره بنی اسرائیل درباره قرآن و فضیلت قرآن و تحدي و به بمبارزه طلبیدن برای اینکه مقابل بکنم با قرآن آیات زیادی خاندیم. اما الان در سوره کف بعضی از شبهات اونها و اشکالات اونها پاسخ داده میشه، جواب داده میشه تا اینکه ہی جای ہے و هیچ جای شک باقی نماند. مشرکین همواره شبهاتی را وارد می کردند یکی از سردمداران مشرکین به نام نظر ابن حارس همیشه می گفت می گفت این قرآن داستان بیان می کنه افسانه بیان می کنه من هم در مقابل این قرآن داستان بیان می کنم لذا نظر ابن حارس داستانهای از فارس و رومی آن زمان داستانها و های قدیمی را در مقابل قصص قرآن بیان می کرد که قصص قرآن شما داستان زیاد خاندید در قرآن همیش از اول تا آخر عبرتند موعظه هستند درس هستند پند هستند اما اون داستانهایی که اونها بیان می کردند همه داستانهای پوچ وایی. داستانهایی که هیچ نفعی و هیچ خیری در اون داستانها نبود لذا وقتی که از این طریق موفق نشدند مجبور شدند به روش دیگری متوسل بشند به راه دیگری متوسل بشند لذا چند نفر از سران قریش از بزرگان قریش یکی همین نظر ابن حارث بود یکی عقبای ابن ابی معیط بود و چند تا دیگه از سرداران از مکه سفر کردن رفتن به مدینه پیش یهودیها رفتند با یهودیها گفتن که روز به روز مسئله اسلام داره به پیش میره روز به روز تعداد مسلمانان بیشتر میشه روز به روز افراد بیشتری از قرآن متاثر میشند ما چکار کنیم کہ جلوی انها را بگیریم او گفت کے سوالات کہ سوالاتی هستند کہ این سوالات را هیچ کسی نمی جواب بده. اگر ای ایشون جواب دادن پیغمبر خداست اما اگر جواب نداد که قطعا جواب نمی معلوم میشه که کہ از خود می بافه و درست میکنه. چند تا سوال بودند یکی از اون سوالات درباره روح که در, در سوره بنی اسرائیل شما خاندید که روح چیه حقیقت روح چیه عمو که اونجا ارز کردم حقیقت روح را بغیر از خدا هیچ کی نمیدونه اگر کسی جواب داد که روح حقیقتش چیه فلان پس معلوم میشه از خود میگه و الا خدا به کسی نگفتیم پس وقتی که از رسول الله پرسیدم قرآن جواب داد قل روح من امر ربی روح امر رب من هست یعنی جوابی دیگه نداد سآل دوم گفتند بپرسید که اون جوانان جوانانی که رفتند به غار پناه بردند این جوانان چند سال اونجا در غار بودند و چند سال در غار خوابیدند. این یک جریان گمنامی بود که کسی خبر نداشت خب اگر ایشون جواب داد قطعا پیغمبر خدا است حتما خدا براش جواب داده و سومین سوال در باره اون کسی که از مشرق تا مغرب همه دنیا رفت کرد و بر همه دنیا حکومت کرد اون کیه و کجا کجا رفت چه فتوحاتی داشت در باره اون فرد بپرسید وقتی که این سؤالات را مطرح کردند گرچه با تأخیر شد اما این سوره مبارکه نازل شد سوره مبارکه کهف در سوره مبارکه کهف الله عزوجل جواب دادند پس این جواب مشرکین بود جواب وقتی که درست بود انها هم متوجه شدن یهودی ها دیگه سکروت کردن جای اینکه ایمان بیاورند متاسفان ایمان نیاوردن چون تعصب وقتی که بیاد انسان واقعیت رب بفهمد هم ایمان نمیاره اما ایک اشکالات دیگری هم هست که همه اون اشکالات در این سوره جواب داده شدن اشکالات از بعد توحید این سوالات که ارز کردم از بعد رسالت و حقانیت پیامبری رسول الله بود اما اشکالاتی که از بعد توحید بود این بود که شما میگید بغیر از خدا هیچ کسی قدرت خدایی نداره در حالی که این هفت نفر اولیاء خدا بودند دوستان خدا بود اولیاء الله بودند اینها سیصد سال خوابیدند تو غار معلوم میشه که نه بشر نبودند فوق بشر بودند اینها قدرت خدایی داشتند به همین خاطر مشرکین مکه گاه گاهی که خیراتی نظری نیازی میکردند هفت تا نان روغنی درست میکردند میپختند به نام هفت نفر غار هفت جوانی که در غار بودند به نام اونها نظر و نیاز می کردند و سؤال دیگر و اشکال دیگر این بود که حضرت خیزر وقتی که موسی با او همراه شد پیشاپیش پیش می دانست که چه خبر است این کشتی را چرا شکست می جلوتر است بازرسی هست بچه را چه کشت, کشت میدونست آینده ایش چی میشه بس خیزر علم غیب داره این یکی از صفات خدای تعالی است در این سوره خدای تعالی جواب داد و دیگه اینکه که که از مشرق تا مغرب تمام جهان رفت کرد و بر تمام جهان حکومت کرد اون این قدرتش قدرتی در حد و بساط انسان نبود بالاتر از قدرت انسان و معلوم میشه که قدرت خدایی داشت الله تعالی اینجا جواب میده که ما هر چیزی را به بغضل کرنین دادیم و آتینا همین کلشای انسببا على ای حال این جوابها را همون جمعی خانیم خلاصی این سوالات اینه که خیلی چیزا هستن که قدرتشون فوق قدرت بشر است الله تعالی جواب میده که اگر کسی کرامت داشته باشه معجزه ای داشته باشه چنین حرکتی داشته باشه ما ایم که به امیدیم اون خودش در وجود خودش ذاتن چیزی ندارد لذا این شبهات در سوره مبارکه کهف پاسخ داده می شوند اما آغاز میشه سوره با کلمه الحمدلله این بخش سوم قرآن مجید از ربط دیگر اینه که قبلا ما خاندیم حضرت شیخ حسین علی رحمه الله بنقل از امام ربانی و امام ربانی بنقل از سیدنا علی میگویند که قرآن مجید چهار بخش است بخش اولش از کنم که خالقیت هست که ما در بخش از الحمدلله رب العالمین از سور شروع میشه و در بخش دوم که از سوره انعام شروع میشه بحث ربوبیت است همونطور که خالق الله است رب هم الله است شما را پرورش دهنده هم الله عزوجل است و از بخش سوم از سوره کهف شروع میشه تا سوره سبا که در این بخش بیان میشه که تدبیر و تصرف هم به دست خداست مالکیت یعنی پادشاه مطلق الله است متصرف الله است مدیریت تمام این جهان به دست خدا است مدیریت جهان به دست کسی دیگه نیست بعضی ادعا کنند نیست به دست الله عزوجل هست الله فقط مدیر هست مدبر هست متصرف هست مختار هست این در این بخش بیشتر خانده میشه تا سوره سبا اغاز می شب الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب تمام مدحصنا تمام تعریف و اون صفاتی که مخصوص الوهیت هستن اون صفات جمع شدن در الله اختصاص به الله دارند الذی انزل علی عبده الكتاب ان اللهی کے بر بنده خاصش محمد صلی الله علیه و وسلم کتاب را نازل فرمود قرآن را بر محمد نازل فرمود رسول الله صلی الله علیه و وسلم بالاترین رتبه را در میان خلائق خدا دارد از همه انسان ها جنات انبیا فرشتگان از همه بالاتر است اما صفتش عبد خدا است اشهد ان محمدا عبده و رسول انجام الله می فرمد نازل کرد کتاب را بر بنداش ولم یجعل له عوجا و در این کتاب هیچ نو کجی قرار نداد نه لفظی نا معنوی شفاف واضح و مطالبش روشن هست قیمن چنان کتابی هست که مضبوط محکم هست یعنی قابل نسخ نیست قابل تغییر نیست لینذر بأسا شدیدا من لدن و یبشر المؤمنین ببینی وظیفه رسول الله به وسیله قرآن دو چیز است یکی انذار بیمدادان ترسندن کسانی که قرآن را قبول نمی کنند کسانی که مطالب قرآن را قبول نمی کنند انها را می هم از عذاب در دنیا هم از عذاب در آخرت و کسانی که مثل شما مومینین ایمان می آورند، اونها را بشارت میده، اونها را خوش خبری میده، اما تنها ایمان کافی نیست، کسانی که ایمان می آورند، و به دنبال ایمان عمل صالح انجام میدن. الله می‌فرماید: لیُنْذِ رَبَّ سَنْشَدِيَّ مِلْلَدُنَ تاکہ بی از جنگ شدید یا از عذاب شدیدی کے ملد از جانب اللہ منکرین را بترساند و یبشر المؤمنین و خوش خبری بده مؤمنین را الذين يعملون الصالحات آن مؤمنین که عمل صالح انجام می‌دهند آنها را خوش خبری بده به بی اینکه ان لهم اجرا حسنا این برای آنان اجر حسن هست پاداش بسیار نیک هست این اجر حسن و پاداش نیک هم رضایت خداوند است و هم بهشت خداوند خدا نصیب بگرداند مؤمنین را به این اجر نیکو خوشخبری میدهد. چند سال بنا هست در اون اجر بمانند در اون بهشتی که قرار است 4 سال است ده سال است دوره چند ساله هست. الله میفرماید ما کسی نفیه فیه ماندگار هستند میمانند در اون اجر حسن در اون بهشت به صورت ابد میمانند به صورت همیشه در اون میمانند وینذر الذین قالوا تخذ الله ولدا و بعد گفتیم که بترساند از عذاب خدا کی را بترساند مشرکین را بترساند اونهایی که میگن خدا فرزند دارد اونهایی که میگن خدا نائب دارد اونهایی که میگن خدا برای خودش ولیعهد گرفته برای خودش جانشین گرفته وینذرلذین بیتسانات اونهایی را که قالو گفتند اتخذ الله ولدا الله بعضی از مخلوقات را به عنوان فرزند انتخاب کرده مثل عیسی مثل اوزیر مثل دیگران فرزند چرا به خاطر اینکه نائب خدا بشند این کسی که این حرف را میزنه اون بیچاره جاهل است الله میفرماید ما لهم بهی من علم در این چیز برای اونها هیچ علم و دانشی نیست از روی نادانی حرف میزنند از روی جهل حرف می زنن نه خودشون نسبت به این علم دارند ولا لآبائهم و برای پدرانشان علمی هست یعنی هم پدر جاهل هم جد جاهل هم خود پسر جاهل که اینها برای خدا چنین نسبت های ناروا را نسبت می‌دهند کبرت کلمتا تخرج من افواههم الله می فرماید سنگین است این کلمه‌ای که از دهانشون خارج میشه همین که برای خدا پسر یا دختر یا نائب تعین می این کلمه سنگینی هست سنگینی این کلمه را خودشون نمیدانند خودشون پی نبردند این یقولون الا کذبا علاوه از اینکه سنگین است این ها مگر دروغ میگویند این دروغی که دارم به خدا نسبت میدن خدای عز و جل لم یلد و لم یولد هست نفرزند دارم از او متولش شده و نه خداوند از کسی متولش شده و خدای عزوجل الله سمد هست بی نیاز هست نیازی نداره نائب بگیرد برای خودش پادشاهان نیاز دارن نیاز به وزیر داره نیاز به وزارات در قسمت های مختلف داره در بخش های مختلف در بخش اقتصاد در بخش بازرگانی در بخش کشاورزی در بخش ورزش در بخش از کنم هر بخشی درمان بهداشت ولی خدای عزوجل هیچ نیازی بنایب ندارے اللہ بھی نیاز است چرا خدا را می کنی با پادشاہی پادشاهی که سر تاپا محتاج سر تاپا جہلے نمی دانے اللہ تعالی هم قدرت داره هم علم داره هم نیاز ندارے لذا این یقولون الا کذب اینها نمیگوین به زبانشون به دهانشون مگر دروغ را جاری می کنند الله بینیاز هست است فلعلک باخع النفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسف الله تعالی اینج کلمه ترحم بر پیامبرش بیان میکنه این لعلک برای ترجینیس برای شفقت است کلمه مهربانی هست کلمه شفقت است از خدای این اِنایت داشته باشید که رسول الله صلی الله علیه و یکی از اون انسان های دل بود که مثل ایشون دلسوز و خیر خوا پیدا نشد اینقدر حریص بود که مردم ایمان بیاورند اینقدر دلش میخواست که مسلمانان بیشتر بشن این سرداران که ایمان نمی آوردن آن حضرت حرص می خورد آن حضرت تلاش می کرد کوشش می کرد الله تعالی را اینجا ترحوم می آید بر پیانبرش میگه گه ای من شما خودت را به حلاکت می دی به کشتن می دی به تعبیری ما شما خودت را از بین می بری از بین بردی به خاطر اینکه ایمان نمی آورند شرا تو جوش نزند تو ناراحت نباش تو فقط تبلیغ را بکن هر کسی امام میارد امام بیارد هر کسی نمیارد نمی بزار تو خودت را نگران نکن تو خودت را از بین نبر معلوم میشه که خیلی بر آن حضرت سخت بود مریض میشد رسول الله غمگین میشد شب و روزش تلخ میشد الله میفرماد فلا علّك باقی نفسك على آثارهم شما خودت را به هلاکت می دی نفست را کشتن و به از بردن می دی الا آثارهم پشت سر این مشرکان الا ای یؤمنو اگر اینها ایمان نیاورند اینها کیمان کی نیاورم به از الحدیث به این سخن به قرآن ایمان نیا نمی شما خودت را هلاکت می کنی اسفاً از روی تاسف از بس که حسرت می تأصف میخوری خودت را میخوای از بین ببری نگران نباش ناراحت نباش بذار اونها را به حال خودت معلوم میشه که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیلی جوش میزد در باره پیانبر در باره سیما و چهره رسول الله در حدیث وقتی که تعریف میکنند در حدیث میاد که کان صلی الله علیه و سلم متواصل الاحزان احزان جمع حزن است یعنی پیابه پی غم بر چهره آن حضرت نمایان بود همیش مغموم همیش پریشان همیش نگران از چی پریشان بود از این که مردم ایمان نمی آورند از این که مردم دعوت حق را لبیک نمی گویند از اینکه مردم دارن با این انکار و کفرشون به سوی جهنم میروند عزیزان اگر ما راستین الراستین حضرت صلی الله عليه و وسلم باشیم باید این احساس و این درد در وجود ما باشد وقتی میبینیم انسان ها به سمت گمراهی میروند انسان ها به سمت می میروند ما باید آرامش داشته باشیم. ما باید راحت نخوابیم راحت نگیریم و به تفریحات و لذات خودمون مشغول نباشیم کار کنیم فعالیت کنیم تلاش کنیم با زبانمون با تشکیل شدن حتی از طریق این فضای مجازی با مال به هر صورتی شده کمک کنیم تا مردم به سوی ایمان الله تعالی به این از پیغمبرش ذکر میکنه که شما می خودت نابود کنی در آیه دیگه است لعلك باشع النفسک الا یکون مؤمنین تو خودت را از بین بردی به خاطر اینکه ایمان نمی چرا شو پیشاری فقط وظیفه خودت را انجام بده تبلیغ کن بس لذا الله می فرماید اِنَّا جعلنا مَا عَلَى الأرض زِيْنَةً این علت انکار است علت انکار منکرین چرا منکرین انکار می کنند چرا نمی پذیرند چرا قبول نمی چونکه در دنیا خدا تعالی زمین را چنان زینت و ذرق و برق داده چنان کشش داده تجملات دنیا چنان زیبا و جذاب هستند که اینها دل از دنیا نمی کنند دلشون را از دنیا سرد نمی کنند به دنیا دل بستند خب دین و دنیا یکی میشه دیگه رضا الله میفرماید اِنَّا جعلنا ما عَلَى الارض زِيْنَةً همانا ما قرار دادیم آنچه که بر زمین از زینت زیبائی ظاهری زینت الله برای زمین زینتا لنبلوهم ایوهم احسن و عملا تاکی بیازمائیم انسانها را که کدوم ایک عملشن تر است آیا بسوی خدا توجه می کنن یا بسوی تجملات آیا خدا را راضی می کنن یا ہوائی نفس و خواهشات نفس را نفس تمایل دار بسوی تجملات بسیو این لذات البته تمام متاع دنیا حرام نیستند اونی که از طریق حلال باشد درست است اما نبی حدیکه انسان را از مسیر خدا از مسیر طاعت و بندگی جلوگیری بکند اگر مانع دین ما باشه مانع عبادت ما باشه اون وقت بدبختی است و انا لجاعلون ما عليها سعیدا جرزا اللہ می فرمائے ان دنیا یہ ان تور زینت دار ہے زرق برق دار ہے ایک روز همین دنیا چی میشه تبدیل ب ایک میدان صاف و بیاب و علف میشه ان زمین با ان زیبائی ہاش کہ انسان ہر قسمتش را نگاہ میکنه ہر جباغاتش جب را نگاہ میکنه کہ اشتزار ہاش را نگاہ میکنه جنگل را نگاہ میکنه انسان لذت میبره بر استماشا کردن هر جا سبزی و درخت و بلبل هست و چچه هست و یک مناظر عجیبی در دنیا هست همین زیبایی ها همین مناظر زیبا الله می فرماید یک روزیمیت که و انا لجاعلون ما عليها ما غرار میدیم هر چیزی که روی این زمین هست سعیدا جرزا سعید یعنی خاک خالی زمین صاف میدان صاف جرزا یعنی بی آب و گیا هیچ اثری از سبزی نیست همه جا خشک همه جا نابود شده همه جا از بین رفته لذا الله تعالی می فرماید هایی که دل بستند بدونند این یک روزی پایان ادارت تمام ادارت ام حسبت ان اصحاب الکحف از اینجا اون شبه جواب دادی میشه. الله تعالی می فرماید آیا شما می که اصحاب الکحف ام حسبت ان اصحاب الکحف شما فکر می کنی؟ اصحاب کهف و اصحاب رقیم از آیات عجیب ما هستند از نشانات قدرت بسیار بزرگ هستند ببینید اینکه اصحاب کهف سی سال اونجا خوابید، آیا این رشما از آیات بزرگ میدانید شک نیست که این یکی از دلائل قدرت پروردگار است اما خدای طالب آیات و دلائل بزرگتر از اینها هم دارد انسان به اونها فکر نمی کند همین آسمان را اگر ما یک سات بشینیم درباره آسمان فکر بکنیم به این نتیجه می رسیم یکی از آیات است یکی از قدرت های بزرگ همین ستاره‌ها من در کردم که اگر نورفکن برج خلیفه تا سی کیلومتر نورش می تمام دنیا تعجب میکنه و تمام دنیا فیلم و عکس می گیره اما چرا دنیا تعجب نمیکنه این درخشندگی که ستارها دارند این زیبایی که این های خدایی دارند که اونم نور از خودشون نیست نور را از خورشید می گیرند و مثل نورفکن از خدا می چندین میلیون کیلومتر از اونجا اینجا زمین ما روشن می کنند. از اونجا شعایشون میاد و چنان خود خورشید را نگاه کنید چنان وقتی که طلوع می کند چنان روشن می کند تمام عالم را تمام کرات را زمین یک کره کوچیک است کرات دیگر در مقابل زمین خیلی بزرگترند البته اکثرشون بزرگ کوچکتر از زمین هم داریم. تمام اینها همین خورشید چطور روشن می کند؟ این آیات را شما نمی بینید؟ همین که هفت نفر خوابیدن سی سال خواب رفتن، این برای شما عجیبه الله تعالی اینجا گویا مارا دعوت میده که شما بغیر از این آیه بغیر از این علامتی که دال بر قدرت رب العالمین است، شما به آیات دیگری من توجه کنید ام حسبت ان اصحاب الكهف، ایو شما می پندارید که اصحاب کحف و اصحاب الرقیم کانو من آیاتنا عجبا از آیات عجیب ما هستند نه بقیه آیات الهی از این بزرگتر هستند از این عظیمتر هستند بعضی از آیات که ما هنوز نمی فهمیم متوجه نیستیم اگر در این دنیا برای ما تعریف بشه درک نمی کنیم اقل ما کتاتر است گاهی در روایت ها در باره عرش می آید در کرسی می آید در باره لوح محفوظ می آید انسان تعجب میکنه، انسان آخر اقلش تعطیل میشه، مغزش به بمبست میرسه نمیفهمه یعنی چی رسال الله تعالی آیات زیادی دارد عجیب تر از این اما اینها را چرا میگه اصحاب کهف و اصحاب رقیم کهف به معنی غار هست الكهف النقب المتصع في الجبل در کوه وقتی که یک سوراخی باشه سوراخی وسیع باشه که شما میتونید داخلش بره و باز تهش وسیع باشه اون را کهف میگویند اما رقیم معنی اشیه در بار رقیم اختلاف است بعضی میگن که رقیم از رقم است رقم به من نوشتن مرقوم چیز نوشته شده را میگن. اینها را اصحاب رقیم میگویند به این دلیل که بعد از این که پادشاه اون زمان پی برد که اینها زنده هستند و رفتن به استقبال اینها اینها بعدا دوباره تو غار رفتن وفات کردند، پادشاه تابلوی بر غار نسب کرد که در اون تابلو اسامی این اولیاء الله نوشته شده بود به این خاطر اینها را میگه اصحاب الرقیم رقیم یعنی نوشته شده تابلو این یک قول هست قول دوم قوی تر است قول دوم چیه رقیم نام شهری هست که اینها مال اون شهر بودند اینها باشندگان اون شهر بودند به این خاطر اینها را میگه اصحاب الرقیم یعنی اهل الرقیم پس اینها اصحاب کهف هستند چون که داخل کهف رفتند اصحاب الرقیم هستند چون مال شهر رقیم هستند رقیم شهری بود نزدیک شهر ایله ایله روم که امروزه به این شهر میگم پیترا یا بترا اونجا یک شهری البته چندتا قول در این رابطه هست من خدمت شما سه قول میگم خیلی قول مفسرین گه تو تفسیرا انسان گم میشه از بس که اقوال متفاوته این نکته را هم اول خدمت شما عرض بکنم چرا اقوال متفاوته چو خدای عزوجل نمیخواد مشخص بکنه این شعر کجا بود تاریخ کی بود شرایط تاریخی جغرافیایی الله تعالی دنبال قصه نیست ما انسان ها هستیم یک قصه ای که بشنویم هی دلمو میخواد که بریم جزیات را بفهمیم خیلی وقتی که دنبال قصه بری اون درسی که باید از قصه بگیری اون واضی که باید از قصه بگیری ون که بعد از قصه بگیری، اون فراموش می‌کنی میری تو جزییات گم میشی. به این خاطر الله تعالی این این مسائلی که غیر مربوط هستند در قرآن اینها را ذک نمی‌کنه. همون بخشی از قصه را ذک می‌کنه که از اونجا یک مطلبی باید گرفته بشه، یک وعده‌ی باید گرفته بشه. به این خاطر خدا تعالی نفرموده این کجاست و در چه تاریخی بوده؟ اما در این رابطه خیلی قیل و قال هست بعضی میگن که شهری هست در روم به نام خلیج عقبه و همون ایلکی ارز کردم در شمال این شهر کوهایی هست در نزدیک اون کوها شهری به نام رقیم بود بعدا در سالهای بعد آثار اون شهر هم پیدا شد. اون شهر دیگه ویران شده بود آثار زندگی در اون شهر پیدا شد لذا میگویند این افراد در اون شهر زندگی میکردن به این خاطر این میگن رقیم این یک قول که این مال روم هست قول دوم البته اون زمان شام و فلسطین جز روم بود الان این در شام واقع میشه در نزدیک فلسطین بسیاری همین قول را ترجیح دادند بسیاری همین قول را ترجیح دادند در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالیٰ عنہ سپاه مسلمانان داشمیرف به طرف شام از شام به اون طرف میرفت به طرف روم میرفت برای جنگ با رومی ها در مسیر کی میرفتند گفتن که اصحاب کهف غارشون اینجاست غارشون اینجا هست به معاویه گفتم ما بریم نگاه بکنیم گروهی رو فرستاد که شما برید ببینید آثاری از این غار هست یا نیست در شام نزدیک فلسطین گفتن ابن عباس رضی الله عنهما گفته که نروید اونجا چون اونجا موفق نمیشید ببینید چون قرآن میگه که ما روح بی انداختیم چنان روح بواشتی کسی نمیتونه ببینه معاویه گفت که قول ابن عباس را بذارین سخن مال خودشه بری نگاه کنید تحقیق بکنید بیایید وقتی که رفتن اونجا میگه که بر لبه غار قرار گرفتیم بر دهانه غار قرار گرفتیم از داخل غار چنان بعدی آمد که بعد سیاهی هم بود همه ما را پرد کرد دور افتادیم و چنان وحشتی افتاد از اونجا فرار کردیم دیگه نرفتیم و رفتیم به معاویه گزارش دادیم که همونطور که ابن عباس گفته بود واقعیم وحشتناک که نمیشه رفت این داستان را بعضی نقل کردن گفتم پس معلوم میشه که این غار در فلسطین هست در شام هست همون ایله قول دوم که بسیاری از علماء این قول را ترجیح دادند شهری ده از ترکیه هست به نام شهر افسوس. این شهر به فاصله 20 یا 25 میل شهر ازمیر ترکیه الان. لذا در نزدیکی همین شهر افسوس در ساحل غربی ترکیه، اونجا کوهی هست، این غار غار اصحاب کهف الان اونجا هست. قول دیگر اینه که شهر دیگری هست در ترکیه به نام ترسوس این غار در اون شهر است. علامه اندلوسی که خودش از اندلوس هست از اسپانیا هست ایشون اصرار دارد که اصحاب کهف در اسپانیا در اندلوس هست اونجا بودند یعنی این مفسرین عجیب است. که جاهایی را به عنوان اصحاب کاف ذکر می کند که با هم دیگه خیلی فاصله دارن. بعضی ها اسپانیا را گفتند بعضی ها ایتالیا و روم را گفتند بعضی ها شام و فلسطین گفتند بعضی ها ترکیه را گفتند و هر یکی دلایلی هم ذکر کرده هر یکی وقتی که دلائلش را شما می تو تفسیرها شما غانی میشید. مثلا میگه ما رفتیم حتی اللہ ما اندلوسی خودش رفته ما رفتیم اونجا استخانهایی هم دیدیم که چند نفر هستند استخانهایشون هست و این نو استخانات در همه غارها هستند اصلش اینه که الله بهتر میدونه این غار کجاست ولی در زمان قدیم در دین سیدنا عیسی علیه السلام بعد از عیسی رهبانیت رواجی یافت رهبانیت چیه؟ یعنی غار نشینی زندگی کردن در غارها مردم می‌رفتن و گوشه‌نشینی می‌کردند در دین اسلام رهبانیت نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه ندادن که ما از اجتماع از جمع فاصله بگیریم از زن و بچه دور بشیم از مردممون دور بشیم از بلخره جامعه شهر دور بشیم بیرم توی غار عبادت کنیم این درست نیست برای ما اما اونها داشتند شما تو قرآن هم و رهبانیت ان ابتدعوها رهبانیت را خودشون ایجاد کردند به خاطر رضای خدا خب هر چند تا درویش چند تا راهب چند تا عابد و زاهد می رفتند توی غار عبادت میکردند همونجا عبادت میکردند و می مندند تا اینکه مرگشون فرا می رسید همونجا می مردند لذا کسی از احوال اونها خبر نداشت اون زمان این ارتباطات امروز نبود این رسانه ها نبود این اطلاعات نبود هر کسی تو غاری می مرد همون غار قبرش می شد لذا این نوع ها زیاد هستند که هر غاری بیر می بین استخان است پس این استخانها در واقع لازم نیست که اینا اصحاب کهف باشند اینها انسانهایی هستن که موتشون تو اون غارها آمده انسانهایی که مثل اصحاب کهف رفتن به غار پناه بردند، اونجا خدا را یاد کردند، خدا را عبادت کردن هم همونجا مرگشون آمد لذا هر مفسری یه جایی را ذکر کرده که این غار مال اصحاب کهف است ولی بیشتر این دو جا را ترجیح دادن یکی همین ایله که در نزدیک فلسطین هست و یکی شهر افسوس ترکیه بعضی گفته اصحاب کهف اینجا بودند اما این اصحاب کهف در چه زمانی بودند در این رابطه هم غیلقال زیاد هست اما قول صحیح اینه که اینها در زمان پادشاهی بودند اون پادشاهی که این ها مجبور کرد الان داستان را که شروع بکنیم میخوایم که پادشاهی بنام دقیوس بود یا دیکیانوس این پادشاه از سال 21 تا 251 میلادی زندگی میکرده از سال 21 تا 251 میلادی یعنی دویست سال بعد از میلاد حضرت عیسی این جوانان بر دین توحید بودند، اون زمان دین توحید دین عیسی بود یک تا پرست این پادشاه اینها را مجبور کرد اینها رفتند تقریبا گفتند که اون زمانی که اینها به غار پناه بردند حول و سال دیویست و بود نرسیده به دیویست و میلادی از اون زمان که اینها خواب رفتند تا سال 550. و پنجا. پانسد و میلادی تا این سال اینا در خواب بودند این زمان پادشاه دیگری تحولات آمده بود در این شهر رومی ها که مسیحی بودند حمله کردند شهر را تصرف کردند بودپرستان را از بین بردند و یک تاپرستان آمدند پادشاه دیگر به نام بعضی گفتند بیدروس بعضی گفتن که ثیود تیود نام های عجیبی هستند، رومی هستند، پادشاه دیگری آمد و این زمان حکومت می کرد. این زمان که اینها از خواب بیدار شدند حدوداً سال پانصد و پنجای میلادی بود. و رسول الله صلی الله علیه و وسلم چه سالی متولد شدند؟ سال پانصد و میلادی. یعنی زمانی که اصحاب کهف از خواب بیدار شدند 20 سال قبل از ولادت رسول الله بود. اینا بیدار شدند و یکی دو روز بیشتر نماندند دوباره فوت کردند. لذا این جریان با ولادت رسول الله زیاد فاصله نداره یا 20 سال یا 30 سال همین اندازه هست. قول سهیتر همینه که اینها پیروان عیسی بودند. و در قبل از ولادت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم البته سی سال سی ست خوردی سال قبل از ولادت ان حضرت اینا به خواب رفتند و بیسی سال پیش از ولادت ان حضرت اینا از خواب بیدار شدند و بعد از اون خداوند موت حتمی را بر اونها آورد این در ارتباط با تاریخشون در ارتباط با موقعیت جغرافیاییشون همینه که ارز کردم اینها یا در ایله بودن فلسطین بودن یا در نزدیک ازمیر ترکیه اما این بحثات را قرآن ذکر نکرده ما هم مکلف نیستیم اینها را بدونیم بسیاری از مفسران اعتقاد دارند که ابهیمو ما ابهامه الله چیزی که خدا مبهم گذاشته خدا نامشخص گذاشته شما اونطور نامشخصشون بدونید زیاد دنبال نکنید اصل اون چیزی که مهم است ببینید اون مطلبی که خداوند استنباط می کند و درس و مععزهی که خداون از این داستان برای ما مد نظر دارد اون را محکم بگیریم خب اللہ تعالی می فرماید اذ اول فتیتو من در اول سوره یوسف هم خدمت شما کردم عادت قرآن این هست که وقتی که داستان طولانی بشه اول خلاصه داستان را ذکر میکنه خلاص اشرا تا یک نتیجگیری بشه بعدن به تفصیل داستان میپردازد این اجمال داستان است اذ اول فتیتو ایلالکهف زمانی که پناه بردن جوانان ایلالکهف به غار بیشتر خدا تعالی، کلمه فتا را بکار میبرد فتا به نوجوان و جوان اطلاق میشه معلوم میشه که جوانان وقتی که بر دین و بر مسیر دین قرار بگیرند استقامت اونها از بقیه بیشتر است و بیشتر دعوت را در طول تاریخ جوانان لبه گفتند کهان سالها زیاد استقبال نکردن اونا نفهمیدن درک نکردند. بیشتر جوانان بودن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که مبعوض شدند تنها کسی که از همه سن نشبالاتر بود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبود که دو سال از رسول الله کوچک بود ابو بکر و سال سن داشت یک یک تار سفید شده بود دیگه اونم جوان بود تا چهل سالگی انسان جوانه بقیه همه جوان و نوجوان بودند که از رسول الله استقبال کردند اینها که بعدن به مشایخ اسلام به شیوخ اسلام تبدیل شدن اول جوان بودند سن نانچنانی نداشتند حتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خیلی جوان بود نو جوان بود ایشون را جز مردان حتی در ابتدای اسلام به حساب نمی کنن. میگن کسانی که از بچهان ایمان آوردن ولی کسی عزرت علی بود خیلی نو جوان بود پس اللہ تعالیٰ می فرماید اذ اول فتیتو الالکهف زمانی که پناه بردند جوانان بغار پناه بردند وا ببینید چه دعایی کردن مردم میگویند که اینها اولیاء بودند بنا انہا نظر و نیاز بکنیم الله میفرمه اینها ما را صدا زدند بودند اینها مشکلشون را حل مشکلشون را از ما خواستند ما پناہشون دادیم ما برای اونها چاره کردیم شما بجای اینکه اینها را صدا بزنید شما کسی را صدا بزنید که اینها اورا صدا بزدانند لذا الله میفرماید فقالو ربنا این جوانان گفتن ربنا آتنا من لدن رحمه ای رب بما از جانب خودت رحمت ببخش یعنی رحمت خودت را شامل حال ما بگردان مارا از لطف و از مهربانیت محروم نگردان و حیئ لنا من امرنا رشد و آماده بفرما محیاب بفرما برای ما در این امر ما امرشون چی بود؟ هجرت اینکه ما هجرت میکنیم برای ما رشد را یعنی راهنمایی را آماده بفرمایید یعنی ما را راهنمایی کن کجا بریم چیکار بکنیم اینها بلا مقصد خارج شدن از شر از که خارج شدن گفتن کجا بریم سرگردان بودند جایی نداشتند پناگایی نداشتند تهدید شده بودند که از اگر از این دین, دین بر نگشتید همه شما را ما اعدام میکنیم یا سنگسار میکنیم از صحبت های خودش معلوم میشه که اون زمان هر کسی که از دین کفر و از دین بت پرستی به دین دیگه میرفت را سنگسار میکردند لذا گفتم ما کجا بریم سرگردان بودن دعا کردند خدایا ما به خاطر تو خارج شدیم تو مارا راهنمایی کن هایق لنا من امرنا رشدا در این امر هجرتی که ما داریم برای ما هدایت را و راهنمایی را مقدر بگردان و آماده بگردان ما را راهنمایی کن کجا بریم الله می فرماید ما اونهارا راهنمایی کردیم که برن بغار غار تو غار بخوابند جای امنی ما هم لالاییشون کردیم که اصلا از خواب بیدار نشن فضربنا على آذانهم في الكهف عددا برگوشائشان برگوشائشان یعنی سنين عددا ما برگوشایشون برگوشایشون زدیم یعنی گوشاشون رو در غار سنین عددا تعدادی سال سالهای زیادی در غار خابیدن ثم بَعَثْنَاهُمْ سپس آنها را بلند کردیم از خواب بیدار کردیم لنعلما این حکمت بیدار کردن تا که مشخص کنیم معلوم کنیم ایل حزبین احصا لما لبثو امدا از این دو گروه کدوم یک بهتر حفظ کرده اون چیزی که در غار مانده از نظر مدت کدوم مدت را بهتر میدوند چون با هم اختلاف کرداد این دو گروه کدوم دو گروه هست؟ در تفسیر این هم اختلافه بعضی میگن دو گروه همین دو گروه از کف مراده دو گروه شدند یک گروه گفتند که ما اینجا نیم روز ماندیم گروه دوم گفت نه آقا یک روز کامل ما اینجا بودیم لذا هر دو نمی دونستند هر دوشون خبر نداشتند بنابر این الله عز و با این حساب نشومیده که عالم الغیب خداست ببینید اینها شک در اولیاء بودن اینها نیست اینها اولیاء خدا هستند یا نیستند اینایی ای که خدا این کرامت را به آنها بخشید از دست پادشاه ظالم 300 سال لالایی شون کرد در خواب راحتی آنها را فرو برد بعد از سال دوباره زنده کرد دوباره از خواب بیدارشون کرد در این سی سال اللہ می فرماید همیش ما اینها را این سمت و سمت می غلطاندیم که بدنشون خراب نشه بدنشون زخم نگیره لذا از اینها ولی تر داریم از اینها اولیاء بزرگتر داریم که خدا این همه لطف به اونها کرده اما ببینید اینها نمرده بودند اینها خواب بودند قرآن خواب تعبیر کرده با وجودی که خواب بودند از ماحولشون خبر نداشتند از اطرافشون خبر نداشتند 300 سال گذشته خورشید طلوع کرده غروب کرده شب شده روز شده طوفان باران حوادث اتفاقات تو این 300 سال مگه کم بوده اینا اصلا از این چیزها خبر نداشتند بس وقتی که کسانی که میخوابند و خبر ندارند میمیرند و خبر ندارند اونا چطور میتونن عالم الغیب بشن کسی اگر بخواهد بدون واقع واقعیت هارا از همین داستان از همین بخشش میدونه که اولیاء خدا عالم الغیب نیستند فقط خدا از عالم الغیب و ایلا اینا با هم جر رو بحث نمی کردند. با هم مباحثه نمی کردند. یکی میگه نه یک روز یکی میگه نه سه روز نصف روز پس القائلون خودشون حسن قائلون لبسها ها یومون گروه دیگه گفت رب بکم عالم و بمالبستم خدا میدونه شما چقدر مندید این بحث را کنار بریم به فکر غذا باشید خب اینها این همه این مدت گذشته این قد بلاخره هنوز نمیدونن که چه تحولاتی آمده میرن تو شهر پول قدیمی و سکه قدیمی را میدن که خرید بکنن خب معلوم میشه اینها اصلا از احوال باخبر نیستند خب بعضی میگن ای الحزبن دو گروه اون دو گروهی که بعدا ذکرشون میاد ایت در اون زمان پادشاه جدید همین پادشاه بیدروس دو گروه بودن یک گروه موحد میگفتن که بعد از مرگ زنده شدن است یک گروه مشرک میگفتن نه بعد از مرگ بمیریم دیگه زنده نمیشیم اون دو حزب اون دو گروه مشخص میشه که کدوم حدسش درست بوده کدوم اعتقادش درست بوده چون زمان وحی نمی آمد دلائل دیگری نبود زمان ایسا خیلی گذشته بود نمی دونستم مردم اعتقادات خودشون را چطور اثبات بکنن تا اینکه خدا اینها را زنده کرد بعدا متوجه شدن بله بعد از خابیدن بلند شدنی هست بعد از مردن زنده شدنی هست الله می فرماید نحن نقص علیک خب تا اینجا خلاصه داستان تمام شد حالا تفصیل داستان شروع میشه الله تعالی می فرماید نحن نقص علیک نباءهم بالحق ما تعریف میکنیم بر تو داستانشون را خبرشون را به حق تعریف میکنیم ارزم کنم که این جوانان همونطور که ارز کردم از منطقه رقیم بودند از شهر رقیم بودند اما اینها اصلا در این رابطه تاریخ نویسند خیلی طولانی نوشتند خلاصه را خدمت شما ارز کنم که معتقیدن اینها عربی اصل الاصل بودند اصالتن اینا چی بودند؟ عرب بودند و یکی از فرزندان سیدنا اسمایل علیه السلام بنامه نبات یا نابت در مکه مکرمه بود این بعدا فرزندانش زیاد شده اینا از بنو نبت هستند از همون بنو نابت هستند همین جوانان اصحاب کف اینا بعدا رفتن در شهرها در بلاد پخش شدند جمعیتشون زیاد شد و در واقع در این شهر رقیم تمام اینها از فرزندان و از نوادگان اسماعیل بودند پس اینها اصالتن عرب بودند خیلی ها همین نوشتند و یهودی ها که از مشرکین گفتند چون مشرکین هم عرب بودند با مشرکین وجه شب شباحتی هم داشتند ال ای حال این جوانها وقتی که در میان قومشون دیدن که قوم بود پرستی می کند قوم یه چیزهایی را که بعدستان خودشون میسازد و می بافد و درست می کند بعدا میره جوی او کورنش می کند او میره اطاعت می کند، و دور آدور شنیده بودند از دین مسیح دین یک تا که دینی وجود دارد که او میگوید فقط یک خدا را باید عبادت کنیم اون خدایی که این آسمان را آ خلق کرده آسمان ها را زمین را خلق کرده ما را پیدا کرده همون یک خدا را درست نیست دیگه کسی را عبادت بکنیم بلاخره یک روزی روز عیدشون بود و روز جشنشون بود همه مردم بیرون شهر رفتند خدایان را هم با خودشون برده بودند هر یکی در قدیم یک رسمی داشت یک جای خدایان را گذاشتند و همه برای خدایان تعظیم کردند یک جوانی که در رأس اینها بود بعضی میگن که اسمش یلمیخا بود بعضی میگن که مطلمینا بود والله عالم این اسما را گفتن اسمای اصحاب کهف هستند یکی از اینها بود این گفت که یعنی چه این خدایان را که ما درست کردیم اونا ما را درست نکردند خود اینها را ما درست کردیم الان بیای ما برای اینها عبادت کنیم گفت من نمی کنم گفت که رب اونا رب السماوات والارد رب ما رب آسمان ها و زمین است کنار کشید رفت سایه درختی با مردم سجده نکرد کرنش نکرد جوانی دیگری او هم متاثر شد سومی چارمی شش تا شدند اینا با هم اونجا بسایه درخت نشستن اول جرات نکردند که از هم دیگه بپرسند بعدم پرسیدن شما اینجا اون اولی گفت اون المیخا گفت حقیقتش من اعتقاد ندارم دومی دو همینه گفت سومی با هم عهد بستن اینها اشراف بودند اینها از فرزندان وزیر وزرا بودند از خواص بودند با هم عهد بستند که ما از این به بعد با هم جمع میشیم هرچی که یاد داریم و از هم دیگه یاد میگیریم مینشینیم خدا را عبادت میکنیم رب حقیقی را دیگه بطع عبادت را میکنیم اینها به صورت خودجوش با هم عهد بستند هر روز با هم جمع میشدند و نیاش می‌کردند عبادت می کردند، از کار و اوراد می‌خواندند خدا را زاری می‌کردند تا اینکه به پادشاه خبر رسید همین دقیانوس یا دقیوس بهش خبر دادند که بسیاری از فرزندان اشراف هستند اینها دینی دیگه انتخاب کردند ف... پادشاه اینها را خاص و بعد از اینکه به این نتیجه رسید که اینها این خبر درست است پادشاه میخواست اینها را از بین ببره اینها را بکشد ولی بعدا دید چون از اشراف هستند و از خواص هستند به اینها مهلت داد گفت شما را یک هفته مهلت میدم برگردید از این دینی که رفتید از این دین برگردید و الا من شما را اعدام میکنم شما را از پای در میآورم اما همین الان دستور داد خل لباسشون بکنند در زمان قدیم اشراف زادگن لباس های خاصی داشتن عامه مردم لباس خاصی داشتن همه مثل هم نبودن هر کسی را می با لباس می شنختی که این از اشراف است این از قشر بالاست از سطح بالاست عموم مردم مردم عادین یک نوع لباس است اینا را دیگر لباس هایشون راستنشون کشیدن گفتم مثل بقیه مردم شما لباس بپوشید و یک هفته بهشون فرصت داده شد گفتم باش اینا با هم مشوره کردن چی کار بکنیم بعدن گفتن که ما اگر اینجا بمانیم ما را یا سنگ میکنند، می و یا ما را به دین خودشون بر پس ما از خیر؟ کشور و از خیر شهر و از خیر شاهزادگی و زادگی و از همه متع دنیا بگذاریم بریم خدایمون را راضی کنیم بریم یک جایی که دین ما محفوظ باشد حجرت کردند معلوم میشه هر وقتی که انسان در جایی هست که دینش در خطره آینده فرزندانش در خطره این انسان باید کوچ بکنه باید بره خدا برایش جای گشادهی میده خدای عزوجل برایش لطف میکنه نماند انسان باید بره جایی که دینش محفوظ بمانه ولی متاسفانه امروز مردم برعکس از جاهایی که الان دین هست اونجا دینداری هست تعلیم دین هست تعلیم قرآن هست همه برنامه دینی برای فرزندان هست اما مردم به خاطر رفاه خودشون جاهای میرن زندگی میکنند که خبری از نام خدا نیست هیچ وقت اذان به گوشش نمیرسه فقط به خاطر رفاه آینده این نسل چی میشه اگر این بره به سوی ارتداد و به بیدینی این پدری که دنبال رفاه خودش و فرزندانش بوده مؤاخذه میشه فرض هست لازم است از جایی که دینت در خطر از اونجا حجرت کنی از اونجا بری جایی که دینت محفوظ بمانے اینها با خودشون همین تصمیم را گرفتند اللہ می فرماید اِنَّهُمْ آمنو آمَنُوا بِرَبِّهِمْ اِنها جوانانی بودند که ایمان آوردن ربشان مطابق تعلیم عیسیٰ علیہ السلام وَزِدْنَاهُمْ هُدَاء ما در هدایتشون افزودیم. ببین وقتی که ما درجات هدایت را قبلا خواندیم، اولین درجه هدایت انابت است. در جستجوی حق بودن است. بعد از اون که انابات داشتی، دنبال حق بودی، خدا خودش راهنماییت میکنه. این میشه هدایت. بعد از هدایت استقامت کن. از از کنم که سختی ها نه راست عقب نشینی نکن در این مسیر هر تر خوش کی میاد تحمل کن بعدن خدا تعالی بیت ربط القلب میده ربط القلب چارمین درجه هدایت است یعنی دلت را چنان قرص و محکم بیکنه که تمام دنیا جمع بشه بخواد تو را از مسیر دین منعرف کنه نمیتونه جنان تو دلت غرصه لذا اللہ می وربتنا و ربطنا علا قلوبهم ما ربط زدیم یعنی گره زدیم بیتعبیری خودمون دل را غرص و محکم کردیم اذ قاموا زمانی کی انها استقامت کردند فقالو ربنا رب السماوات والارض گفتن رب ما رب آسمان ها و زمین است لن ندعو من دونهی اله هرگز ما صدا نمی زنیم بغیر از اون رب معبود دیگری را معلوم میشه که هر کسی را بغیر از اون صدا زدی و کمک خواستی و حاجت طلبی و میشه معبودت بغیر از او معبود دیگری را ما صدا نمی زنیم لقد قلنا اذن شططا اگر این کار را کردیم همان ما در این هنگام شطط گفتیم شطط یعنی از حد گذاشتن، از حد تجاوز کردن زیاد روی کردن زیاد روی کردیم و اینها ناراحت بودند بر قوم خودشون که چرا قوم ما بودپرستی می کنند هاولئی قومنا اتخذوا من دونه آلها اینها قوم ما هستند بغیر از اللہ دیگران را معبود خودشون گرفتند لولا یعتون علیهم بسلطان بین چرا بر این دین و بر این آین و عقید خودشان نمی آورن به سلطان بیین یعنی دلیل روشن مدرک سیرا ندارن همیشه اهل خرافات و اهل شرک دلیل ندارن بپرسی که چرا شما اینها را عبادت میکنید میگه پدران ما عبادت میکردن امد دلیلشون تقلید پدران است. فمن اظلم و من منفتر الله کذبا چه کسی ظالم تر از اون کسانی که افترا میگوین بر خدا دروغ را ببین افترا بستن بر خدا دروغ بستن بر خدا همینه که انسان بگه این نائب خدا است خدا گفته این صدا بزنید خدا گفته برای این گوسفند بکشید هر هر گندی میزنه و هر غلطی میکنه نسبتش میده به خدا این بزرگترین افترا است امروز اهل خرافات و افترا الافترا میگویند دروغ میگن بر خداوند چی میگن تو کتابها علا این کتابها زیاد بفروش میرسه نوشتن بعضی کتابها که اولیاء خدا دوستان خدا وقتی که چشم از این جهان میبندند ارواحشون پرواز میکنه میره ارواحشون در آسمان ها با فرشتگان همراه میشن بعدن خدا تعالی به ارواح اینها میگه که شما با همین فرشتگان همراه باشید در همین مناطق خودتون گشت بزنید تو مسئله لاشمخان این را در مقدمه به ارواح اینها میگه که شما در همین مناطق خودتون گشت بزنید مثلا یکی از اولیاء مال بلوسیسلام بودن میگه حدود اختیارات تو و تصرفات تو در همین منطقه خود توبلوجستان است اینجا هر کسی چون مردم با تو آشنا هستند اولیاءشون تو بودی هر کسی تو را صدا زد برای فرزندی بیش فرزند بده هر کسی تجارتش کاسید بود تجارتش را رونق بده هر کسی مریضی داشت برو مریضش را شفا بده این اختیارات را من خدا به بی تو میدم در همین مناطق خودتون این کارها را بکنید این دروغ ها را، این دروغ بر خدا این ها رو بخورده مردم میدن مردم هم باور میکنند مردم در گذشته شما نگاه کنید هر منطقه هر چند کیلومتری یک محبود داشته مردم برای او میکشند میکشتند برای او نان خیرات میکردند به نام او نظر میکردند او را صدا میزدند او فریاد می زدن ایک جایی هست اینجا ملک سیاکو هست ایک جایی هست پیر سوران هست ایک جایی سیستان بی بی دوست هست ہر منطقه ایک چیزای الان تو کتاب های تفسیر ہندوستانی ها می چنان نامهای میاد آیت کہ انسان تعجب میکنه کنے چه نامحایی هست بلاخر نامای عجیب و غریب می گئن اینا اولیاء اون منطقه بودن نامحای محمد منطور برای بازی عجیب ہے لذا هر منطقی در گذشته همین داشته الان بعضی سائی می دوباره همین رو ترویج بدند سعی می کنند دوباره همین زیارتها را گرم بکنند دوباره میرن همون گمبودها درست می دوباره دلشو می مردم تجمع کنند محل تجمع باید مساجد باشند ما اینجا جمع بشیم الله را عبادت کنیم زیارت قبور سنته انسان گاهی بره نبی صورت اینکه دست جمعی یک جا در یک مناسبت جمع بشه گاهی بریم دعایی در حق اونها داشته باشیم خدای اینها را ببخش نه اینکه از اونها دعا بگیری اونها معتاج دعا هستند هر چقدر باشد بالاخره این خدمت شما عرض کنم که مردم در گذشته بر خدا افترا گفتند بسیاری باور کردند و بسیاری حتی در رابطه با همین نوع آستانه هایی هست که اینا خواست خاصی دارن. مثلا بعضی میگن اینجا برای این خاکی که این بزرگوار داره برای تمام مریضی های پوستی خوبه اونجا برو بگلت خوب میشه بعضی ها برای ام فلان مریضی خوبه این ها را خدا بهشون داده این خواست را اخی به چه دلیلی هست الله علوسی رحمه الله همین مطالب را ذکر میکند تو تفسیرش بعد میگه که از این افراد وقتی که میخوایم بگین دلیلتون چیه میگه که سبت ذالک بالکشف این با کشف معلوم شده دلیل تو قرآن و حدیث نیست همین طور برای ما کشف شده برای ما ظاهر شده یا تو خواب دیدیم یا تو بیداری دیدیم که کسی آمد اونی که تو خواب دیدی اونی که تو بیداری دیدی و آمد به تو گفت که در این خاک شفا هست در این قبر فلان خواص هست در این آستان فلان هست شک نکونو شیطان بوده آمد بهت گفت اگر راست میگی چون قرآن میگه و قیدنا لهم قرانا ما برای انها گمار دیم بعضی از شیاطین که قرین و هم دم همرای انها هستن همیشه اونها را تو خواب و تو بیداری میگه این کار بکن اون کار بکن اینجا گسفن بکش اونجا برو سجده بکن اونجا برو تواف بکن همین عبادت غیرالله همین افترا بر خدا دروغ گفتن رضا اللہ می فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا شي کسی ظالم تر از ان انسانی کی افترا میگوید بر الله دروغ را و اذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله این سخن یا سخن بین خودشون هست. بعض مفسرین همین گفتند این جمله بین مذاکره بین خود اصحاب کافه ها اینه من خدمت شما نگفتم که این شش نفر بعدا با هم به این نتیجه رسیدن گفتن که ما اینجا بیشتر نمانیم که دین ما در خطر است بریم بریم بیرون شهر رفتند رفتن وقتی که رفتند در حاشیه شهر چوپانی را دیدند که گوزفندانی را میچرانید گفتند که اونا گفت کجا میری گفت که ما یک تا هستیم خدا هستیم میریم دینمون رو نجات او چوپان بیچاره گفت که منم از مدت ها به همین نتیجه رسیدم منم بر همین دین هستم اجازه بدی با شما بیام گفتم بیا با ما گفت سب کن من گوسفندان را ببرم به شهر برسانم به صاحبش برسانم چوپان گوسفندان را برد برگشت اما سگ باش آمد سگ دنبالش کرد قرآنم ذکر میکنه سگ باش امود بلاخره هفت نفر شدند اینا با هم رفتند وقتی که رفتن، اون دعایی که شما قبلا خاندید اون دعا را کردند گفتند که ربنا آتنا من لدن رحمه خدای برما رحمت بباران مارا مورد رحم و لطف خودت قرار بده و حیئ لنا من امرنا رشدا در این امر حجرتی که ما حرکت کردیم و شهر بیرون آمد ما را حلمای کن کجا بریم سبحان الله. این اشرفزادگان اینهایی که تمام پدرانشون در کابینه و در کاخ و سلطنت بودند به خاطر دین خدا اینها خارج شدند چقدر لذت بخشه الله چقدر دوست داره این نوع افراد را که اون ناز و نعمت را به خاطر دین خدا ترک میکنند واقعا سزاواری همین کرامت خدا را دارند لذا دعا کردند دعا کی کردند اللہ تعالی بعضی میگه به اونها الهام کرد، بعضی میگه و اذیعت زل این الهام الهی است که در دل های اونها میانداخت. بعضی میگه نه این مکالمه باهمه، فی ما بینشون هست. الله میفرماید و اذیعت زل تموهم هرگا جدا شدید از اون شهر، از اون مردم و ما عبودون ایلا الله و هرگا جدا شدید از انهایی که عبادت کردن غیر از الله را شما که جدا شدید فاو الى شما رجوع کنید به كهف شما یعنی پناه ببرید به كهف به غار بعضی گفتن که این قول قول رئیسشون است یا المیخاس یا ماکس است و ارز کردم فی ما بینشون بعضی میگن نه این سخن سخن الله است الله در دلشون میگفت وقتی خدا به من و تو هم الهام کنه تو دل میت الله میگه برو این راه را برو خود به خود اون راه را میریم نجات می یابی لذا اینهار خدا گفت که برین شما به طرف غار فابو کف شما پناه ببرید به کف ینشر لکم ربکم من رحمت می گستراند برای شما رب شما از رحمته خودش. الله رحمت خودش اللہ رحمت را بر شما می باراند و یهیئ لکم من امریکم مرفقا الله مهیئ می کند برای شما در کار شما نرمی یعنی با لین و با نرمی و با تلطف مهربانی با شما برخورد می کند بلاخره رفتند و رفتند تا اینکه به این غار رسیدند همین غاری که مقدرشون در اون غار بود اونجا رفتند گفتند که بریم خیلی راه آمدیم بلاخره ناز پرورده بودند اشراف زاده بودند تا راه نیامده بودند خسته بودند گفتم میریم داخل غار و استراحت میکنیم اونجا که رفتن استراحت بکنند خوابیدند همون خواب بود که رفتند برای همیشه خوابیدند این خوابشون طولانی شد این خواب به اندازه طولانی شد که قرآن میگه سیصد سال گذشت یا سی نه سال اگر حساب شمسی را حساب بکنیم سیصد سال میشه. اگر حساب قمری را حساب بکنیم سیصدو نه سال میشه. بلکه خاره اینها خابیدند. الله عزوجل چگونه از اینها محافظت کرد سبحان الله. الله می‌فرماید که خورشید هر وقتی که تلو میکرد از غارشون به داخل غار نمیتابید و از کنم حرارت خورشید داخل غار نمیزد. از کنار غار وقتی که زوال می شد از, از وسط آسمان به طرف غروب می رفت باز اون کناره دیگر بعضی از مفسرین یک نقشه های ریاضی کشیدند ولی نیاز به این نقشه های ریاضی نیست بعضی گفتند که دهنه غار شمالی جنوبی بود خود مسلمه وقتی که خورشید طلوع بکند اون قسمتش که شمال باشه اونجا دیگه داخل غار نمی خدای از و طوری کرده بود که هیچ وقت داخل خورشید نمی و بعد الله تعالی می فرماید که اینها را یک حالت بیداری داشتند اگر شما می دیدید فکر نمی کردید خوابند فکر میکردید که بیدار هستند و بعد الله تعالی می فرماید و نقل بهم ذات الیمین و ذات الشمال جانب راست و چپ ما اونها را می دیم چون وقتی که انسان به یک قسمت بدنش به زمین باشه مسلم این قسمت بدن را اکسیژن نمیرسه. وقتی که اکسیژن بهش نرسه قطعا این قسمت چی میشه کم کم خراب میشه سخت میشه و اون حالت زنده بودن خودش را از دست میده به خاطر اینکه تمام بدن را هر لحظه اکسیجن برسے اللہ می فرمائے ما ان ہر می غلطاندیم بجانب راس می خابدانت لحظاتی بعد بجانب چپ می غلطاندیم کہ این قسمت دیگه ہوا بخورد اکسیجن پیش برسے اللہ می فرمائے وتر الشمس اذا طلعت می بینی خورشید را هرگاه طلوع می کرد تزاور وان كهفهم متمایل می شد از غارشان ذات الیمیم به جانب راست یعنی جانب راست غار خورشید تابشش می خوند داخل غار نمیزد و و اذا غربت تقریدهم هرگاه وقتی که خورشید غروب می کرد تقریدهم یعنی تعدلوانهم از اونها ادول می کرد اونها رو می ذات الشمال داد جانب چپ و هم فی فجوت من اونها در یک محل وسی بودن فجوه میگن مکان متسع تو غار جای وسی خدا قرار داده بود غار معمولا دهنش البته غار هم در زبان عربی هست از هما فی الغار شما خاندیم برای رسول الله و ابو غار هم میگن کهف هم میگن بعضی میگه هر دو یکی هستم بعضی میگن نه غار اونه که دهنش هر اندازه باشه تا آخر تحشم هم همون اندازه است اما کف اونه که دهنیش باریکه دهنیش کوچکه مثل کوزه اما داخل که میره وسیح است اینها غاری نبود کهف بود ولی ما تو فارسی به هر دو غار میگین از نظر فارسی زبان فارسی فرقی نمی کنه چه داخلش وسی باشه چه داخلش تنگ باشه هر دو را غار میگویند لذا این داخل کهف بودند و هم فی فجوت من این در یک جای فراخی بودند از همون کهف و غار ذالک من آیات الله الله می فرماید این از آیات الهی هست یعنی از کمال قدرت ماست که ما چنان برای این جوانان کرامت بخشیدیم الله می فرماید من یهد الله فهو المعتدی هر کسی اصل اینه کسی کی خدا او را ہدایت کنه او هدایت می و ومن یضلل هر کسی که خدا گمراہش کنه فلن تجد له وليم مرشدا هرگز نمی بینی برای او حامیه کی او را الله کنت اللہ اگر ولی من شما باشه من شما را را را را ما در قرآن داریم بعد اس آیئے کرسی اللہ او ولی ال ولی مؤمنان حامی مؤمنان کی اللہ است اللہ کے حامی ما شکار بھی کرے یخرجهم من الظلمات الى النور از تاریکی از جہل از کفر از شرک خداوند بیرونیشو میکنه راهنماییش میکنه به وسیله انبیاء به وسیله کتابها به سوی نور به سوی توحید به سوی ایمان به بهشت پس هر کسی که خدا گمراهش بکنه فلن تجد له ولی مرشدا هر کس برای او حامی کیورا راهنمایی بکنه شما نمی آبید ای حالین انها وقتی که تو غار بودند حالات عجیبشون رو الله بیامی فرمید الله بیامی فرمید وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ آنها را می پنداشتی که بیدار بودند، اصلا بیشک کلی آدمای خواب نبودند. چه بلاسه بیشک کل مرده نه، مثل کسانی که بیدار ولی غلطی ده. و تحسبهم عیقازان می پنداشتی آنها را بیدار هستند. در حالی که وهم رقود، آنها خواب بودند. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال انها را ما می غلطاندیم می گرداندیم جانب راست و جانب چپ یعنی خدا هر لحظه تائین کرده بود فرشتگانی را که انها را می غلطاندند تائین که بدنشون خراب نشه لئاللہ تأکل تراب من اجسادهم تانکه خاک جسدشون را نخوره همیشه تو خاک باشه جسد دیگه خاک می خوره خراب میشه. به این خاطر لحظه لحظه فرشت معمول بود که اینا را می غلطان اینا خودشون خواب بودن خبر نداشتن وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِید اما سگی انها هر دو ذراعش را به اسطلاح دستهاش را تحن کرده بود بِالوَسِید وَسِید می که ورودی را در را چارچوب را میگویند، اونجا چارچوبی نبود همون ورودی غار اونجا سگ دم غار همون تور خابیده بود و اونم خواب رفته بود الله تعالی می فرماید لو اطلاعت علیهم اگر شما اونجا سرک میکشیدی می رفتی نگاهشون می کردی اطلاع یعنی سرک کشیدن نگاه کردن لولیت منهم فرارا چنان روح بود که پشت می دادی نسبت بی اونها فرار کنان ولملئت منهم رعبا درون پر می شد از اونها از نظر رعب یعنی چنان وحشت بدن ترم می گرفت فرار می کرد خدای از و یک بیم و یک رعب خاصی به اون غار داده بود هیچ کسی جرات نمی کرد نزدیک بره بر اساس همین آیه ابن عباس فرمود که نروید برای تماشای غار نروید که نمیتونی ببینید وحشت میشه اما قبول نکردند مردم رفتند تا اینکه حتی در بعضی روایت ها میاد بعضی از همین افرادی که رفتند بعد اونها را انداخت بعضی ها از بین رفتند بعضی زخم شدند بعضی کشته شدند ولملعت منهم رعبا الله تعالی میفرماید بعد از این که مدت گذاشت 300 سال تمام شد ما بلندشون کردیم بیدارشون کردیم وکذالک بعثناهم اینچینین ما انہا را از خواب بیدار کردیم لیت تسائلو لام لام عاقبت عاقبت و نتیجه این شد که از هم دیگه سوال می کردند از هم دیگه می پرسیدند قال قائل منهم کم لبستم یک گوینده گفت که چقدر اینجا شما ماندید اونا گفتند یک گروهی گفت قالو لبثنا یوما او ما اینجا ماندیم یک روز یا نصف روز گروه دوم گفت که این حد و گمان ها رو بذارید قالو ربکم اعلم و بما لبثتم ما نمیتونیم نظری بدیم رب شما بهتر میدونه چقدر ماندید میبینید درباره اینکه اصحاب کهف چند نفر بودند قرآن میگه اختلاف است بعضی میگن پنج نفر بودند بعضی میگن شش نفر بودند بعضی میگن هفت نفر بودند میگه کسی عددشون را نمیداند الا قلیل مگر تعداد کمی که اهل علم باشه میدونن ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید که من از همون قلیل هستم من از همون کم هستم همون که تعداد کمی میدونند علم دارم من یکی از اونها هستم گفتن خب پس شما میدونید چند نفر گفت بله گفتن چند نفر گفت که هفت تا بودند و هشتمی سگشون بود خب اما گذشته از اون سخن ابن عباس بعضی از علمای باریکبین و ظرافت بین از همین آیه استنباد کردن چند نفر بودند چطور قال قائل منهم گوینده گفت که کم لبستم این چند نفر شد؟ یکی یک نفره دیگه نه قال یک نفره سیغه مفرده قالو گفتند این قالو حد اقل چند نفره؟ سه نفر این سه نفر گفتند لبستنا یومن او بادیم چون سیغه جمع، جمع اقلش سه نفره این ستا باؤن یکی چند تا شد؟ چهار تا قالوا ربکم اون گروه دیگر که اونها حد چند نفر بودن سه نفر اونا گفتن ربکم آنمو بمالبستم پس اون سه و این سه و اون یک میشه هفت نفر علا ای حال فبعثو احلکم بوارقی کم گفتن یکی تون رب بفرستید همراه با این برگه برگه یعنی سکه با این سکه چون پول دیگه نلاشت همون رئیسشون پولکی داشت اون گفت این پول را بردارید این سکر را بردارید بریدی غذای بگیری بیارید به ورقی کمحازیه الی المدینه به شعر فلینظر ببین هر غذای نیارید انسان وقتی که مسیرش مسیر درستی باشد مسیرش مسیر درستی باشد سعی میکنه من حلال بخورم حاکیزه بخورم متاسفان خیلی از ما هستیم که رعایت نمی کنیم خیلی از ما این نکات را دقت نمی کنیم هرچی که باشه می خوری. اینا گفتن تو شهر بگردید از یک آدم مومن بگیرید خب بود که اون زمان کسی که حلال خار باشد کسی که گوشت پاکی داشته باشد غذا پاکی داشته باشد بعضی ها امروز خیلی بالاخره دنبال غذاهای پیش رفته هستند جوانی تعریف میکرد میگفت ما یک جایی رفتیم غالبا تو کشور امارات یا کشوری دیگری اون یک رستورانی بوده که همه نوع غذا بوده اونجا لیست را آوردند ما دیگه همون اسمی که گفتیم تا حالا نخوردیم همون غذا را بخوریم یک غذای بود که ما نمیدونستی چیه گفتیم این غذا رو بیار گفت که تعجب کرد گفت ببخشی شما مسلمانید گفت بله گفت اشکال نداری این غذا غذا حرامیه خوک بود چی بود گفت نه نه شروع خیل کردیم نمیخوایم این غذا را بعد از اون غذا معروف خواستیم یعنی ما اصلا گایی دقت نمی کنیم هر غذای باشه میگیم فقط باشه یه چیز جدیدی باشه اما نه همیشه جایی که میرید سعی کنی غذای پاکی بخورید غذای بی ای بی بخورید غذای که اون شایبه و شک نباشد لذا اینها گفتند فابعثو احدکم بورقکم هذه الی المدینه این سکی رو بگیر بره به یکی بره فلینظر ایوها ازکا طعاما ببین کدوم یک از اینها طعامشون پاکیز تر است فلیعت کن برزق من بیارد غذای ازون رزقی ازون یعنی غذای ازون بخره بیارد اما ولیت لطخ یعنی با لطافت با رکی ولا لا یشعرن بکم خبردار نشه نسبت به شما کسی مردم بفهمن شما اینجا هستید او وقت برای ما چی میمانه ما را از میبرند وقت تمام زحمات ما زایه میشه بهدر میره چرا؟ این مردم اگر مطلع بشن بر شما با خبر بشن که شما اینجا هستید یا جموکم شما را سنگسار میکنند از اینجا بعضی از اهل تفسیر گفتند معلوم میشه که در دین اون پادشاه هر کسی از بتپرستی برمیگشت او را سنگسار میکردند لذا اگر ببینند شما را سنگسار میکنند، کند او یعیدو فی ملتهم یا اینکه شما را بر به دین خودشون و لن تفلحو اذن ابدا بعد از اون هرگز شما رستگار نمیشید. اگر دوباره به دین بدفرستی برگردید به دین شرک, شرک برگردید دیگر کامیابی و رستگاری را نمی بینید برای همیشه فلک فلاکت زده میشید بدبخت میشید لذا الله عزوجل و جل میفرماید به این صورت ما مردم را متعلق کردیم که اینا اینجا هستند قرآن نگفته در ادامه داستان میاد که این فرد وقتی که رفت وقتی که رفت اونجا در شهر تغییراتی آمده بود اما این از بس که رعب و وحشت بود و ترس بود زیاد متوجه نشد یک کم و بیش متوجه شد این خدمت شما بگم یک نقطه ای که تغییرات امروز در زمان ما یک آمد در گذشته تغییرات زیاد نبود شما مردم ما رو نگاه کنید که دویست سال پیش زندگی کردند 200 سال پیش زندگی ها با 1200 سال پیش زیاد فرقی نداره تو چادری بوده چرت گوسفند بوده گندمی بوده بریان میکردن نان خوشکی بوده غذا قدیم هم همین بوده یعنی در زمان های قدیم زندگی های هزار سال پیش با هزار سال بعد زیاد تفاوت نداشته خون های شون ارز کنم در ناپختگی چادرهای زندگی گسفنداری و مالداری نوع پخت پز غذا غذاهای اکثر خام غذاهای بسیار معمولی در زمان ما اللہ عزوجل همین ست سال و دویست سال پیش یهو الله تعالی تغییراتی آورد دنیا چنان عوض شد چنان پیش رفت کرد چنان مترقی شد که اصلاً با 500 سال پیش قابل مقایسه نیست اما 500 سال پیش را با هزار سال پیش نگاه بکنید زیاد تفاوتی نمی بینید لذا اینا وقتی که رفت اونجا دید کمی به نظرش عجیب آمد رفت خلاصه اجتحاد کرد آخر یک ای که به نظر خودش اینجا آدم ظاهر و بود از او غذا خاص نان خاص غذا هر چی که طبق اون زمان بود غذای بیشداد داد پول را بیش داد پول را که داد اون تحجب که این چی بولیه نگاه کرد گفت که این را حتما این گنج دیده گنج پیدا کرده اون زمان هم مثل همین زمان گنج ها متعلق به حکومت ها بود نباید مردم استخراج می کردن گفت که این گنج را از کجا دیدی کجاست این گنج گفت نه این گنج نیست پول ما خودمون گفت این پول مال سی ست سال پیشه این سکه مال سی سال پیشه صدا زدن پولیس را معمور را مردم جمع شدند خلاصه آغا را دستگیر کردند بوردن پیش پادشا این دیگه دلش میل ارزید که کار تمام شد اما وقتی اونجا میره همه چیز را غیر از قدیم یافت تعجب کرد که اون پادشاه نیست، اون کاخ نیست، اون ماموری نیستن اون افراد هیچ کدوم نیست. ازو پرسیدند که پادشاه پرسید گفت که شما این پول راست کجا واردی گفت پول مال خود ماست. گفت این پول مال زمان دقیانو سے گفت مگه الان زمانی کیه؟ گفت الان زمان دقیانوس گذاشته. ما در همون زمان رفتیم به غار پناه بردیم کل ماجرار وقتی که تعریف کرد متوجه شد که الان انساناون انسانا, انسانا ها نیستند پادشاه دستور داد که کتیبه ها را بیارید چون قدیم هر اتفاقی میشد تو کتیبه می نوشتند کتیبه های زمان دقیانوس را بیارید اون زمان کتیبه ها را آوردن همین طور که الان هر اتفاقی میفته شرح حال را گزارش را تو کلانتری تو پاسگاه منویسند می نویسند که فلان اتفاق فلان ساعت افتاد فلان انسان تلف شد فلان تصادف شد لذا نوشته بودند که هفت نفر به نام های فلان فرزندان فلان رفتند و ناپدید شدند و هرچی گشتیم پیداشون نکردیم پادشاہ گفت سبحان الله پس شما اینهایی هستی که تو تاریخ ما هم هست و شما رفتید از دست اون پادشاه پرست که دینتون را حفاظت بکنید امروز شما را مجده باد امروز تمام حکومت بر دین شما است چون بعدن در تحولات بعدی رومی ها حمله کرده بودند تو تاریخ ما میخونیم که این شهر را شهر را تصرف کرده بودند و دین بودپرستی را از بین برده بودن تمام مردم آینشون و مذهب رسمیشون مذهب یک و خداپرستی بود گفت الان همه بر دین شما هستیم بودپرستان الان در اقلیت هستند کجا هستند رفقای شما همه شهر جمع شد و با این فرد با این یک, نات، یک جوان رفتم به طرف غار رفتن اونجا وقتی که بغار رسیدند فرستادن رک رفقاش را بیاره اون یکی رفت به دوستانش گفت دوستان خبر ندارید از دنیا در دنیا انقلاب آمده تغییر آمده انسان ها عوض شدند ما را خداوند لطف کرده به ما ما را حفاظت کرده از اون زمانی که ما اینجا خوابیدیم 300 سال گذشته الان اثری از اون دشمن های ما نیست اثری از بود پرستانیست اثری از دقیوس یا دقیانوس نیست الان پادشاه دیگری هست به نام بدروس هست الان همه مردم خدا پرست و یک پرست مردم آمدن پایین منتظر شماستن اینا بالای کوه بودند بریم پایین پیش مردم لذا همه این اصحاب کف آمدن پایین و اینجا با مردم ملاقات کردند دیدار کردند فوق العاده مردم خوشحال شدند و پادشاه ترتیبی داد همینجا زیافتی ترتیب داد و بعد از اون از اینها خواهش کردند که میریم اونجا شهر زندگی میکنیم اینها گفتن نه خانه ما همین غار هست. ما از این جا نمیایم این جا را که خدای عزوجل برای ما چنین کرامتی بخشیده و در این جا را, این جا را برای ما پسندیده ما هم از این جا متحول نمیشیم به جای دیگه منتقل نمیشیم بالاخره بعد از این اینها رفتند تو غار و مردم رفتند به شهر و مردم گفتند ما همیشه می پیش شما از خدمت شما استفاده میکنیم فیض میبریم شما قدیسان هستید انسانای مقدسی هستید انسانهای پاکی هستید چنین کرامتی خدا به شما داده چنین لطفی اولیای الهی هستید تا اینکه بالاخره اونها رفتن بار دوم وقتی که میخواستن بیاند و نمیتونستان اونجا بالای کوه برن دنبالشون فرستادند کسانی که رفتن دیرن سبحان الله اینها الان دیگه زنده نیستند همه اینها فوت کردن الله تعالی موتشون را مقدر کرده بود در همون غار خوابیده بودند به خواب ابدی رفته بودند پادشاه را خبر دادند همه مردم گریه کردند داد و فریاد کردند که خدا این نعمتها را به ما داد چطور زود از ما گرفت اینجا وقتی که آمدن پادشاه گفت ما اینها را جای دیگه منتقل نمی کنیم اللہ عز و جل این غار را که برای انها انتخاب کرده همین ان غار را ما به عنوان قبر اینها غار را بست و گفت که ما در این کنار غار ورودی غار یک مسجدی درست می کنیم بد پرستا گفتن چونکه اینها از زمان ما بودند از آین ما بودند گرچه بعدن مسلمان شدن یک پرست شدن حق معلوم است اینجا معبدی درست میکنیم اما پادشاه اجازه نداد گفت اینها موحید بودند اینها یک پرست بودند اینجا ما مسجدی درست میکنیم که خدا را عبادت کنیم بالاخره مسجدی درست کردند گرچه در شریعت های گذشته مسجد را کنار قبر ها درست بود که می درست می اما در شریعت ما کراحت دارد جایی که قبرستان هست اونجا بالاخره محل نماز نیست محل دفن کردن است. بهتره که در قبرستان ها مسجد ساخته نشه و اگر مسجدی ساخته شد با فاصله طوری ساخته بشه که جلوی مسجد قبر نباشه که این تواهم ایجاد نشه که این نماز و سجده برای قبور انجام می گیره لذا الله عز وجل به این صورت این جوانان را بیدار کرد و بعد از بیداری دوباره موت داد و موتشون ابدی شد در اون غار استراحتشون را انجام دادن زیرا ببینید کلمات قرآن را الله می فرماید وكذلك أعثرنا عليهم إن قنم مطلع ساختي مردم رب العنان ليعلموا أن وعد الله حق تاكب بداناً كي همانا الله حق هست وتاكب بداناً كي بدا وأن الساعة لا ريب فيها قیامت می آید و در قیامت نیست همون طور که این جوانان را بعد از سی سال الله بیدار کرد ما انسان ها را بعد از مردن هم الله بیدار می کنے اید یتنازعون بینهم زمانی که انها باهم نظامی کردن با هم اختلاف داشتن خدا پرستان و بد پرستان فقال بنو علیهم بنیانا ایدی تنازعون بینهم امرهم درباره امر اونها درباره مساله اون اون جوان که چکار بکنن فقال ابنو عليهم بنيانا گفتم بر اون بنیان بنای درست کنید کنید ساختمان یک قبه درست کنید ربهم اعلم بهم رب بهتر میدونست قال الذين غلبوا على امرهم کسانی که بر امرشان غالب شدند یعنی پادشاه و یک تاپرستان گفتند لنتخذن عليهم مسجدا حتما حتما ما بر آنها درست میکنیم مسجدی را اونجا مسجدی میسازیم که خدا را عبادت کنیم نه اینکه غیر خدا را بالاخره مسجدی ساختند لنتخذن عليهم مسجدا نعبد الله چنان مسجدی که خدا را عبادت کنیم و نس تبقیع آثار اصحاب الكهف به سبب ازایک المسجد آثار اصحاب الكهف را باقی بزاریم به سبب همین مسجد. ببینید نکته ای که خدمت شما از بکنم اینه که این اصحاب الكهف اینکه در رابطه با اینها اینقدر اختلاف وجود دارد. یکی میگه این کف در شرق یکی میگه در غرب یکی میگه در غرناطه هست یکی میگه در اندلسه یکی میگه در ایلا هست دیگری میگه در ترسوسه در افسوسه الله میدانا تو اینم حکمتی است تو این هم حکمتی است بسیاری از قبور معلوم نباشند بهتره مجهول باشند چون مردم متاسفانه حد و مرز محبت را نمیدونند و میرهند عبادت میکنند از قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم قبور بقیه انبیا زیاد مشخص نیست. به صورت زنی و احتمالی میگه انجام یا خیلی از بزرگان مثل قبر سیدنا علی مشخص نیست. یک گروه میگه در نجف هست. یک گروه میگه در مزار شریف افغانستان هست. یک گروه میگه در جای دیگه هست. بلاخیر خیلی از قبور همینطور نامعلوم هستن، مشخص نیستن، لذا بعضی از تفسیرها دیدم که نوشته الله عزوجل آثار این مسجد و آثار این غار را اصلا از بین برده هیچ که نمی کجاست، حکمت تو همینه مردم نرون که مردم نروند اونجا، اینایی که به خاطر توحید رفتند، مردم نروند اونجا دعا و نیایش و سجده و عبادت نکنند، ا حال الله می فرما سقول مردم با هم اختلاف دارند این در زمان رسول اللہ است یودی ها بقیه ان قریب می گند نفر بودند را رابعهم کل چارمیشون سگیشون وقولونه خمس بعضی میگویند که پنج تا بودند سادسهم هم کل به سگیشون هست. رجمن بالغه این رجمن بالغی متعلق به هر دو هست یعنی یک تخمین غایبانه میزنند سنگ میاندازن همین طور در تاریکی منظور اینه که بدون تحقیق معلوم میشه این دو قول قول درست نیستن که اینا قرآن قران خودش گفت رجمن بالغیب اینکه بعضی میگن سه تا هستن چهارمی یا پایینتا هستن ششمی سگه این حد قول رجمن بالغیب است اما ویقولون سبعت و ثامنهم کلبهم این اشاره دیگر که این هفته درست اینجا رجمن بالغیب نگفتی نه بعضی میگه هفت نفر هستند هشتمیشون سگشون هست الله میفرمه قل ربی اعلم بعدتهم بگو رب من بهتر میداند تعداد انها را چند نفر بودند ما یعلمهم الا قلیل نمیداند ادد انها را مگر قلیل میداند تعداد کمی از علماء میدونند این تعداد کم عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود جزی همین ها هستن که عدد را میدانستند. فلا تمار فیهم الا مراءا ظاهرا اما الله عز و جل بپیانبر توسیمی کنے که در این و بحثاں که تا هستند چگونه هستند وقتتون را ضایع نکنید بعضی از بحث ها واقعا بحث های پوچی هستند بعضی از مردم مباحثه میکنند تو مباحثی که اصلا این مباحث جز مباحث اعتقادی نیست مباحث اصلی نیست مباحث فرعی هست وقت را ضایع میکنند میرن هر کی سس شب کتاب مطالع می کنم پیرامون فلان مساله که مستحب یا مستحب نیست مثلا ما باید دنبال مباحث اصلی ایمانی اعتقادی مباحثی که مدار نجات ما بر اونها است نه مباحث فرعی و جزئی مثلا الله می فرماید فلا تمار فیهم فلا تمار یعنی فلا تجادل در اینها جدال نکن درگیر نشو الا ان ظاهر مگر بحث ظاهری فقط همون نظرت را بگو وَلَا تستفی تَسْتَفْتِ فِيهِم من مِنْهُمْ عَهَدًا و همچنین درباره این جوانان استفتا نکن سوال نکن از یهودی ها از هیچ کسی اینا علمشون همیش دروغه همیش بر اساس زن و گمانه تخمین و حد و اندازه بی جاست وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنْ إِنِّي فاعل ذَلِكَ غَدًا در وسط خداون جمله موترزه تذکری هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از ایشون سوال کردن در رابطه با اصحاب کهف و روح و زلقرنن گفت که فردا جواب میدم بدون اینکه ان بگه الله فردا من این کار رو میکنم الله عز وجل از این جمله راضی نشد که فردا جواب میدم بدون اینکه ان الله بگویت خداوند عز وجل فردا برایش واحی نفرستاد پس فردا هم نفرستاد روز سوم هم نفرستاد تا پانزده روز بر رسول الله و نیامد خیلی رسول الله ناراحت شد خیلی سنگین شد مشرکین هم خندیدند اما بعدا وحی آمد الا رحم الله تعالی بیان فرمود ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا هرگز هرگز نگو به هیچ چیزی که من این را فردا انجام میدهم اینی فاعل، ذالک غدّن من انجام دهنده انکار استفردا، الا ان الله مگر خدا بخواهد یعنی انشاء الله بدون انشاء الله نجو وذکر ربّک اذا یاد کن ربّت را اگر فرا فراموش کرده زرو فراموشی بود بعدا که الله وقل ايه يهديني ربی لاقرب من هذا رشد بگو که نزدیک هست که مرا راهنمایی بکند ربی من لاقرب من هذا رشد نزدیک تر ازین یعنی به چیزهای بهتری از نظر راهنمایی رشد هدایت راهنمایی یعنی خدای عزوجل مرا بهتر راهنمایی بکنه نه تنها بس حساب کافی چیزهای دیگه هم هست لذا الله تعالی الان در این آیه مقدار مندنشون را بیان می فرماید چون یک سوالشون اینکه چقدر ماندند الله می فرماید وَلَبِثُو فِي كَحْفِهِمْ انها ماندند در غارشان سلاس مئت سنین سی سال وزدادو تسعا و نحتار اضافه کردند و نحتار اضافه کردند یعنی چه ببینید سیصد سال ماندند 9 تا بر سیصد اضافه کردند اگر قرار خداون بفرماید سیصد سال می فرمود اگر قرار است که بفرماید سی تا می فرمودند سلاس مئت و سنین و یعنی سی سال سلاس میا و اما چرا اللہ تعالی فرمود سلاس میا سنین و ازداد و تسع علماء نوشتند که این جمله جمله بسیار عالمانی هست در واقع جواب شبه هست اگر خداوند می فرمود سال خب اونها اگر با کمری حساب می چون هر سی سال یک سال اضافه می شه می گفتن نه سال بوده اگر می گفتن سی سال اونا می گفتن چی؟ سی سال لذا الله عز و جل طوری بیان فرمودند که دفع دخل مقدر بشه هیچ اشکالی پیش نیاد خداوند فرمود سی سال یعنی از حساب شمسی و اگر از حساب قمری بگیم دو و نو تا دیگر اضافه کردن با توجه به حساب قمری که میشه 309 سال. قل الله اعلم بما لبثوا. بگو هر چقدر حد الله بهتر میداند چقدر ماندند. خدا بهتر میداند چون اونها غیر از این سنوات دیگری را میگفتند سال های دیگری را اگر میگفتند اللہ تعالی می فرمات کہ اے بھائی انبر بے بگو خدا بہتر میدونه چقدر ماندن وقتی خدا میگه 309 سال شما نمیدونی خدا میدونه حرف خدا درسته حرف شما نادرسته قل الله اعلم بما لبث له غیب السماوات والارض این دلیل اعلمو هست فقط و فقط برای الله است غیب آسمان ها و زمین الله از همه مغیبات میداند اپسر بهی و اسمع چه قادر این ذات بیناست و چه قادر شنواست الله عزوجل همه چیز رو میبیند همه چیز را میشنود ما لهم من دونه من ولی بغیر از الله هیچ کسی برای اونها حامی نمیتونه باشه ما لهم نس برای انسانها غیر از الله هیچ حامی هیچ ناصری ولا یشرک فی حکمه احد و با خدا در حکم خدا هیچ کسی شریک نیست هیچ کسی در حکم خدا شریک نیست یعنی چه بعضی گفتن که مراد از حکم علم غیب هست چون بحث له غیب السماوات شما خندید در این علم غیب هیچ کسی شریک خدا نیست خدا یگانه هست در علم غیب عالم الغیب فقط خدا هست حتی رسول الله نمیداند به رسول الله خدا میگه ای پیغمبر من تو بگو ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر و وما مس نسو اگر من غیب میدانستم، من خیلی از خیر برای خودم جمع میکردم و هیچ آسیبی به من نمی رسید ولی کلی من ضرر داره می کنم چون غیب نمی دانم اگر غیب میدانستم مثلا ارز می کنم در جنگ اهد از پشت ضربه نمی خوردم از پشت حمله نمی کردن جلوی اون کوه را می گرفتم ولی غیب نمی دانم اگر غیب میدانستم بهترین بهتری یاران خودم را به دست منافقی نمی دادم که اونا گفتم مامی بریم مرا درس بدن افتار نفر را بردن شهید کردند اگر غیب میدانستم این همه مشکلات و تحولات برای ما نمی آمد ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر لذا ولا یشرک في حكمه احد یعنی لا یشرک في علم غیبه احد در علم غیب با خدای عزوجل هیچ کسی شریک نیست و بعضی گفتن ولا یشرک في حکمه یعنی ولا یشرک في قضائه در داوری خدا در فیصله خدا هیچ کسی با خدا شریک نیست این تا اینجا بحث اصحاب کهف بود داستان اصحاب کهف بود که الله تعالی بیان فرمود این داستان تمام شد و بعد از اون الله تعالی مطالب بسیار زیبا و مطالب آموزنده و نقض دیگری را بیان می‌فرماید که ان ما در درس‌های بعدی می‌خونیم اما خلاصه می‌خوام عرض بکنم ببینید عزیزان برداشتی که ما داریم اولیاء خدا اونهایی هستن که خدا بهشون کرامت میبخشه مثل اینها ببینی اولیاء خدا نه قدرت داشتند نه علم غیب داشتند قدرت نداشتند میترسیدند میگفتا اگر شما را دستگیر بکنند سنگسارتون تو میکنه خبر ندارن از خدا خداوند از بالا برایشون فیصل خیر کرده معلوم میشه که ولی هستند ولی تصرفت اولیان نداره خداوند داره و بعد علم غیب هم ندارند خبر ندارن که در این زمانی که ما خوابیدیم این همه تحولات آمده لذا اصل این خداوند این داستانها را این مسائل را بیان می‌فرماید خداوند در اینها برای من نکات ای بیان فرموده که باید از این نکات آموزنده ما باورهای من را اعتقاد من را ایمان خود من را اصلاح بکنیم و همچنین داستان غار اصحاب کف یک نمونهی هست برای غاری که رسول الله صلی الله علیہ وسلم همان گونه که اونها را خداوند در غار حفاظت کرد رسول الله را هم الله در غار حفاظت کرد مشرکین آمدن بر لب غار قرار گرفتند ابو بکر صدیق میگوید اونا را خدای تعالیت چشمایشون را به جاهای دیگه خیره کرد ما از پاین اونا رو می دیدیم اونا همین که به پایین نگاه می ما را می دیدن. ولی خدا توفیق نداد این طرف نگاه کن اون طرف نگاه کن پایین را نگاه نکردند. خداوند رسول الله را همچنین درغار حفاظت کرد لذا این هم یکی از موجزات و یکی از کرامت حاست و اطلو ما اوحی ایلیک من کتاب ربک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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلزَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطُرًا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالمهل يشف الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا در آياتی گذشته واقعی اصحاب کهف را خاندیم که این جریان و این داستان بسیاری از شبهات را و بسیاری از اشکالات را پاسخ داد اشکالاتی که در رابطه با اصحاب کهف بودند هم سوالاتی که متوجه رسالت بود مشخص شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعتا نبی خدا رسول خدا و آنچه که میگویند از طریق وحی میگوید و همچنین مشخص شد شبهاتی که در ارتباط با توحید بود که اینها گرچه اولیا الهی بودند دوستان خدا بودند ولی نیازمند پروردگار بودند وقتی که از شهرشون خارج شدند هم خدا را فریاد زدند معلوم میشه که قدرت نداشتند قدرت قدرت خداست و وقتی که در غار خوابیدند، بعد از مدتی هم نمیدونستند چند روز خوابیدند. یک روز روز را حدث می زدند. معلوم میشه که علم غیب هم نداشتند علم غیب هم خاصه خداست بعد از این الله تعالی دستور می به پیامبرش که این آیات آیاتی که در واقع روشنگری می کند آیاتی که بیانگر توحید هست آیاتی که از این آیات رسالت تو اثبات میشه، این آیات را کماکان تلاوت کن و به تلاوت ادامه بده وطلو ما اوحیه الیک من کتاب ربک آنچه که وحی می تو از کتاب ربت و کتاب پروردگارت بخان بر آنان تلاوت کن لا مبدل لکلماته کلمات الهی و وعدهای پروردگار وعدهایی که در این آیات داده برای منکرین آیات برای منکرین توحید عذاب هست گرفتاری هست هم در این دنیا و هم در آخرت اون کلمات تغییر نمی پذیرند و اون کلمات جابجا بجا نمی شوند یعنی وعده الهی تبدیل نمیشه شه و لن تجد من دونه ملتحدا و هرگز بجز از اللہ پناهگاهی هم نمی یعنی هر کسی که به آیات الهی پشت بدهد او نمی تواند پناهگاهی دیگری برای خودش بغیر از اینکه پناهگاه خود الله را قرار بده و به خدا پناه ببره دیگه پناهگاهی نخواهد یافت و همچنین به پیغمبر دستور داده شده که ای پیغمبر من شما تحمل کن و در کنار همین دوستان و رفقا و اصحابت باش در کنار رفقای فقیرت باش دوستان و یاران بی بزاعتت باش با همین ها کن تحمل کن اصلش اینه که اینجا چندین داستان نوشتن که خلاصه همه یکی هست بعضی نوشتن که عوینب بن حسن و اقره ابن حابس دوتا از سرداران کفر بودند، سرداران مشرکین بودند. اینها یک روزی آمدند می با رسول الله صلی الله علیہ وسلم بشینند دیدن که در کنار رسول الله سلمان فارسی هست ابوذر غفاری هست بعضی از صحابه فقیر و صحابه نادار هستند اینا گفتن اگر تو میخوای که ما بیائیم با تو بشینیم با تو جلسه داشته باشیم اینا باید نباشند یعنی نوع غرور و نوع تکبر ما بالاتر هم از این که از اینکه با این فقیر فقرا بشینیم. بعضی میگه امیه بن خلف به رسول الله یک روزی گفت اگر دوست داری که قومت قریش بیاد حرف تو را گوش کنه و تبلیغ تو را گوش کنه باید این فقرا را از اطراف دور کنی وقتی که اینا میایند اینا آدمای با شخصیتی هستند اینا سردار و رئیس و هستند اینا وقتی که میایم باید داروبریت اینا نباشند. برای ما ای هست، آر هست که ما بیاییم با اینها یه جا بشینیم. و بعضی های دیگری شبیه این داستانی، اینا همه تر روایت های تفسیری آمدند. خلاصه این داستانها اینه معلوم میشه که مشرکین و سران شرک مطالباتی از آن حضرت صلی الله علیه وسلم داشتند، مبنی بر این که برای ما باید جلسه ویژه تشکیل بدهی، جلسه اختصاصی که در کنار ما این فقران نباشند عبداللہ ابن مسود نباشه بلال نباشه ابوذر نباشه سلمان نباشه که ما شخصیتیمون نمی که با اینها یک جا بشینیم کسی که این غد تکبر داشته باشه بدان که اون ایمان هم نصیبش نمیشه دو چیز با ایمان شما خاندید در تمام قرآن باید این یاد گرفته باشید دو چیز با ایمان در تضاد دے یکی تکبر یکی تعصب یکی انسان تکبر داشته باشه این ایمان نمیاره و یکی تعصب داشته باشه که چرا از فامیل من نیست از قوم من نیست الان مشرکین که ایمان نه آوردن رسول الله از قوم خودشون بود اما تکبر میگفتن که ما بیایم ایشون که از اون خاندان سرداری نیست ما بیایم الان تابع ایشون بشیم ایشون بشه مقتدا ای ما پیشوای ما ما بشیم مقتدی ایشون این براشون قابل تحمل نبود اینا تکبر از خود نشان دادن یهودی ها در حالی که می شناختن رسول الله رسول خداست تمام علایمی که در تورات بود مسیحیان تمام علایمی که در انجیل بود میدونستند. اما تعصب نگذاشتون هارا گفتن ما فکر کردیم از قوم خود ما از بنی اسرائیل میشه. چرا از بنی اسرائیل آمد نه؟ ما غیر از قوم خودمون هر کسی باشه به باش ایمان نمی آری. است تعصب و تکبر همیشه نمیذاره انسان ایمان بیاد اینها همین درخواست را دادند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا اراده کردند که برای خودشون بر نظمی درست کنن تا وقتی که سران میایند فقط اونها باشند کسی از این فقیر فقرا نباشد. هنوز اقدامی نکرده بودند که الله عزوجل عکس نشان دادند الله فرمود نا بهیچ وجه شما با همین فقرا بمان صبر کن ادامه بده در آیه دیگه شما خواندید الله فرمود ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ای رسول من ای حبیب من ترد نکن از خود دور نکن اون مؤمنین مخلصینی که الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم بِالْغَدَاتِ والعشي صبح و شام خدا را صدا می زنند یعنی علت دوام خدا را فریاد می زنند خدا را زاری می کنند چرا؟ یوریدون وجههو اونها اراده دارن رضای پروردگار را طالب رضای پروردگار استن مباده اینها را از خود دور کنی مباده اینها را از خود برهانی که در ادامه اون آیه است فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ من الظالمین. بِالفرض اگر این فقرارا از خود ترد کردیم این فقرار از خود دور کردی ظالم میشی از ظالمین میشی چه کلمه سختی چه تذکر شدید و لحنی محلوم میشه که اصحاب و مؤمنین مخلصین چقدر محبوب خدا هستند الله چرا دوستشون داره که حتی بهترین پیامبرش را چنین تذکر میده لذا اینجا هم الله می فرماید واصبر نفسك یعنی نفس ترات به صبر وادار کن به صبر تلقین کن که صبر کند مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي هم ربونه‌ای که يدعون ربهم می خانند رب خودشان را فریاد می زنند رب خودشان را بالغدات و العشی صبح و شام یعنی ال الدوام آل الدوام همیشه اونها خدا را صدا می زنند چرا یورید و نوجه او آنها اراده رضای الله دارند با همینها صبر کن با همینها زندگی کن با همینها نشست و برخواست داشته باش یاران تو دوستان تو همینها باشند رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اخر با همین ها گذراند ولا تعد عیناک عنهم یعنی چشمان خودت را از اینها به سمت دیگه نبر ولا تعد بر نگردن چشمانت را منظور از چشم یعنی توجهات خودت را توجه خودت را عنایت خودت را التفات خودت را از اینها به سمت دیگر نبر می خواهی چکار کنی تورید و زینت الحیات دنیا اراده زرق و برق زندگی دنیا داری تجملات دنیا داری این مشرکین فقط قوارشون خوبه فقط دکورشون خوبه تیشون خالیه درونشون کفره درونشون شرکه درونش نجاست هست شرک نجسه نا انما المشرکون نجسون لذا اینها این این جماعت پاکان را که در درونشون ایمان است، تقواس اینها را از خود دور نکن، تريد زینت رحیت دنیا، اراده زینت و زیبایی زندگی دنیا داری، اینها فقط دنیاشون خوبه. ولا تطيع من أغفلنا قلبهو عن ذكرنا والتابعهوا و ببین اطاعت نکن از اینایی که این پیشنهاد را میدن ارز کردم سران کفر این پیشنهاد را دادند مشرکین این پیشنهاد را دادران میفرمای اینها را می اطاعت این نکن اینی که قلبش غافل از ذکر ما از یاد ما یعنی تو قلبش خدا نیست تو قلبش یاد خدا نیست تو قلبش دنیا هست و گاو خرست به اصطلاح معروف این را اطاعت و لا تطع من اغفالنا قلب او عن ذکرنا اطاعت نکن امکسیک ما غافل کردیم قلب شر از ذکر من و تبع هوا و امکسیک پیرایی کرد از خاهاشاتش امکسیک از خاهاشاتش پیرایی میکنه شما او را پیرایی نکن و کان امره فرطا امر او و کاری او بر اساس افرات است زیاده روی است تندروی است شرک و کفر له ذشنین مشرکین و کفاری را هرگز اطاعت نکن به خاطر آنها توجه نکن حرف آنها را اصلاً بیش توجهی داشته نباش و قل الحق من ربکم ان الله عز و جل با بینیازی مسئله دعوت را دعوت توحید را مسئله ایمان را مطرح می‌فرماید. ایمان آوردن بازاری تزر رو که دستش را بگیر بخاطر خدا بیا ایمان بیار. نه اینها حق را شما عرض کن حق را شما عنوان کن و به اونها نشون بده. بگو حق از جانب الله است منظور از حق یا قرآن یا توحید هر کسی دوست در ما بزر کسی را نمی خاید مؤمن بشه هر کسی دوست در ایمان بیاره هر کسی دوست نه در کفر کند ولی عاقبتش را بسنجد لذا الله تعالی میفرماید ای پیامبر من نیازی نیست که شما برای آنها جلسه خصوصی تشکیل بدید نیازی نیست که شما این بهترین یاران و ترین یاران خودت را از خود دور کنی به خاطر آنها بلکه به آنها اعلام کن و قل الحق من ربکم به آنان بگو حق از جانب ربتان هست رب حق را فرستاده که شما ایمان بیاریید حق یعنی راهی حق دین حق مسیر حق کتاب حق همه اینها حق قرآن حق توحید حق ایمان اسلام دین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر هر کسی می خواهد ایمان بیاورد ایمان بیاره و من شاء فلیکفر هر کسی می خواهد کفر کند کفر بی کفر بکنه اجباری نیست ولی فقط اینو بدونید اِنَّا آتَدْنَا لِلزَّالِمِينَ نَارَا همانا ما آماده کردیم ما مهیا کردیم برای ظالمین یعنی برای کافرین و مشرکین چنان آتشی که احاط بهم سرادقها اونها را احاط کرده سرا پرده ها آتش آتشی که سرا پرده سرادق از کنم که پرده را میگن یک چیزی که احاطه بشه محاصره بشه با پرده ها با خیمه با چر دیوالی اون را سر میگن یعنی ما این ظالمین را مشرکین را به وسیله دیوارهای های احاطه کننده یا پرده ها و خیمه که این خیمه و پرده اصلی از جنس آتش است اینها را ما احاطه کردیم اونجا چنان می و این یستغیثو اگر طلب فریاد بکنن فریاد رسی بکنند بگویم بدا ما ما برسید یغاسو فریاد رسی به ما بما انکل محل به آبی که مثل فلز گداخت شده هست محل می گویم فلز را سرب را وقتی که روی آتش می گزارند و بعد ساتھا زوب می شه اون چقدر است؟ این بر اون میریزند که یشف الوجو چهرهارا کباب بی وقتی که بهش، یعنی این آب را می خورد این آب را سر بی کشد چهرهش فورا کباب بیشه بیس شراب نوشی بسیار بدی هست وساعت مرتفقا جای استراحت هم بدی هست ارتفاق میگن جای که انسان راحت بکنه یعنی جای جا راحتی نیست جهنم آتش جای جا راحتی نیست پس اختیار خودتون دارید راه کفر اختیار میکنید اختیار کنید خداوند ایمان اجباری نمیخواد ولی حسابش را بکنید فردا چه خبری براتون بارها خدمت شما عرض کردم که در دین اسلام ایمان اجباری مطلوب نیست ما هیچ وقت جهاد نمی کنیم به خاطر اینکه کافرها ایمان بیارن نه ایمانی که بالاجبار باشه اون ایمان بدرد نمیخوره. نمی خورے. خدا تعالی خودش می تونه ما را تمام انسان ها مجبور به ایمان بکنه اختیار را سلب بکنه به انسان ها اختیار نده هر کی قوتی داده بنام اختیار اون اختیار را سلب بکنه انسان را بگه باید این مسیر را ببری خود به خود انسان مسیر ایمان را میگیرد به صورت خودکار مثل فرشتها فرشتها به از ایمان رای دیگه ندارند اونا اختیاری اصلا ندارند که راای دیگه اختیار بکنند این ایمان که ایمان اجباری باشه خدا میتونه این نوع ایمان را بر ما تحمیل بکنه ولی اگر این ایمان بر ما انسان ها تحمیل بشه اون وقت به درد نمیخوره خدا میخواد ایمانی که انسان بر رضایت خودش با اختیار خودش انتخاب بکنه اون وقت دنیا هم دار امتحال نمیشه اصلا فلسفه وجودی دنیا از بین میره خداوند عزوجل دنیا را دار امتحان قرار داده در صورت دار امتحان هست که هر کسی اختیار داشته باشه دیگه من و شما کسی را مجبور نکنیم اگر مجبور بکنیم که تو ایمان بیار اون وقت پس چرا خدا دنیا را پیدا کرد دنیا برای امتحان است و لازمه امتحان چیه اختیار است پس اینجا هم خداوند فرمود که شما معارف را دین را قرآن را عرض بکن هر کسی ایمان آورد ایمان آورد هر کسی نی آورد رای کفر انتخاب کرد انتخاب کنه فقط از عاقبتش بهش بگو اِنَّا اعتدنا لِلزَّالِمِينَ نَارًا احاط. بهم. على ای حال ان, ان تخویف بود و تهدید بود برای اهل کفر و اهل شرک اما اگر کسی ایمان آورد فمن شاء فاليؤمن با اختیار خودش ایمان آورد تکلیف چی میشه الله می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هم انا انها ای کی ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ان لا نضيع اجر من احسن عملا هم ما ضایع نمیکنیم اجر هر اون انسانی که عمل خوب انجام میده عمل نیکو انجام میده ضایع نمیکنیم هر کاری بکنه اجرش بهش میرسه چپاداشی خدا برایش در نظر گرفتے اولائک لهم جنات عدن این افراد برایشون جنات جاودانه هست بهشت جاودانه هست جنام بهشتی کی تجری من تحتیم الانهار از زیر درختها و از زیر قسرائش نهرہ جاریس یحلون فیها من اساور من ذهب آ راستی می در آم بهشت یو حلون آ را میگن، گن آ راستی می بهشت من اصابر از الانگوها و دست بندهایی که من ذهب از تلاست این تقیداتی که در دنیا است انجا برداشته میشه می شے شما مغید نیستی که اجازه نداری طلا استفاده کنی در دنیا اجازه نداریم اجازه نداری حریر و ابریشم استفاده بکنی نه اونجا برعکس بهترین لباس ها همین ها خواهند بود به هر انسانی از بهشتی ها اینجا در دنیاش از زیبا جلوه نده برای مرد که النگو داشته باشه دستبند چون اینجا یه ذهنیت خاصی شما دارید اما اونجا نه اونجا بسیار زیبا است همونطور که اینجا ما ساعت های گران قیمت و طلای به دست میگیریم چقدر زیباست اونجا از این هم زیباتر یحلون فيها من اساورا من ذهب الانگوهای که از تلا هستن با اون الانگوها آراست می و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و می پوشن لباسای سبز رنگی که از حریر نازک هستن سندس حریر نازک و استبرق حریر زخیم هستن ابریشم شمع هستن متکئین فیها علی الارائک اونجا تکید آدم بر تخت ها و روبروی هم دارن صحبت میکنن نعمت ثواب چه پاداش زیبایی هست پاداش بسیار زیبا اجر بسیار زیبایی این بهشتی که به بهشتی ها داده میشه و حسنت مرتفقا از نظر استراحت و آرامش جای بسیار زیبایی هست بهترین استراحتگاه هست برای انسان و اضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب و حففناهما بنخل اینجا خدا تالی یه مثال بیامی فرماید این مثال ربطش با گذشته چی؟ ما در آیات گزشتی خواندیم. که مشرکین میگفتند هر وقتی که ما میاییم سران کفر میگفتند هر وقتی که ما میاییم اینجا فغرا نباشند یعنی از دید اونها عزت انسانها با با مادیات هر کسی پول زیاد داشت او عزت منده اینا چون پول ندارن اینا عزیز نیستند اینا را علی ااظ زلیل ذلیل میدونستند الله عزوجل اینجا مثال بیان می میفرماید و گویا به این مشرکین گوش میشه که بیچاره اون چیزی که تو باعث عزت میدونی یک شبه از دست انسان میره یعنی به این دنیا دل نبندید و این را باعث افتخار ندانید اگر خدا داد نعمت خداست استفاده کنید ولی تکبر نکنید مغرور نباشید و این رس موجب نباشه که این دنیا سبب خدا فراموشی شما بشه از خدا دور بشید لذا الله عزوجل در این مثال بیان میفرماید دو تا برادر را دو مرد را علا مفسرین گفتن که داستانهایی هم ذکر کردن ولی قرآن میگه فقط دو مرد بودند میگوین در مناطقی از یمن بودن اینها اینها دو تا برادر بودند که یکی سرمایدار بود و یکی نادار بود یکی با آدم های بزرگ و آدم های بظاهر آبرومند می نشست همیشه هم هم مجلسی هایش آدم های کلان کلام بودند بزرگ بزرگ بودند کسانی که سردار بودند سرمایدار بودند صاحب نام و شهرت بودند اون برادر دیگه فقیر بود او را کسی تاویر نمی گرفت او با دراویش ترکار داشت این برادر به صورت مغرورانه به او گفت که ببین من چه عزتی دارم مال هم مالم بیشتره هم اطرافیانم بیشتره اطراف من همیشه شلوغه، همیشه خانه من پر از مهمانه دوستانم هم،, دوستان هم چید شخصیت هایی همیشه دورباری من هستند ولی تو چی داری؟ با تو کی هست؟ اطراف تو چند نفر هستند؟ و این برادر کوچکتر مال نداشت ولی دین داشت فهم داشت عقل داشت او را نصیت کرد گفت که مغرور نشو مغرور نشو که این غرور انسان را میزنه قیامتی هست او میگفت نه کی گفت قیامتی هست قیامتی نیست اگر بلفرض باشه همون ان اینجا انجا من توپه من خوبه اونجا هم خوب خواهد بود ونجا واضح تو اونجا واضح تو اونجا تو اونجا لذا الله عز و می فرمای ببین وقتی که غرور آمد چطور یک شبه همین چیز را از دست داد وضرب لهم مثل الرجولین بیان کن برای انها این که افتخارشون چیه مالشون هست این که بگم ما با و غرار شینیم چیم برای ما آره برای ما کلاس ما پای میاد کہ ما با انہا ہم نشیم باشیم ہم مجلس باشیم اللہ می فرمایت بیان کن برای ہم مثال دو نفر را دو مرد را جعلنا لأحدهما جنتین بییکی ما داده بودیم قرار دادی بودیم برای یکی تا باغ دو باغ داشت من اعنابن هر دو باغ از انگور بودند ارز کردم صبح هم که بهترین باغ از نظر اربا همین ها بودند و این دو میوه تمام مشروبات را هم از انگور هم از خرما جعلنا ما جنتین من اعنابن برای یکی از دو برادر دو تا باغ قرار دادیم این همون برادر کافر است که از انگور وحففناهما بنخلین ما اونها را احاته کردیم میگه اسمش پتروس بود والله عالم تو کتابا نوشته اسم این برادر و حففناهما بنخلین ما احاته کردیم اونها را با نخل خرما دیوار با نخل خرما بود در وسط انگور بود و بعد زمین هم کشت ارز کنم که اونجا کشته بود گندم بود دیگه چیزهای بود زراعتی داشت وجعلنا بينهما زرعا بين اونها ما زراعت برائش قرار داده بودیم كلتا الجنتين اتت اکولها هر دو تا باغ میوهش را میداد کامل میداد ولم تظلم منه شيئا و کم نمي كرد از اون میوه هر سال چندی میوه میداد وفجرنا خلالهما نهرا و دروسطه انها ما نهری جاری کرده بودیم بهترین باغ اونه که از وسط باغ جوی آب میره هر طرف زمین را آب میدی و این باغ دیگه بهترین باغ هست یعنی یک باغ ایدعال داشت یه باغ خوب و زیبا داشت و کان له ثمرن. علاوه از باغ سرمایه دیگه هم داشت سمر اینجا به من میوه نیست سمر یعنی سرمایه اونجا بحث باغ تمام شد او کل میوه بود لذا این برادر بزرگ این برادر سرمایدار به برادر نادر چی میگه فقال لصاحبه به اون صاحب و رفیقش گفت و هو یحاوره در حالی که روزی با هم محاوره میکردن گفتگو میکردن با او گفتگو میکرد گفت که برادر انا اکثر من کمالا و اعز نفرا من ببین من هم مالم از مال تو بیشتر هست و اعز و نفرا نفراتی که با من رفت و آمد دارند آدم های با شخصیت و با عزتی هستند آدم های سرمایدار آدم های پولدار آدم های صاحب نام و شهرت. لذا خوانین سرداران اینا با من رفت و آمد دارند تو با کی دوستی تو چی داری؟ ودخل جنته واغرد باغش کی شد همین همین آقایی که همه چیز خدا به داده بود و هو ظالم لنفسی در حالی که بر خود ظلم میکرد با شرک و کفر هم معلوم میشه شرک میکرد و هم کفر میکرد یکی از کفرگویش کفر همینه چی گفت قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا من فکر نکنم که این باغ دیگه خراب بشه تبیده یعنی دائم بماند دائم میماند زائل نمیشه ان تزوله. هازیه ابدا این باغ هرگز این باغ از بین نمیره کی بگه که این باغ خراب بشه نه این باغ برای همیشه هست تا دنیا هست باغ من هست و بعد قیامت را چی گفت کفر دیگرش؟ وما اظن الساعه قائمه من فکر نکنم که قیامت قائم بشه برپا بشه قیامت کی گفته هرچی از تو همین دنیاست ولا اردت الى ربي لا اجدنا خيرا منها منقلبا برفرض اگر پیش ربم برگردم برگردانده بشوم همیشه مشرکان به خدا اعتقاد داشتن قبلا خدمت شما گفتم که اشکال کارشون این بود که با خدا شریک می ساختن و قیامت را قبول ندارد و اللہ خود خدا را قبول داشتن می گفت بلفرز اگر من برگردانده شوم به محضر ربم لأجدن خیرم منها منقلبا حتما حتما میابم بهتر از این باغها در اون انقلاب در اون بازگشت وقتی برگردانده شوم اما اون برادر دیگه طور نسیتش کرد؟ قال له صاحبه و هو يحاظره صاحب بی او گفت، همراهی دیگر بیش گفت، برادر دیگر بیش گفت در حالی که و هو ايوحاظره با اوس گفتگو می کرد، با او محاوره می کرد، اون ملامت کرد گفت، اکثرت بالذی خلقت من طراب آیت کوفت کردی نسبت به اون ذاتی که تو از خاک آفرید کفت کردی تو میگی هرگز این دنیا تمام نمیشه باقی تمام نمیشه ثم من نطفت سپس شما بعد از خاک از ماده نطفه قطره نطفه آفرید ثم سواک رجلا بعد از نطفه تو به عنوان یک مردی برابر آفرید دیگه همه چیزی تو از خداست تو نسبت به خدا کفر می کنی اما من مثل تو نیستم من اعتقاداتم با تو فرق میکنه می لکن نهو الله ربی اما من هو الله من اعتقاد دارم هو الله ربی اون الله رب من هست ولا اشرک بربی احدا من شریک نمی سازم با ربم هیچ احدیرا من شریک نمیگیرم مثل تو نیستم تو چرا وقتی که وارد باغت میشی ماشاءاللہ نمیگی ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاءاللہ چرا وقتی که داخل باغت نمیشی چرا نمیگی ماشاءاللہ لا قوة الا بالله یعنی ماشاءاللہ یکن هرچی خدا بخواد او میشی لا قوة الا بالله یعنی هیچ قوت و قدرتی من ن... من بشر ندارم مگر اینکه متکی به خدا باشم خدا قدرت داره من ندارم چرا این طور نمیگی علما وشتند که هر کسی که مالی اگر داره مال خوبی داره شما ماشینی خوبی دارید ساختمان خوبی دارید حیوانی شطوری خوبی دارید مالی که دوستش دارید تا که میبینید اگر بگید ماشاءالله لا قوة الا بالله اون وقت نظر و چشمی بهونه نمیخورد و او آسیب نمیبیند اون ضایع نمیشه لزیم این برادرم به اون برادرش میگه تو چرا وقتی که با غتره میبینی بجای اینکه توحید داشته باشی همین چیز به خدا موکول کنی بگید ماشاءالله لا قوة الا بالله بجای این ماشاءالله لا قوة الا بالله چرا کفر میکنی میگه این همیشه میمانه ان انا اقل منك مالا و اگر تو منو میبینی که من کمتر دارم از تو مال و اولاد و حشم و رفقا و دوستان درست من کم دارم ولی من ایمان دارم من خدا را بیگانه قبول دارم من امیدوارم که در آخرت خدا به من بہتر از تو بده فاسا ربی این یعطینی توقع دارم از ربم امید دارم از ربم این یعطینی خیرم من جنتی که به من میدهد بهتر از بهشت تو از باغ تو این باغی که تو داری که بهشت دنیا تو است از این باغ تو خدا به من بهتر میده ومن این هم می ترسم و این احتمال را هم می دم و یرسل علیها من السبا بل این باغتو این طور که تو کفر می کنی و ناسپاسی می کنی خداوند عذاب از آسمان می فرستد یعنی عذاب آسمانی فتصبح سعیدا زلقا باغتو تو وقتی میشه یک میدان صاف میشه شے میدان صاف می ذکان لغزنده یعنیقدر صافه انسان او جمع افته هیچی توش نیست او یس حما او غورا یعنی اینکه آبش چی میشه فرو میره آبش میره زمین فللا تستی على او دیگه نمیتونی آبش را خیلی از مردم هست الان آبشون خشک شده. باغهایشون خوش میشه هر کاری میکنند مغنی میاران دستگاه می هر هرچی میزنه آب رفته ته زمین لذا تو هم بلاخره آبت میره او یصبح ماؤها غورا آبش خشک میشه فلن الله له طلبا تو نمیتونی آب را دوباره به آب را دوباره بیاری از کجا میاری آب آب نیست این حوادث در چه صورتی می آید؟ در صورتی که تو ناسفاس باشی، ناشاکر باشی، کفر بکنی الله عز و جل می فرماید این انسان وقتی این گفت و او حالیش نشد و متوجه نشد و احیط بثمرهی تمام مالش و سرمایش مورد محاصره قرار گرفت یعنی خدا تعالی عذاب آورد عذاب آورد باغش از بین رفت گوزفندانش مردن مالش هرچی داشت تلف شدن بعد دو تا دست خالی ماند فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيهِ عَلَى مَا انفق این انسان بیچار گشت که يُقَلِّبُ كَفَّيهِ این کفش را چپے می کرد برعکس می کرد بر آنچه که خرج کرد یعنی هیچ چی گفت نمونده وَهِيَ در حالی عُرُوشِ سر نگون شده بود دیوارها هایش بر سقفش یعنی سقف, سقف باقی چیه؟ انگوره انگورها افتاده بودن تمام دیوار و درختان دیگر روی اونها یعنی ویرانه صد درصد شده بود و یقولو یالیتنی لم اشرک بی ربی احدا الان حسرت بیقوره میگه ای کاش من شریک نمی گرفتم با خدا هیچ کسی را کاش من شریک نمی سختم من شریک ساختم که این طور بدبخت شدم. الله عزوجل می فرماید: ولم تک له فئه ينصرونه من دون الله برای او گروهی نبود جماعتی نبود که او را یاری بکند بجز الله. وما كان منتصرا و هم بازدارنده نبود یا انتقام گیرنده نبود. خلاصه اون دوستانی که همیشه با کباب بی خوردند، همیشه اطرافش جمع می‌شدند. اونا به دردش نخوردند اونا هر یکی گفت به من چی الله می فرماید این هست نتیجه غرور نتیجه تکبر نباید دل ببندید به این مال که مالی خدا به شما داده با این مغرور بشید هنالك الولایه لله الحق از این مثال چه نتیجه گرفتیم از این داستان چه نتیجه گرفتیم اینجا ثابت شد که الولایه لله الحق اختیار غدرت برای الله سن الله کی حق است هو خیر ثوابا و خیر عقبا الله تعالی بہتر است از نظر ثواب یعنی چه یعنی بهترین ثواب و پاداش را الله به شما میده اگر اجر می پس با خدا باشید به خدا و خیرون عقبا و بهترست الله از نظر عاقبت عاقبت و انجام شما در صورت خوب میشه که شما با الله باشید لذا عزیزا این آیه و این مثال برای ما هم درسی هست به همین خاطر بعضی مفسرین داستان را برجسته نمی کنن نمیگن کن کی و کی بوده چون نمونه هاش در زمان ما هم هست خیلی از افراد هستن که اعتقاد دارند عزت ما با مال هست و برادر ما که نداره اون برادر ما شخصیت هم نداره زلیله ولی اینکه پنج وقت تو مسجد نماز میخونه این انسان واقعا فکرش کجه فکرش منحرفه اینقدر فکر نمی کنی که آخی همین مال رو به تو کی داده این میلیاردهایی که داری تبدیل به کارخانه کردی و به باغ و ویلا و همه چیز کردی آیا ممکن نیست یک شبه همین از بین بره؟ خدا قادر است میبینیم بینیم ها چطور یک هو و شکست میکنند و چنان ناراحت میشن که در جا سکته کنند. گاهی این قیمت ها بالا و پایین میره میلیارد ها ریال و دلار بعضی از ضرر میکنن بعضی سکته میکنند میمیرند از این خبرها لذا چرا انسان عزت خودش را در مال بدانه مال نعمت خدا هست ولی عزت در مال نیست عزت در عبادت خدا است در خدا ترسی هست مثال دیگه خدا بیان می الله اللہ می وضرب لهم وَضْرِبْ الحیات الدنيا. الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیان کم برای مثال زندگی دنیا را زندگی دنیا مثل یک کشتزاری هست مثال معروفی هست اما نکات این مثال داره اشتظاری هست که ابتدا آب را ما نازل می کنیم انزلنا من السماء آب را ما نازل می کنیم از آسمان فختلط بیه نبات الارض غاتی می شه با اون چی؟ نباتات زمین بذری که در زمین هست تخمی که در زمین هست این با اون آب و خاک غاتی می شه آخر چی می شه؟ سبدیل به بوته میشه سبزی میشه میروید وقتی که میروید بعدن آخر فأصبح حشیمن همین سبزی که به اندازه قد آدم هست همین سبزی که چقدر خوشنما هست زیبا هست بعضی وقتا ما میریم با بچه هایمون را اونجا کنار اون سبزی میگذاریم ازشون عکس میگیریم از بس که ما احساس میکنیم زیبایی دارد ولی همین فردا ببین چطور خشک میشه الله میفرماید که فاصبح حشیما این حشیم میشه حشیم یعنی یابسان متکسرا خشک میشه و ریزه ریزه میشه تبدیل به خاشاک میشه همین باغی خوب همین زراعت خوب الان شده خاشاک تمام اشغالو کا هست که تذروه الرياح بادها اورم پراکنده میکنند و می برند انسان هم چنین و زندگی دنیا هم هم خود انسان بالاخره مثل همون آبی که نازل میشه تازه متولد میشه ضعیف است ناتوان است کم کم جان میگیره قوی تر میشه بعدا جوان میشه یک جوان رانا شیک زیبا هر روز به خودش میرسه هر روز بالاخره یک زیبایی خاصی داره اما کم کم این زیباییش چی میشه؟ تمام میشه دوباره پیر میشه دوباره بدنش جم میشه تمام بدن را چروک میگیره دندانها میفته پا ضعیف میشه کمر خم میشه آخر انسان مثل همون از کنم کشتی و زراعتی که اول سرسبز بود دوباره چی شد؟ زرد شد انسان همونطور زرد میشه آخر تزروح و ریاح بعد چطور میاد اونو میبره این انسان هم فرشته مرگ میاد این انسان روحش را همونطور پرواز میده میبره یعنی دنیا اول و آخرش اینه بقیه امکاناتمون را نگاه کنیم ساختمانمون را بقیه مسائل مسائل همه همینطور لذا می میفرماید پس وقتی که شما سر سرمایه شما دنیا شما همه اول و آخر این هست چرا به این دل, دل وكان الله على كل شيء مقتدرا الله به هر چیزی مقتدر و قادر است پس باید چکار کرد بی شدت الله می فرماید المال والبنون زینت الحیات الدنيا مال و اولاد زینت و زیبایی زندگی دنیا است اما شما به فکر باقیات صالحات باشید. و صالحات یعنی اون چیزهای خوب و صالحی که برای شما باقی میمانند، خیر ون عند ربکا بهترس نزد پروردگار البته ببینید مال و اولاد را انجام در مقابل باقیات صالحات قرار داده. یعنی معلومی شم مال و اولاد باقیات و صالحات نیستن، باقیات صالحات سری چیزهای دیگه هستن. اما اگر انسان مؤمن باشد و انسان از قرآن و سنت خط به گیرد همون مال را هم میتونی جز باقیات صالحات قرار بدی همون اولاد را هم میتونی جز باقیات صالحات قرار بگیری چطور ببینید ما حدیثی داریم شما این حدیث را زیاد شنیدید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که انسان می میراد عملش قطع میشه مگر یکی از چیز یکی اینکه که صدقه جاریهی ببین این همون مال است که تبدیل به از سالحات صدقه جاریهی که انسان یه جایی صدقه کرده و اون ثوابش براش نوشته میشه مثلا پولی داشته یه مسجدی ساخته تا روزی که مسلمانان نماز میخانند براش انشاءالله عجر نوشته میشه یا قناتی چایی حفر کرده گفته مردم ازش استفاده بکنند هرچی که انسان هست و حیوان هست و گوسفند هست و فرنده هست و مورچه مور هست و اینا همه بیام هم بخورند بعضی هستن اینطور اینطور نیاتی هم دارند این حالا جو باقیات صالحات مسافر خانه ای درست کرده تو این شهر میگه هر فقیری هر ضعیفی هر مریضی کی میاد جای جا نداره اینجا، این وقفه این وقفه برای مسافرانی که میان برای علاج برای درمان بالاخره ببین این همی مال تبدیل بباقیات و صالحات شد یا نه؟ حوزه علمی درست بھی چای چاہی درست بھی کنید اینا ہمیں جز باقیات و صالحات میشن، پس مال باقیات و صالحات دومین چیزی که رسول اللہ فرمود جز باقیات و صالحات صدق جاریه فرمود او علم و نیون تفعبه علمی بجامی گزارت که خب از اون علم بقیه انسانها استفاده می کنن چیزی که فرمود فرزند صالح او ولد صالح یدعو لہ بس ببین این بنون شد باقیات صالحات المالو والبنون. هم مال هم اولاد طبق این حدیث می شست باقیات صالحات ما قرار بگیره پس ما اگر سیاست بلد باشیم تدبیر بلد باشیم سیاست و تدبیر را از کجا بگیریم از قرآن و سنت بلد باشیم همین مال و اولاد را توری بکنیم اولاد را انسان‌ها توری تربیت می‌کنند که این اولاد وسیله دین طلبی میشه این اولاد وسیله پیشرفت دین میشه این اولاد مسلمانان را موعظه میکنه این اولاد امر به معروف و نهی منکر میکنه پس این اولاد باقیات و صالح شدی یا نشد بنابر این در صورتی مال و اولاد در مقابل باقیات صالحات و زد باقیات صالحات کہ مال و اولاد را ما بر اساس حوائی نفس استفاده بکنیم خب اللہ تعالیٰ می فرمائے مال و اولاد زینت و زیبائی ظاهری زندگی دنیا هستند. اما اون چیزی که خیر هستند نزد پروردگار باقیات و صالحات هستن اون کارهای صالح و اعمال صالحی که پیش شما برای شما باقی میمانند ببینید باقیات و صالحات گرچه در احادیث تفسیرهای مختلفی آمده اما قبل از اینکه من این تفسیرهای مختلف را خدمت شما عرض بکنم در پرتوه احادیث هر کاری نیکی که شما انجام بدید که زخیره آخرت شما بشه چه صدقه چه دعا چه تلاوت چه نماز چی کارای دیگر در باب حقوق الله و حقوق العباد همه اینها باقیات صالحات شما هستند مثلا ذکر جز باقیات الصالحات در حدیثی داریم ابو سعید خدری رضی الله تعالی انو روایت میکنه در مسند امام احمد بن هست این حدیث فرمودن که باقیات چی هستند رسول الله فرمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة اللہ انا إلا بالله. الصالحات در الله الله والحمد لله الله والله بخون الصالحات داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن احب الكلمات الى الله اربع محبوب ترین و زیبات ترین کلمات از نظر الله چهار تا هستند اون چهار تا کلمه چی اینا رو همیشه بخونید اینا خدا خیلی دوست داره سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر كمان اینا قبلن تشریک کردم اینا واقعاً اینها در کنار هم باشند توحید کامل میشه سبحان الله تسبیح است الحمدلله تحمید است لا اله الا الله تحلیل است الله اکبر تکبیر است لذا تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر اینا کی بشه بلاخره توحید الله هم کامل میشه اینا را الله از همه کلمات بیشتر دوست داره سبحان الله الحمد لله پس اینها در حدیث آمده در سنن ترمیزی آمده در صحیح مسلم آمده که باقیات الصالحات اینها هستند اما امام قرطبی تفسیر قرطبی از یکی از تابعين هست قابلوان بزرگان به نام عبید ابن عمیر از ایشون نقل میکنه میگه باقیات صالحات اون دخترکای شما هستند دختر های شما هستند دختر های صالح و نیکی که شما اون دختر بچه ها رو خوب تربیت میکنید اینا باقیات و صالحات شما مردم از داشتن دختر آر داشتن دختر را ولی شما دخترانی را بگیرید خوب تربیت کنید ایماندار حیادار با حجاب با عفت دیندار با تقوی اینها میشند باقیات صالحات شما و این تفسیری که عبید ابن عمر کرده با حدیثی که ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت میکنه مطابقت داره ان حدیث ام المؤمنین چیه در اون حدیث هست که روز قیامت یک پدری را میبرم به جهنم چون عمل خوبی نداشته. چند تا دختر بچه ناظرین داره، اینا میچسپن به پدرشون و خدا خدایا اینا به جهنم نبر این پدری مابوده. این درست عملی نکرده اما برای ما خیلی زحمت کشیده. ما را خوب تربیت کرده، ما را دستور داده که حجاب بکنیم، به ما دستور داده حیا داشته باشیم. لذا خدایا ما شفاعت میکنیم پدر ما را به جهنم نبر خدای عزوجل به برکت همین دخترهایی که تربیت شده هستند پدر را از جهنم نجات میده لذا باقیات و صالحات معلوم میشه که طبق این تفسیر و طبق این حدیث دخترهایی هستند که در خانه های ما هستند ولی به شرطی که به فکر تربیتشون باشیم دیندار به بار بیاریم گاهی انسان تعجب میکنه که بعضی مردم از داشتن دختر ناراحت میشند، بعضی اینقدر حماقت و نادانی دارند که زن بیچاره درگیر میشند، زنش درگیر میشه که تو چرا دختر میزایی، دختر بیاری از انگار به دست او هست، و بعضی زن را تنبیه میکنه، اینباره گه دختر آوردی من زن دیگه میگیرم. اینا درست نیست این کلمات یک کسی پیش ما آمد الان الله مغفرتش بکنه وفات کرد مولا یک مولا بسیار فقیر بود همسرش فوت کرده بود این سه تا پسر داشت این چیزی که بنده خودم ازش شنیدم دارم نقل می کنم سه تا پسر داشت و یک دختری یه روزی آمد مایه کمپی داشتیم در یک جای کمپی بود از طریق موسسه ما حمایت می کردیم کسانی که بالاخره ترک اعتیاط بکنه یک کمکی میدن. آمد گفت که من آدم فقیری هستم کمک بکنید که این بچه, بچه های من ترک بکنند گفتم باشه کمک مییم بعد گفتن شما بفرستی از خانه من بیا اینا رو دستگیر بکنند. گفتیم ما معمور نداریم اون کمپ ها دارند ما نداریم کسانی را که اینا دستگیر بکنند بعد گفت که دعا کنید به من گفت تو دعا بکن که خدا این هر تا پسر من بکش از من بگیره من نارا شدم چرا بچه های هستن گفت چنان زندگی را بر من تنگ کردند که قسم یاد کرد که موت اونها آرزو و تمنای من است. الان ببین اینا همون پسرهایی هستن که یه روز اینا متولد میشه ما خوشحال میشیم اون دختر که متولد میشه ما ناراحت میشیم و بعد گفت که یک دختر دارم خیلی دعای خیر و دعای نیک کرد. گفت همون دخترم زنم فوت کرده. اون دختر اگر نبود من سکته می کردم. همون مرا نگهداری میکنه، خدمت می خانه که میرم غذای آمده میکنه، لباس من آماده میکنه. اما پسر هم قسم خورد گفت نه تو خونه برای من فرش گذاشتند نه یخچال گذاشتند نه وسایل دیگری که ارزش من همه را بردن فروختند و دود کردند لذا گاهی ما نمی دونیم فکر می کنیم که بلکهاریت خیر ما در چی چیزی هست هر چی که خدا داد به او راضی باشید و بل خصوص کسانی را که خدا دختر داده برای دخترانشون هم پسر و هم دختر برنامه ریزی بکنند بل خصوص برنامه ریزی دینداریشون اینا که دیندار بشن بعدا شفاعت میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی دوتا دختر را پرورش میده و روایتی دیگر ستا دختر را اینا را بزرگ میکنه انار اینا را دیندار با حیا با حجاب به خانه بخت می فرستے این انسان کار بهشتی که کا این انسان به بهشت میره. لذا این تفسیر دیگر باقیات و صالحات هست که مفسرین ذکر کردن الله می و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا باقیات صالحات است نزد پروردگار از نظر ثواب و آجر و خیر عمل است از اینکه انسان به اونها امید ببنده دل ببنده عمل چیزی نمیگن که شما بی امید داشته باشی؟ لذا بی داشت باشید لذا به اونها دل داشته باشید به اونها امید داشته باشید در چه روزی اللہ می فرمات و یوم نسیر الجبال روزی که ما کوهار سیر میدیم ما قبلن خاندیم علائم قیامت را قیامت کہ برپا بشه آغاز بشه اول کوہا پودر میشن و تبدیل به ریگ و ریگستان میشن و مثل آب جاری میشن و غبارهایشون به ہوا میرن پراکنده میشن و یوم نسیر الجبال روزی که ما سیر میدیم به حرکت در میاریم کوهارا و تر الارض بارزه و زمین رمی بینی صاف بارز یعنی ظاهر ظاهر صاف هیچ کجی کجی تویش نیست لا تر فیها عواجا ولا امتا شما هیچ بالایی پستی نیست و حشرناهم همه این انسان را ما حشر می کنیم فلم نغادر منهم احدا نمی گذاریم هیچ انسانی را متروک نمی گذاریم فراموش نمی کنیم هیچ کی را همه اونجا حاضر میشن در میدان محشر یکی هم غایب نیست لذا و اردوا على ربک الصفا تمام انسانها تمام خلایق ارزی میشن در محضر رفت صف بسته در کجا در موقف حساب اونجا که حساب و کتاب میشن اللہ میفرمید لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره همانا شما پیش ما میایید همان طور که ما شما را خلق کردیم بار اول روز اول که از مادر متولد شدیم چیگونه بودیم حتی لباس نداشتیم مادر زاد میگن نه به همون صورت پیش ما میعید همان طوری که بار اول بعدن خداوند عز و لباس میده وقتی که تازه از قبرها بلند میشه همه لخت ام المومنین آئیشه رضی الله تعالی انها وقتی که رسول الله این را تشریف فرمودن گفتن یا رسول الله مگه مردها و زنها همین نیستند هم دیگر را نمی بینن وقتی که اوریان یان لغت لخت باشان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود عائشه مسئله سخت از این ها اونجا شدت و هول و وحشت به اندازه‌ای هست که کسی کسی را نمی‌بینه تمام چشم‌ها خیره به بالاست. تمام وحشت زده هستند انسان توان دیدنی هم دیگر را ندارد لذا چینین وضعیت خطرناکی است اللہ نجات بده اللہ میب لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مر همانا شما پیش ما می آئید همانگونک کما آفریدیم شما را اول بل زعمتم اینجا بمنکرین گفته می شے ب گفته می شے بل زعمتم بلکہ شما می پنداشتید شما فکر میکردید. کردید نجعل لكم مععدده اینکه هرگز هرگز ما برای شما موعدی تعیین نمیکنیم ما وقت زمانی برای شما تعیین نمیکنیم. شما اینطور فکر می کردید، اما نه موعد تعیین شد. به موعد ما آمدید رسیدید. الان حساب شروع میشه کیفیت حساب و وضع الكتاب نامه اعمال گذاشته میشه نامه اعمال آورده میشه یعنی همه پرونده ها را میارند پرونده کی میارند هر مجرمی میلرزد فطر المجرمین مشفقین ممافی میبینیم مجرمان را که میترسند مشفقین می ترسند از آنچه که در اون پرونده اعمال هست و یقولون یا ویلتنا مال هاد الكتاب می ای وائی برما این پرونده رچی شده این نام عمال راچی شده لا یغادر سغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها نہ گناہ کچکی گذاشتے نہ گناہ بزرگی ہمی را نوشتے ایک جایی که من کوچیک، گناہ کچکی داشتم شوخی کردم آقا اون ہم نوشتے فلان جا فلان عملی مختصر را انجام دادم اون را هم نوشتی این طور نیست که انسان بالاخره فکر بکنه که انسان خیلی چیزا نادیده گرفته میشه همه را اما خداوند چش پوشی میکنه اون جای خودش داره اما فرشته موظف است تا اینکه شما کلمه را از زبان تون خارج میکنید و چه خوب باشه چه بد لذا مجرم ناراحت میگه مال هذا الكتاب ان کتاب را چه شده این پرونده و نامه اعمال را چه شده لا یغادره یعنی لا یترکو نمی گذارد صغیره صغیره من اعمالنا کوچیکی از اعمال ما ولا کبیره و نه بزرگی الا احصاها الا احصاها الا کتبها و واسبتها اونن نوشت اون رسابت کرده چرا هر چی من گفتم ثبت شده نبا این طور می شد الله می فرمد وا وجدوا ما عملوا حاضرا میابند هر چی که عمل کردن حاضر میابند هر چیکی ها عمل کردند اونجا حاضر میابند ولا يظلم ربك احدا رب تو بر هیچ کسی ظلم نمیکند یعنی چه یعنی از اعمالشون چیزی کم نمی کند ارچی که کرده همون را عرضه می کند همین را پیش میکنه. کند این مثال بود مثال دوم بود برای ناپایداری دنیا برای اینکه انسان دل نبندد انسان به آخرت دل ببندد این یعنی گاهی که این مواعظ قرآنی گوش ما می رسد با خودمون تصمیم میگیریم که از این به بعد تجدید نظر میکنیم همه ما اینطور هستیم این فطرت همه ما اینسان هست ما تصمیم میگیریم که از این به بعد تجدید نظر میکنیم از این به بعد به دین بیشتر اهمیت میدم تا دنیا به نمازم بیشتر اهمیت میدم تا مغازه به قرآن بیشتر اهمیت میدم تا کارهای بیهوده همین همه ما تصمیم میگیریم اما بعدا نمیشه چرا؟ چون یک دشمنی هست که او همیشه در صدد ماست او نمیذاره تا جایی که بتونه نمیذاره که من راحت بشم و به عبادت هم بپردازم او همیشه سعی میکنه منو به چیزهای دیگه مشغول کنه لذا در ادامه خداوند او را معرفی میکنه بس این بدون ارتباط نیست معرفی دشمن بزرگ ابلیس من بنده ارز کردم در چندین سوره تقریبا در هفت سوره داستان آدم و ملائکه آمدند و انکار ابلیس آمده خب اگر برای علم باشد برای اینکه ما یاد بگیریم و این جریان را با خبر بشیم یک جا خدا بگه کافی نیست. یک جا بفرماید از نظر علم و از نظر آگاهی برای ما کفایت میکنه. اما چرا خداوند هفت بار تکرار میکنه؟ در هفت سوره بار بار خدای عزوجل این انتکرار برای علم نیست برای تعلیم نیست برای تذکر است این برای چی هست؟ تذکر است بار بار الله تذکر میده که ای انسان اگر میخواهی راه هدف را ببری مواظب باش ابلیس هم هست لذا انسان در صورتی موفق میشه که از اول زندگی تا آخر زندگی احساس بکنه من در حال مبارزه هستم شما وقتی دشمنی داشته باشید و همیشه به فکر مبارزه با او باشید حتما از هر طریقی شده تدبیر میکنی و شکست میدید ما وقتی که به فکر تدبیر باشیم به فکر شکست ابلیس باشیم الله مارکومت میکنه راحت شکستش میدیم الله توفیق بده لذا الله تعالی می فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا زمانی که ما گفتیم به ملائکه سجد کنید آدم را فسجدو الا ابلیس سجد کردند همگی مگر ابلیس مگه ابلیس جز, جز ملائکه بود نا کان من الجن از جنات بود در رأس جنات بود اما ففسق عن امر ربی امر رب را نافرمانی کرد خب نافرمانی چیه؟ خدا که به اینا نگفته بود به جنات خدا به کی گفته بود؟ به فرشتگان این که جز فرشته هم نیست قرآن میگه کان من الجن پس چطور این نافرمانی حساب میشه؟ جوابش اینه که خداوند به این بسورت خصوصی گفته بود تو قرآن است در قرآن مامی خانی خداوند میفرماید به ابلیس ما جدا اذ ای ابلیس چرا سجده نکرده وقتی من تو را ام بکردم معلوم میشه خدا؟ به فرشتگان گفت سجده کنید ابلیس را گفت تو هم سجده بکن به این به صورت خصوصی به این ملعون دستور داد تو هم سجده بکن لذا سجده نکرد افتت تخذونه و ذریته اولیاء من دونی الان خداوند به منو شما مسلمانان میگه به منو شما مومنان میگه که ای مومن ای مسلمان این همون کسی هست که به تو احترام نگذاشت تو را به عنوان اشرف نپذیر اشرف مخلوقات دشمن تو شد و سوگند یاد کرد که تو را گمراه می با تو راه دیگه میره الان شما چرا اینقدر نادان هستید که ابلیس را دوست خودتون انتخاب کردید و ذریه ابلیس را بقیه شیاطین را شیاطین جنیرا یا شیاطین انسیرا شما چرا با اونها سر و کار دارید چرا اینها را به عنوان دوست خودتون انتخاب کردید افتت تخذونه و ذریته او آیا شما اون ابلیس را گرفتید و اولاد و اتباع ابلیس را گرفتید اولیاء من دونی دوستان برای خودتون غیر از من الله در حالی که وهم لکم عدو اونا دشمن تو هستند دشمن شما ها هستند چرا اون دشمن با اون دشمنان دوستی میکنید کنید بِعْسَلِ ظَالِمِينَ بَدَلَا اللہ می فرماید بدل و عوض بدی هست برای مشرکان ابلیس یک مشرک یک مشرک کی را به عنوان ولی خود گرفته ابلیس را یا تاغوت را شما خاندید و یک مومن کی را به عنوان ولی خود انتخاب میکنه الله را شما خاندی در سوره بقره الله ای ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين کفرو اولياءهم الطاغوت یک تفسیر طاغوت شیطانی دیگه کفار اولیای اونا کی طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اون شیطان سعی میکنه از نور از ایمان از توحید از قرآن بسوئی ظلمات و جهل و تاریکی و شرک ببره پس اللہ تعالی می فرماید بجای اینکه خدا را ولی خود بگیری عوض بدی خدا را عوض کردی اما عوضت بده ای مشرک عوضش چیه خدا ابلیس تاغوت اون را بی انوان ولی خود گرفته بِعْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا بسیار بدل بدی هست برای ظالمین از اینجا معلوم میشه من قبلا این مسئله را توضیح داده بودم که شیاطین جن همیشه در صدد دستن که انسان ها را گمراه بکنند بعضی وقتا با شیاطین انسی دست به یکی میشوند و برای مردم مشکلاتی هم به وجود میارند مشکلات از قبیل مریضی ها مشکلات از قبیل جنون و دیوانگی جنزدگی بالخصوص کسانی که اعتقاد و باورها ها اشون سسته گرفتار می کنند و تا اینکه مردم متوسل بی انها بشند بنده ارز کردم در زمان جاہلیت وقتی که جوحلہ سفر می تو جنگل ها عذیتشو می کردن جنات بعدا اونا پناه می بردن به جنات می اعوذ به سید حاز الوادی من شر سفحای قومه بعدا می اینا به ما پناه بردن اینا را نکنی یعنی هر کدوم که شرک می کرد نمیکردند الان هم شیاطین جن و شیاطین انس گاهی دست بیکی می کنند برای کسی بر کسی بلائی در میارند چون میخواند هم به شرک و عدارش بکنند هم مالش را بالا بکشند هم مادیات هم دینش را میگیرند ایمانش را میگیرند هم دنیاش را میگیرند پولش را میگیرند لذا نشون میدم باید برای این مشکلت باید فلان زیارت بری گوسفندی ببری بکشی باید چکار کنی چینین بکنی یا مثلا بعضیها قبلا خدمت شما ارز کردم بعضیها دعاهای منویسند که این دعاها بظاهر دعا هست اما توش کلمات شرکی هست تو مسئله الاخان دیم این مسئله را مثلا یا دردمائیل یا رفتمائیل چیزهای نامائی که ما نمیتونیم تلفز بکنیم اینا کیا هستن کی هستند که اینا را صدا میزنید سرات جنات هستند اینا وقتی که ببندی به بازیت خوب میشه پس بعضی وقتا مصیبت میارند مشکل میارند تا اینکه مردم را گرفتار آلودگی ها بکنند الله میفرمه اینها به اینها شما متوسل نشید اینها کاری از دستشون صادر نیست من قبلا عرض کردم جنات بالاترین هنر و کمالشون اینکه ما را فوقش میترسونند دیگر نمی تونه عصیب به ما برسونند بلخصوص ما مسلح باشیم مجهز باشیم همیشه با آیات الهی، با اوراد و اذکاری که رسول الله نشان دادن با معوضتینی که به ما تعلیم دادن اینها را همیشه بخانیم آیات توحید سوره اخلاص آیه کرسی سوره ملک اینها را که بخانیم که ما هم نمی آیند لذا اینها سعی می که مردم هم بعضی مردم اینها چی تیسمارخانی میدونن که اینا چقدر قدرت دارند چقدر توان دارند بعضی مردم واقعا اعتقاد دارند به اینها باورد دارند الله تعالی انجا می فرماید ما اشهدتهم خلق السماوات والارد من اینا حاضر نکرده بودم همین جنات را در پیدایش آسمان ها و زمین ولا خلق انفسهم نه در پیدایش خودشون خودشون را ما خلق کردیم و ما کنتم متخذ المضلین عضو و این گمراهان را من به عنوان بازوی خودم هیچ وقت نگرفتم که معاون خدا باشنی نائب خدا بازوی خدا دستراستی خدا انها فقط برای گمراهی شما هستن امتحان هستن ببینید فریب انها را نخورید و یوم یقولو نادو شرکائی الذین زعمتم در روز قیامت کسانی که اینها را در دنیا فریاد میزنند از اینها استعانت می طلبند از اینها کمک می گیرند در مشکلات خودشون انها را صدا می در روز قیامت خدا میگه شما در دنیا از این شیاطین انسی شیاطین جنی کمک خواستی الان صداشون بزنید الان بگیم بدا شما برسند و یوم یقولو نادو روزی که میگوید گوید نادو صدا کنید شرکائی الذین زعمتم شرکائی من را اون شریکانی ایک طبق زعم شما طبق گمان شما شریک من بودن اونا که در دنیا می پنداشتین شریک من هستن فدعوهم اللہ می فرماید انها اونا را صدامی زننگ فلم یستجیبو لهم انها اجابت نمی کنن وجعلنا بینهم موبقا ما بین انها چی ایجاد می کنیم موبق موبق یعنی چه؟ بعضی می میگویند که موبق به معنی خلاکت و جعل از وبوک است وبوک به معنی خلاکت یعنی جهنم بین اینها جهنم قرار می‌دهی یعنی نه همه تو جهنم می‌وفتد و بعضی میگن که مراد از موبق فاصله هست فاصله زیادی بعضی میگن یک وادی هست در جهنم بین اینها وادی هست هر یکی در یک گوشه جهنم پارت شده و بعضی میگن فاصله زیاد وراء المجرمون النار مي بين المجرمين اته شرامي بين فظنوا انهم واقعوا يقيم میکنن دیگه ماره تو می میکنن می ولم يجدوا عنها مصرفا از اون جهنم دیگه بازگشتی نمیابن مصرفا یعنی موزعا ینسرفون الی جایی که اونجا برگردن دیگه نه دیگه راه بازگشت وجود ندار بغیر از جهنم راه دیگه برایشون نیست ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مسئل سبحان الله رب مهربان هر مضمونی را برای ما در این قرآن بیان کرده تمام اصلاح بشیم اینجا همین را خدا بیان می فرمایم. همه مزامین مطالب مسائلی در رابطه با اعتقاد و ایمان و مثالهای برای اینکه شرک نکنیم غیر خدا را فریاد نزنیم مسائلی برای اعمال که اعمال صالح بدستیم بدر دماغی خورد اعمال غیر صالح داشته نباشیم همین مثالی که خانیم وضرب لهم مثل الحیات دنیا مسائلی در رابطه با اخلاق درباره حقوق در معاملات در هر موضوعی الله تعالی آیات بسیار روشن بیان فرموده قرآن واقعا تمام شؤون زندگی را پرداخته و در همه بخشای زندگی ما را راهنمایی کرده لذا الله تعالی اینجا ما را تشویق میکنه شما به این قرآن متمسک میشید و لقد في هذا القران للناس من كل مثل همانا ما گردان دیم یعنی بار بار تکرار کردیم برای مردم در این قرآن من كل مثل من كل مثل یعنی هر مضمونی که نیاز داشتن مثل اینجا به من مضمون موضوع هست من كل مزمونی یحتاجو الی هر مسئله که نیاز به او هست خدا بیان کرد وکان الانسان اکثر شئی جدل اما انسان مشرک خیلی جدل می کند باوجود اینکه قرآن شفاف واضح همه مطالب را بیان کرده بود بعض هم مشرکین بحث می کردن درگیر بودن قبول نداشتن انکار میکردند، الله تعالی می فرماید و ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين چه چیزی مانع شد کی مردم ایمان نیاورند الان در رابطه با این داستان هایی هم ذکر کردند شان نزول بعضی میگن دربار نازر ابن حارثه بعضی میگه دربار عقب ابن ابی مویت بعضی میگه دربار فلان هست ولی ما سعی می کنیم این اینها را ذکر نکنیم تا ذهن ما به این برکی این آیه مال امروزه الله تعال می فرماید بسیاری از انسان ها هستند که همه مسائل تو قرآن برایشون بیان شده. مسائل که مربوط به اعتقاد باشد به اخلاق باشد به اعمال باشد به معاملات باشد به معاشرت باشه، باشد ولی انسان باز درگیره انکار میکنه ابا میکنه اعتراض میکنه؟ خو خب این انسان کی ایمان میاره کی که میشه؟ الله اللہ می فرماید مثل پیشینیان سنت اولین چیه زمانی انہا ایمان میارن که عذاب روبی روبی آت درگیری عذاب بشه حلام میگه ایمان آوردن دیگه دیر شده اللہ می فرماید وَمَا عن النَّاسَ عَنْ مع مردم نیست جلو گیری مردم نیست از ان کی ایمان بیاورند ا جا ا خدا زمانی که برای اناہ ہدایت آمده یعنی قرآن و از تخفر و از استخار بکنند از ربشان انکی ایمان بیاورند و استخار بکنند چیزی دیگه معنی نیست الہ ان تتی سنت اوولین چیزی دی معنی نیستگر انہ پیش اونہا بیایت شیوه گذشتگان شیوه گذشتگان چی هست؟ همین عذاب استیصال است. یعنی عذاب بیاد انها را از بین ببره فقط این مونده. و ایلا انها قابل تذکر نیستن او یعطیهم العذاب و قبل یا ایکی پیش انها عذاب بیاد قبلا دو معنا دارد یک معنی قبل یعنی روبرو. روبرویت عذاب را بیبن. یک معنا دیگر قبول جمع قبیل است. یعنی انوای ازابها. شما خان دی برای فرعون انواع ازابها آمد. یک روز طوفان، یک روز جراد، یک روز یک روز هرباغه خلاصه. انوای ازابها بیاد تا هم ایمان میآورند. اللہ مر راضی نوشته تفسیر راضی کبیر. والمعنا أنهم لا يقدمون على ایمان اینا بر ایمان اقدام نمی کنند الا عند نزول عذاب الاستیصال که ایمان می وقتی که عذابی که بیخی انها رو ریشه انها رو بزند ایمان می آورند فیوه لکوی هلاک بشند او ان تواصل انواع العذاب والبلاء یا پیابی انواع عذابها و بلاها بیاید در دنیا بعدن ایمان می بدون عذاب نمیشه ایمان بیاورند اینا آورند. و نرسلو، ما نرسلون اما خداوند میفرماید ما پیامبران را میفرستیم که اونا تبلیغشون را بکنه این جواب سوالی هم هست که خود عذاب چرا نمیاد پیغمبران مسئول عذاب آوردن نیستند پیغمبران مسئول انذارند مسئول تبشیرند الله میفرماید وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ما نمی پیامبران را مگر مجد هستند و بیم دهنده هستند یعنی نمختار معجزات و نمختار عذاب واتخذو آیاتی وما انذرو حزوا، اما این بجائے اینکه ایمان بیاورند گرفتند آیات من را و ما انذروا ان چکه شدن شدند از سی ترسنده شدن از عذاب عذاب را گرفتند هوزون به باد مسخره یعنی هم به آیات ما مسخره میکنند هم به عذاب ما مسخره میکنند و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا الله میفرمايت چه کسی ظالم تر چه کسی ستمگردتر از اون انسانی که تذکر داده میشه نسبت به آیات رب اینا واقعی این مشرکی ستمگرند که وعز میشه از سوی پیامبر موئزه میشه آیات رب براش خانده میشه فاعرض عنها ایراز میکنه از آن و نسیه ما قدمت یدا عمل کردش را فراموش میکنه ما قدمت یدا یعنی اون چیزی که دستهاش انجام داده یعنی عمل کرده سوء اشرا که فردا برایش تبدیل به عذابی میشه اونا فراموش میکنه اصلش اینه که خدا انها را محروم کرده از ایمان از تسلیم شدن ان جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوهو همانا ما قرار دادیم بردل های اونها غلافی و پردی از این که بفهمن و فی آذانهم وقرن وقرن در گوشهای اونها چی هست؟ بار هست، بار هست یعنی هیچی نمیشنوند. و این تضعیهم إلى الهدا فلا يهتدو اذن أبدا. الله طاله اگر شما فرا رفرا بخوانی بسیه هدایت فلا يهتدو اذن أبدا. هرگز انها هدایت نمیشوند در اینگام. هدایت نمی شوند و بسوی دین و ایمان نمی آوائیں بعد از این خداوند از و برای انهایی که هدایت نمی شوند وعید بیان می فرماید تحدید می فرماید خب سوال انجاز که چرا خدا اینها را فورا معاخذ نمی کنه؟ خدا هم میدونه که انها هدایت نمی شند خود خدا هم می که هدایت نمی شند خب چرا عذابشون نمی ده اللہ اینجا جواب داده اللہ می دونی که هدایت نمیشن ولی خدامان تاریخ را تعیین کرده. کار خدا با نظم و تکتتیبه و رب کل غفور و ذ یکی از دلائل عدم اذابی نه فورا خدا اذب نمیده چون خدا غفور است ب است دستور رحمتش هم وسیع ذو ذور رحمه هست دارای رحمت هست، دارای رحمت وسیع هست. هست. هست. بین خاطر فورا عذاب نمیده اما؟ لو يؤاخذهم بما کسبو اگر خدا بخاطر مؤاخذه شون کنه بما کسبو در مقابل اونچه که کسب کردند لعجل لهم العذاب البته عذاب را برای اونها تعجیل میکند یعنی اگر خدا بخاطر زود عذابشون میده فوراً میزنه اما بل لهم موعد بلکه برای انها یک موعدی هست اللہ می فرمات وعدیمان با انها دارم لن یجدو من دونه موئلا هرگز نمی بغیر از اون موعد موئل یعنی پناهگاهی جایی که اونجا مسیر خودشون را کجب کنند و برن پناه ببرند نمی آبن پناهگاهی نمی موعد که بی آید عذاب بسرشون می آید وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا اللهمی فرماید این قریهان که ما داستانهایشون را برای شما تعریف میکنیم اینها رو ما حلاک کردیم لما ظلموا زمانی که ظلم کردن یعنی مثل شما قریشی ها اونا شرک کردند به شما که محلت میدهیم معنیشی نیست که برای شما عذاب نمید برای شما هم عذاب میاد و جعلنا لمهلكهم موعدا برای هلاکت اونها ما موعدی تعیین کرده بودیم خب عرض کنم خدمت شما که تا اینجا الله عز وجل مثال هایی برای کفر و شرک هم بیان فرمود برای ناپایداری دنیا بیان فرمود برای اینکه اون چیزی که بدرد درد انسان میخورد باقیات الصالحات بیان فرمود و همچنین این مطلب که تمام مزامین امده در این سوره بیان شده اما و اذ قال موسیٰ لفتاه از این آیه یک شبه دیگر و یک اشکال دیگری پاسخ داده میشه اون شبه درباره سیدنا خیزر علیه صلات و السلام هست که خیزر هنوز با موسیٰ علیہ السلام می رفت هنوز اون جریان اتفاق نیفتاده بود جلوتر میدانست. مثلا می که جلوتر ایست بازرسی یک پادشاهی است. این کشتی را می گیرد به این خاطر کشتی را معیوب کرد تا کشتی غرازهی باشه تا توجه نکنند. یا مثلا میدانست که این دیوار زیرش خزانهی هست دیوار را, را راست کرد تا اون خزانه را مال دوتا بچه یتیمند ظالمان نخورند خب از اینجا معلوم میشه که بعضی از پیامبران علم غیب دارند الله عز و جل در این سوره بیان میفرماید که ما به او میگفتیم ما به او نشان دادیم ما به او از رحمت خودمون دادیم وحی کردیم لذا این جریان موسا و خزرست جریان معروفی هست در قرآن کریم البته فقط همین یک جا آمده داستان موسا و خیزر در رابطه با خیزر نکاتی بنده خدمت شما عرض می کنم اما موسیٰ چطور پیش حضرت خیزر رفت به صورت های مختلفی مفسرین ذکر کردند در بعضی روایت ها میاد که ایک روزیز موسیٰ صلی اللہ سخنرانی کرد و این سخنرانی موسیٰ بسیار سخنرانی پرتاثیری بود های مردم جاری شد موهای بودن بلند شد قلبها تکان خورد خیلی متاثر شدند از معزه موسی بنی اسرائیل با خودشون گفتند که آیا از موسی تر هست؟ موسی را پرسیدند موسی در این زمین از شما کسی عالم تر است؟ موسیٰ صلی اللہ علیہ گفت نه چون پیغمبر خدا بود علم را خدا به موسی داده بود اما این جواب موسی گرچه جواب واقعی بود حقیقی بود بر خلاف مصلحت بود باید همه چیز را به خدا موکول بکنه همه چیز را به خدا نسبت بده خدا بهتر میداند از این بابت موسی علیہ السلام را خداوند تذکر داد که بنده ما داریم در مجموع البحرین هست اون بنده ما علمش خیلی زیاده موسی علیہ السلام پیغمبر خدا اما پیغمبر با وجودی که علم وحی را خدا بهش داده اما بعضم حریصه که علم یاد بگیره از خداوند اجازه میگیره میگه پس من میرم در خدمت او قرار میگیرم زانوی تلمز می زنم از او یاد می گیرم خدا تعالی به موسی اجازه می که بره ببینه موسی متوجه بشه لذا بعضی میگن علت سفر موسیٰ سلام السلام این بوده این تو حدیثم آمده درسته اما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ چیزی دیگه هم نقل می کنه ایشون می فرماید که موسیٰ علیہ السلام یک روزی چند تا سوال از خدای عزواجل مطرح کرد یکی گفت خدایا از همه بندگان کی بیشتر محبوب شماست از همه بندگان خودت کی را بیشتر دوست داری خداوند گفت اون ای را دوست دارم که هر وقت بیادی ما باشد و هیچ وقت از ما غافل نشه از ذکر ما غافل نشه از همه بندگان اونو بیشتر دوست داره خب موسیٰ علیه صلی سلام تصمیم گرفته که همون بنده باشه دیگه هیچ وقت از ربش غافل نشه دوم موسیٰ گفت پروردگارا بهترین قاضی و داور و فیصله کننده در میان بندگانت کی هست خداوند فرمود که همون کسی هست که فیصله درست می کند تابع خواهش نفس خودش نباشد و بر اساس عدل و عدالت فصله بکند سومی سوال موسی پرسید که یا الله از همه عالم تر کی هست داناتر کی هست الله تعالی گفت که اون کسی که مردم از او علم حاصل میکنند و همیشه به فکر ازدیاد علمش هست همیشه فکر می که کسی باشم مازو علم یاد بگیرم کسی باش از سخانی بگوید مازو سخانش را یاد بگیرم جمله را بیاموزم تا به وسیله اون سخن راهنمایی بشم از هلاکت نجات بیابم بعدن وقتی موسی دید که عالم ترین کس اینه گفت خدای اگر در این دنیا کسی هست که من بتونم از او استفاده بکنم چیزی یاد بگیرم مرا راهنمایی کنم، پیش او برم خداوند از وجل فرمود بنده ما خیزر هست در مجمع البحرین هست اونجا برو لذا موسیٰ علیه سلاطه و السلام به طرف مجمع البحرین رفت بعضی می گویند که مجمع البحرین در کجا بود جایی که دو تا دریای سودان و دریای مصر خورتوم در خارتوم یا خورتوم هست دریای خورتوم اونجاست ولی این اشتباس اون زمانی که موسی اگر در مصر بوده و می رفته درسته ولی موسیٰ علیہ السلام بعد از این که فران شد اینا را از خدا تغازه کرد لذا این مال زمانی است که موسیٰ علیہ سلام در شام بود در این صحرای سینا بود خب خدای عزوجل گفت پس برو به مجمع البحرین مجمع البحرین کجاست جایی که دوتا خلیج خلیج عقبه و خلیج سوئز یا کانال سوئز که اونجا با هم برخورد میکنن در صحرای سینا اونجا هست لذا به موسی علیه السلام گفت اونجا برو بنده ما رو میبینی خواجه خزر معروف است حضرت خیزرا و برو با او ملاقات بکن از علوم او بهرمند بشو لذا موسیٰ علیه سلات سلام السلام حرکت کرد و خدا تعالی به موسی گفت شما با خودتون ماهی میبرید هر وقتی که ماهی از زنبیلش پرید و در دریا رفت و سوراخی ایجاد کرد همون جا جای خیزر است موسی علیه الصلاۃ یکی از خادم های خودش را برداشت حضرت یوشع بن نون را که این یوشع بعدا پیغمبر شد بعد از موسی علیه الصلاۃ والسلام لذا یوشع را برداشت و رفتن به این سفر سفر بسیار پر ای است چیزهای عجیبی دیدند و اذ قال موسی لفتاه زمانی که موسی به اون جوانش گفت یعنی به خادمش یو شعب نون گفت لا ابرحو حتى اج ابلغ مجمع البحرين همواری معمی رویم حتی که برسم به مجمع البحرین به اونجا که دریای خلیج عقبه هست و خلیج سوئز هست او امضی حقوبه یا اینکه اگر نرسیدم برم همینطور زمان طولانی برم اما فلم ما بلغ مجمع بینهما وقتی که رسیدم به اون مجموعه البحرین بینی دو دریا نسی حوتهما ماهیشون را فراموش کردن فاتخذ سبیله فی البحر سربا اون راهش را گرفت از زنبیل پرید و در دریا رفت سربی درست کرد یعنی سراخی درست کرد سوراخی در آب درست کرد و رفت خب موسی خواب بود، اونطوری که اهل تفسیر نوشتن، موسی علی سلام استراحت می کرد و گفت که بعد از این که استراحتمون تمام شد ما میریم. همین جاهزت یوسف نشسته بود دید که هو مای ما پرید تو دریا و رفت تو دریا و همون جا جایی ماند، صورتی ماند، علامتی ماند میخواست که به موسیٰ علیه السلام بگه موسی خواب بود گفت بعد از خواب میگم بالاخره بعد از خواب بلند و گفتم بریم که راه طولانیه فراموش کرد که بگه تا اینکه یه جای دیگه رسیدن موسی گفت خسته شدیم گرسنه شدیم غذای بیار ماهی را بیار اینجا بیا آمد که اون ماهی همون جا رفت لذا به موسیٰ علیه السلام گفت من چین چیز عجیبی دیدم اللہ تعالی از ذهنش برده بود موسی گفت که بنده خدا همون ما مسیر ما هدف ما ما باید همون جا می رفتیم بی خود این راه رفت آمدیم برگشتن به همون جا رفتن الله می فرماید فلم ما بلغا مجمع بین ما وقتی این هر دو رسیدن به اون مجمع البحرین نسیه فراموش کردند ماهی خودشون را ف سبيله في او فی البحر سربا راهش را راهش در دریا گرفت سوراخی در دریا درست کرد. فلما جاوزا گا لفتها او آتنا غذا آنها وقتی از اونجا عبور کردند بخادمش گفت غذای ما را بیار. لقد لقینا من سفرنا هذا نصب ما از این سفر من خستگی ما دست داده خیلی خسته شدیم. الله فرماید که و خادم چی گفت حضرت یوشع چی گفت قال ارایت اذ اوینا ال الصخره موسی بیاد شما هست دیدی وقتی که ما اونجا پناه بردیم به اون صخره اون سنگ اون کو اونجا استراحت کردیم فانی فا نسیت الحوت همونجا من ماهی رو فراموش کردم و ما انسانه الا الشیطان ان و اون را فراموش نداشت از من ذهنم نبرد مگر شیطان که من یادش بکنم یعنی من فکر بودم بیت بگم اما شیطان از ذهنم برد و اتخذ و فی البحر عجبا راهش را در, در دریا گرفت به شکل عجیبی دو در دریا رفت ببینید سوال اینجا مطرح میکنن مفسران که این چیز اگر معمولی باشه ماهی را به زمین بگذارند و فراموش بکنه خب این طبیعی هست اما یه چیز عجیبی این قدر عجیب که ماهی مرده زنده میشه پرش میکنه. میره تو دریا بعد اونجا که میره همونجا نقبی سوراخی هم به میگذاره هرچی تو آب بندازی دوباره آب چی میشه با هم یکی میشه اما اونجا نه آب همونطور استاد سوراخ درست شد این یک چیز خارق العاده از چنین چیزی را چطور میتونه یوشع فراموش بکنه پاسخش اینه که یوشع مرید خاص موسی بود شاگرد موسی بود اینقدر معجزه دیده بود اینقدر آیات دیده بود که این براش عادی شده بود هر جا موسی سنگ رمی زد عز کنم اثر به سنگ میزد دوازده تا چشمه درست میشه اثر مینداخت اژدها اثر میزنه به دریا دریا بالاخره میسته این آیات بزرگ بزرگ دیده بود پس این آیه در مقابل اونها چیزی نبود معنیش اینه که برای یوشع علیه الصلا و السلام این آیات و معجزات عادی شده بود چی شده بود عادی به این خاطر فراموشش کرد اما جواب که نه حکمت و مصلحت در همین بود که فراموش بکنه خودش میگه و ما انسانیو الا شیطان انا ثورا می خاصی اداوری کنه اما شیطان از ذهنش برد اینکه یاد کنه واتخذ او فی البحر عجبا بالشکل عجیبی یعنی خارق العاده راهش را در, در دریا گرفت و رفت موسی علیه الصلاه و بهش گفت قال ذلك ما كنا نبغي این همون چیزی است که ما می‌خواهیم می‌طلبین فرتد على اثارهما قصصا پس آنها برگشتند بر آثار آثار همون خودشون که آمده بودند به طرف مجمع البحرین لذا برگشتند قصصا یعنی همون راه خودشون را دنبال کردند همون راه خودشون را پیمودند از به خدمت شما که اینکه حضرت موسی علیه سلاط و سلام پیش حضرت خیزر رفت اصلش انشاءاللہ نکات را ما در درس فردا می خانیم نکات زیادی هست اما اصلش اینه که خدای عزوجل می به موسی نشان بده که این دنیا دنیای پر پر از اسرار است این دنیا دنیای پر از اسرار است و یکی از دلائل ربط این آیه با آیات گذشته را هم همین بیان کردن بسیاری از مفسران بعضی از مفسران چون اینجا در گذشته بود که مشرکین عذاب میخواستن عجله داشتند برای عذاب الله عز و جل فرمود که و ربک و ذو رحمه خداوند اگر مهلت ده غفور رحمه هست، لو یا بما به کسبو لعجل لهم العذاب. اما اینکه خدا زود عذاب نمیده، چون اسراری اینجا هست، حکمتهایی هست، که اون اسرار را الله کسی نمیدونه. حتی پیامبران هم نمیدونند، گاهی پیامبران برای عذاب اجله دارند. منتظر منتظر. حتی اگر اثر الرسول و ظنوا انهم قد كذبوا شما در سوره یوسف قند جاءهم نسرنا لذا الله عزوجل داستان حضرت موسی و خز را آورد علاوه از این که ذکر این داستان پاسخ یکی از شبهات است اما این داستان را آورد رپتش در اینه که ببینید همون طور که در این داستان شما میبینید اسراری هست که اسرار بعدا برای موسی کشف میشه واظه میشه همچین هر کاری که خدای عزوجل انجام میده کارهای الهی پر حکمت هست پر سر هست پر از هست است که الله میداند شما نمیدانید قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن ان تعلمني مما علمت رشدا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 إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا در ادامه واقعه و داستان سفر موسی علیه السلام که یک سفر علمی بود و یک سفر آموزشی بود. الله عز و جلّ موسی علیه السلام را فرستادند که موسی عالمتر از خود ببیند. بنابراین دستور رسید به موسی که به مجمع البحرین بره بعد از این که حضرت یوشع که خادم موسی بود به موسی گفت که ما ماهی را همون جفراموش کردیم اونجا که استراحت کردیم اونجا که مقدار ماندیم و ماهی در واقع به صورت عجیبی پرید و داخل دریا رفت مثال سلامات و سلام گفت که مسیر ما و مقصدما اونجا بوده بنابرا این برگشتند وقتی که برگشتند ها را گشتند که این بنده صالح پروردگار را پیدا بکنند اونطوری که در روایتها ها هست مصال صلات و سلام اطراف را میگشت دید که پشت سنگی، فردی استراحت می کند و خواب هست گفت که السلام علیکم وقتی که سلام گفت اون گفت که اینجا سلام از کجا چونکه سلام در واقع روش اهل دین هست و جواب سلام گفت و گفت که کی هستی شما گفت موسیٰ هستم حضرت خیزر علیه السلام از قبل در باره موسیٰ علیہ السلام اطلاعاتی داشت گفت موسی بن اسرائیل گفت بله موسی بن اسرائیل هستم بیشان خوش آمد گفت و موسی را به حضور پذیرفت بعد از اون موسیٰ علیہ السلام بهش گفت که من آمدم که چند روزی در خدمت شما باشم همراه شما باشم خزر علیه السلام و السلام اینجا برای خلوت خودش اینطوری که از آیات معلوم میشه برای خلوت میامد ما در انبیاء گذشته و تاریخ انبیاء گذشته داریم که انبیاء علیه مسلوات و تسلیمات قوم را ارشاد میکردند قوم را راهنمایی میکردند اما گاهی از قوم فاصله می گرفتند و با ربشون خلوت می کردند می رفتند یه گوشه یه غاری یه جایی موسی علیه کوه طور می رفت و اونجا با رب سبحانه و تعالی مناجات می کرد رسول الله صلی الله علیه و بعد از تبلیغ و بعد از جهادو بعد از فعالیت هایی که انجام میداد هر رمزان در عشره اخیر اعتکاف می نشست و در این اعتکاف گویا با رب العالمین خلوت می کرد لذا این خلوت در همه انبیا بوده خضر علیه سلام در این منطقه می آمد با رب سبحانه و تعالی خلوت می کرد یعنی مستقیمن به عبادت می پرداخت دیگه کاری نمی کرد فقط راز و نیاز طاعت و بندگی سجده و دعا و نیایش لذا اینجا وقتی که موسی به او گفت که من میخوام با تو همراه بشم خیزر علیه السلام, و السلام گفت نمیتونی دلیلش را خدمت شما عرض میکنم اما قبل از این این آیه اول قرآن نام نگرفت که اسم این شخص خیزره هست قرآن میفرمید فوجدا عبدم من عبادنا اوندو دو یافتند یعنی موسی و یوشا یافتند و دیدند بنده از بندگان ما را اما در احادیث اسمش خزر آمده، خزر هم میگویند، خوزر هم میگویند، خزر هم میگویند. هر سه درسته. اصل خوزر یا خزر یا خزر به معنی سبزی هست، آبادی، آبادانی هست. میگویند که هر جا که ایشون مینشست، و از اونجا بولند میشد، الله تعالی اون محل را سبز میکرد، اون محل آباد میشد، چون از خاصان خدای عز و بود با الله تعالی رابطه مخصوصی داشت اما بحث اول ما اینجا امروز میخوایم مطرح بکنیم اینه که آیا خیزر علیہ السلام پیغمبر بود یا ولی از اولیاء بود بسیاری از علماء معتقدند که خزر پیغمبر نبود خزر ولی بود از اولیاء الهی بود اما قول دغیق قول محقق و قول درستر و راجهتر اینه که خضر علیه و السلام پیغمبری از پیغمبران الهی بود به چه دلیل؟ به دلیلی که اولا کلمات و واژهایی که برای خضر در همین آیه بکار برده شده این کلمات را اللہ تعالی برای به بکار میبرد مثلا اینجا میفرماید موسی و یوشع بندی را دیدند از بندگان ما که آتیناه رحمت من عندنا ما بی بندی خودمون رحمت دادی بودیم از جانب خودمون رحمت یعنی نبووت من لدن علم وما از جانب خودمون او را تعلیم دادیم علم خاصی به او دادیم ببینید همین کلمات درباره بغیه پیامبران بکار برده شده حضرت نوح علیه السلام والسلام را الله تعالی می فرماید شما در سوره هود خواندید الله عزوجل می فرماید که نوح علیه السلام به قومش اینطور تبلیغ کرد قال یا قوم ارائیتم ان كنت على بینه من ربی وااتانی منه رحمتا ای قوم اگر من دلیل داشته باشم و خدا به من رحمت بده رحمت یعنی نبوت بس ببینید اینا همین چیزی که برای خضر بکار برده شده اونجا برای نوح علیه السلام بکار برده شده در همون سوره سوره هود برای حضرت هود هم همین کلمه هست حضرت هود به قومش چی گفت قال یا قوم ارایتم ان كنت على بینه من ربی واتانی رحمه من عنده و اعطاني رحمت من عنده اگر من دلیل داشته باشم و خدا به من رحمت بده از پیش خودش رحمت یعنی نبوت پس این واژه رحمت اعطاني رحمت من عنده برای هم حضرت هود به کار برده شده هم برای حضرت نوح به کار برده شده اینجا خداوند برای خزر به کار برده چی می فرماید بندی را دیدن که آتیناه رحمت من عندنا ما به او رحمت دادیم ما به او رحمت دادیم یعنی بوت دادیم و علمناه من علما و ما از جانب خودمون بدون کسب کردن به او علم دادیم بند قبلا خدمت شما ارز کردم که همه انبیاء الهی مستقیما شاگرد خدای از و هستن به این معنی که پیش هیچ استادی دوزانو ننشستن پیش هیچ استادی درسی یاد نگرفتند مستقیما خدا به اونها علم داده به حضرت آدم خدا می فرماید وعلم آدم الاسماء به حضرت داوود الله می فرماید وعلمناه صناع تلبس لكم به حضرت رسول الله الله تعالی می فرماید وعلمك ما لم تكن تعلم یعنی خدا به تو علم داد خدا مستقیم داد خدا می فرمه ما به او علم دادیم اینجا برای خزر هم همین واجب کار برده شده یعنی معلوم میشه که خزر هم بلا واسطه شاگرد خداوند هست مستقیم از خدا علم کسب کرده بود بس این اینچینین هستند این صفت صفتی کی هست؟ انبیا هست واللما آلوسی هم نوشته والجمهور علی انها الوحی و النبوه جمهور برای نقیده هستن که این رحمت و علمنا به معنی وحی و نبوت است و قد اطلقت علی ذالکه في مواضع من القرآن در جهای دیگری در قرآن برای انبیاء دیگر کار برده شده پس معلوم میشه که خزر علیه سلام پیغمبری بود و یکی دیگر از دلائل غویتر و این دلیل دلیل مهمتری هست توجه بفرمایید او اینه که هیچ وقت ولی هیچ ولی از اولیاء نمیتونه بر اساس خوابی که میبیند یا بر اساس کرامتی که خدا بی یا بر اساس الهامی که بی میشه کار خلافی انجام بده مثلا یک ولی در خوابش میبینه که فرزند خودت را برو برای خدا قربان بکن. اجازه نداری این کار را بکنه. خواب ولی فرق میکنه با خواب پیغمبر. ابراهیم وقتی در خواب میبینه این کار را میکنه. ولی یک ولی از اولیا این را ببینه نمیتونه این کار را بکنه. اون چیزی که خدا به پیغمبر القامی کنه از نظر یقین بودن فرق داره با اون چیزی که خدا به یکی از دوستانش القا بکنه لذا ولی حق ندار این کار را بکنه حالا ببینی خیزر علیه السلام اینجا خدا بهش وحی میکنه و مطمئن این وحی وحی نبوت است که این بچه را برو بکش میره بچه را میکشد ولی نمیتونه بر اساس یک الهام کیو بی بی بچه ای رو بکوشه انسانی رو بکوشه فردا خودش را قصاص میگیرند بگه به من الهام شده بالاخره الهام ولی در جایگاه این اس که یک حجت شرعی باشد اما وحی پیغمبر بله بس ببینید اینجا خدای تعالی میفرماید که خضر علیه الصلاۃ والسلام اون بچه را کشت گفت فردا این بچه بزرگ میشه پدر و مادرش را به فساد میکشه به شرک وادار میکنه. معلوم میشه که این پیغمبر خدا بوده که با این قاطعیت میره بچه مردم را میکشد. این دلیل دیگری هست که خیزر علیه صلات و السلام پیغمبر خدا بود اما یک بحثی که بعدن باید عرض بکنم ولی بعدن شاید فراموش بشه همینجا میخوام خلاصش بکنم اون اینه که آیا خیزر علیه صلات و السلام که خزر نبی هست خزر پیامبر است؟ خزر حیات داره آیه هنوز زنده هست چون یک بحثی در کتاب ها مطرح است به عنوان حیات خیزر بعضی معتقدند که دو تا از پیغمبران غیر از ایسا علیه سلات و السلام که در آسمان ها هست بعضی معتقدند دو تا از پیغمبران زنده هستند یکی حضرت الیاس و یکی حضرت خیزر این دو تا از پیغمبران زنده هستند و بعضی از اهل خرافات و اهل شرک بعض از اینجای استنباط سوئی هم میکنند میگویند که الیاس در بیابان هاست زنده و خزر در دریا هاست زنده است لذا هر وقتی که شما به مشکلی گرفتار شدید برای شما مصیبتی آمد شما اونجا اگر در بیابان بوده الیاس را صدا بزن حضرت الیاس بیاریت میآید و اگر در در دریا بودی می‌خواستی غرق بشی می حضرت خضر را صدا بزن خضر به مشکل رسیدگی می‌کنه اولا این این عقیده که یک عقیده خرافی هست این عقیده یک عقیده شرکی هست انسان هر جا که مشکلی گرفتار میشه باید رب را صدا بزنه الله می منو من بخانید. من نزدیک ترم از هر کسی من می شنوم. من می بینم من تمام احوال را مشاهده می کنم اما این بندگانی که شما صدا می زنید خبر ندارند اما نفس حیات خزر و حیات الیاس این از هیچ آیه و از هیچ حدیث صحیح ثابت نیست این اینها زنده باشند ثبوتی نداره و قول درست در باره اینها این هست که اینها وفات کردند به چه دلیل اینا وفات کردند خب الان بعضی میگن خب کجا آمده که اینها وفات کردند کی وفات کردند کجا دفن شدند بعضی دلیلشون همینه خب درباره همه انبیا ما همینه نمی دونیم کی وفات کردند کجا وفات کردند حضرت صالح کجا وفات کرد حضرت هود کی وفات کرد حضرت لوط کی وفات کرد هیچ پیغمبری ما علم نداریم کجا دفن شدند چه زمانی وفات کردند این ندانستن ما دلیل نمیشه که نا زنده باشند پس اینها حیات ندارن و دلیل عمدی که مشایخ ما و اساتید ما میگیرن بنده اون آیه را خدمت شما خاندم در سوره آل امران هست که خداوند از همه انبیا عهد گرفت. ای پیامبران من شما برید تبلیغ بکنید. اما در پایان سلسله نبوت یک پیغمبری می آید که این پیغمبر ثم جاكم رسول مصدق لما ما معكم رسول میآید که هرچ که تعلیماتی که شما دارید کتابهایی که شما دارید اون رسول تصدیق میکنه تایید میکنه اون رسول که آمد شما همه پیامبران وظیفه دارید لطمنون نه بهی وال تن نه حتما به او ایمان بیاورید و حتما او را یاری کنید در جنگها در غزوات در کنارش باشید منظور چی منظور اینه که پیروان شما؟ کسانی که خودشون را به شما پیامبران نسبت میدند اونها وظیفه دارن در, مغ... در کنار اون رسول باشند بعدا خدا به پیانبران گفت قال اا و اخستم على ذلكم اسری ای پیامبران، این توصیه که به شما کردم اقرار میکنید و با من اهد میبندید قال نه. همه پیامبران گفت خدایا ما اقرار میکنیم خدا من فرمود قال فشدو و انا, انا معکم من الشاهدین پس شما گواب آشیم منم گواب که این پیامبر آمد باید شما به ایمان بیارید خب اگر واقعا این دو پیامبر زنده بودند وقتی رسول الله آمده بود بر اونها واجب بود می آمدن با رسول الله بیعت می کردند ایمان می آوردند در جنگ بعد شریک می شدند در احد شریک می شدند در خندق و فتح مکه و تبوک و در تمام جنگ در کنار رسول الله می بودند ولی چنین چیزی نیست معلوم میشه که این دوتا تا مثل بقیه انبیا وفات کردند در این دنیا نیستند این لذا دلیلی ندارن کسانی که میگویند حضرت خضر علیه السلام زنده هست و هم رسول الله صلی الله علیه و سلام که هر صد سالی لا يبقى على الراس ال 100 صد سال که میاد باقی نمی ماند ممن هو اليوم على ظهر الارض احدون اونایی که امروز هستند بعد ست سال یکی از اینها هم نیست من اینه که همه می میرند بس بر اساس این حدیث هم اونا ست سال سر ست سال از این دنیا رفتن. على ای حال اعتقاد ما اکثریت اهل سنت و جمهور اهل سنت اینه که خضر علیه السلام پیغمبری بوده اما الان نیستند وفات کرده خب خضر علیه السلام وقتی که موسی پیشش رفت موسی بهش گفت قال له موسی هل اتبعك علی ان تعلمنی مما علمت رشد ای خضر آیا من تر دنبال بکنم اتبعك من تر دنبال بکنم به خاطر چی بخاطرین که به من یاد بدهی من معلمت از اون چیزی که تو آموخته شدی خدا به تو یاد داده رشدن از نظر راهنمایی، از نظر علم میتونی من هم راهنمایی کنی من هم یاد بدی خیزر علیہ السلام همون ابتدا معذرت خواهی کرد گفت ای موسی، اینکا لن تستطیع معی صبر قال این لن تستطیع تو هرگز نمیتونی با من صبر کنی تو هرگز نمی توانی با من صبر بکنی. چرا؟ ببینید. علمی که خدای از وجل به خیزر علیه و سلام داده بود علم تکوینی بود. و علمی که موسیٰ علیه صلات و سلام داشت علم تشریعی هست. علم تکوینی علمی است که خداوند به فرشتگان داده. چون فرشتگان مسئولیت دارند. خداوند مثلا دستور داده که بعد از این مدت این گروه از انسان ها باید بمیرند. بعد از این مدت این گروه بمیرد. بعد از این مدت این منطقه باید زلزله بیاد این منطقه باران بیاد اینجا بهار بشه اینجا قتل بشه اینجا فلان اتفاق اینجا هرچی که در عالم کون هستند در عالم تکوین هستند یعنی در زمین و آسمان و کوه و دشت و دمن و جنگل و جزیره. هر اتفاقاتی که قرار بیفته سونامی میاد، فلام میاد اینها را خداوند به فرشتگان داده علمشون را داده چون فرشتگان اونجا ماموریت دارند فالمدبرات امرا همه امور را اونها رد و فتق میکنند به دستور خدا اونها انجام میدهند لذا خضر علیه صلی اللہ وسلم خداوند بخشی از علم تکوین به او داده بود که چه حادثه اتفاق می افتده چه مشکلی پیش میاد. اما علم موسی علم تشریعی بود علم تشری یعنی علم شریعت این حلاله این حرامه این انجام بده این انجام نده این علم علم علی صلی اللہ علیہ بود بنابر این علی صلی اللہ علیہ گفت ای موسی من بر اساس اون علم تکوینی بر اساس اینکه خدا به من میگه آینده چکار باید بکنین و برای آینده چه برنامه ریزی باید بکنیم بر اساس اون من اقدام میکنم اما این چه بسا از همین اقدامات با علم شرعی شما سازگاری ندارد شما نمیتونید تحمل بکنی بنابراین شما نمیتونید صبر کنی شما بامن نیا موسی خزق به موسی گفت و کیف تصبرو علی ما لم تحت بهی خبره چگونه صبر میکنی بر اون چیزی که حاطر نکردی اونها از نظر خبر یعنی از نظر علم از نظر علم تو نمیدونی چی میشه خب چرا چطور میتونی صبر کنی موسی علیه صلی اللہ وسلم به خیزر چی گفت قالست تجیدنی انشاء الله صابرا ان غریب مرا میبینی اگر خدا بخاد بازم به خدا موکل میکنه هر چیز باید به خدا موکل بشه انسان از خودش نباید به خودش اعتماد به نفس چنانی داشته باشه که بدون خداوند بتونه سر پاش بیسته لذا می فرمد الله صابرا اگر الله بخواهد مرا صابر میابی ولا عاصی لکه امر من امرت را نافرمانی نمی کنم معلوم میشه کسی که کسی را به عنوان استاد قبول میکنه کنه دیگر نباید نا نافرمانیش بکنه هر می میگه بگه چشم وقتی اعتماد بیش هست خب خیزر علیہ السلام, السلام اولین شرط کلاس خودش را گفت اولین شرط اینه که با من همراه میشی سال نکن نگو چرا دلیل نپرس علت نپرس سکوت کن آخر خودت میدونی قال فا این اگر مرا دنبال کردی اگر مرا همراهی کردی فلا تسالنی عن شیء از من سوال نکن از هیچ چیزی حتی احذث لک منه ذکرا حتی من بیان کنم برای تو از اون ذکری من ذکر کنم که جریان چیه من خودم میگم تو نگو چرا این کار را کردی یا چرا نکردی موسی گفت باش قول داد رفتند فان هر دو رفتند اینجا الان سوالی هست که این دوتا رفتن، تا آخر میں این دوتا انجام دادن خب موسیل صلی و علیہ وسلم رفیقی داشت شاگردی داشت حضرت یوشع اون چی شد؟ اون قرآن نگفته که اون کجا رفت الان مفسرین احتمالاتی ذکر کردند یک احتمال اینه که موسیٰ به او گفت همینجا بمان ما میریم جلوتر تو همینجا در مجموع البحره ایم بمان او همونجا منتظر شد تا این دوتا برند و برگردند یک قول دیگه اینه که موسی اون را گفت که تو برگرد برو به شام برو به خانه برو من میام این دو احتمال هست این احتمال دیگر که قوی تر هست. که اونم شاگرد موسی بود، خادم موسی بود، او همراه بود، اون همراه بود ولی در ذکر و دریاد دیگه اسم همراهان را نمیبرند. یک شخصیتی میآید، شما میگید که شیخ خامات. دیگه نمیگی شیخ خصوصی رضا آمدن دیگه. اون خادم را کسی نام نمیبرد دیگه. میگه شیخ خامات دیگه. لذا کسی که به عنوان خادم هست اون را نام نمی برند بس اونم همراه بود ولی قرآن اون را ذکر نکرده قرآن اسم موسی و اسم خز را ذکرده آن اندو رفتند دیگه حضرت یوشا هم به عنوان خادم همراه بود نامی از او برده نشده لذا قرآن می فرماید فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه ته حتی وقتی که سوار شدن کشتی میخواستند که برن به ای داخل دریا برن ای بود این کشتی را کشتیبان و کسانی که سواران کشتی بودن اینا را احترام گذاشتند حتی تو روایت ها میاد که از اینا کرایه نخواستند خزر را شناختند خزر آدم معروفی بود یکی از بزرگان بود پیغمبر بود قابل احترام بود کرایه ازشون نگرفتند گفتن سوار همین طور این وقتی که سوار شدن مقداری که رفتند خیزر شروع کرد یکی تکی از این کشتی را شکست پارش کرد به اسطلاح حتی اذا رکبا فی سفینه خرقها و را پاره کرد تختش را شکست موسا تعجب کرد فراموش کرده موسا توسیه ایف خزره قال اخرقتها لتغرق اهلها این شکستی میخوای اهل کشتی غرق بکنی چرا میخوای خودکشی کنی لطغرق اعلا می خواهی عاقبت این بشه که اهلش غرق بشند لقد چیئتا شیئن امرا تو کار ناپسندی کردی ناگواری کردی کارت نادرست بود خیزر موسی دیگه کاری که بظاہر نادرست باشه تحمل نداره خضر علیه السلام سلام اولین تذکر را داد قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا بهت نگفته بودم تو نمیتونی با من صبر کنی با من همراهی بکنی تو تحملش را نداری موسی به یادش آمد ولی از این جا معلوم میشه فراموش کرده بود موسی گفت قال لا تؤخذني بما ای خضر بر چیزی که من فراموش کردم ماخذ نکن آدم که فراموش بکنه دیگه محاخذه نمیشه آدم فراموش مکلف نیست و لا ترهقنی من امر عسرا در امر من بر من سختی نکن سخت نگیر را میگن تحت پوشش قرار دادن را یعنی در امر من چنان پوشش سختی بر من نیاورد. بر من سختی تحمل نکن دیگه ببخش نه نادیده بگیر باش این نادیده میگیرم فنطلقا دوباره هر دو رفتند هر دو رفتند حتی اذا لقی غلاما حتی وقتی که غلامی را ملاقات کردند غلام معنی پسر بچه پسر بچه نابالغ را میگن غلام فقتلهو خزر علیه صلی او را فورا کشت بچه بود داشت میرفت جایی به او حمله کرد او را از بین برد اونجا وقتی که تو اون جزیره رفتن موسی علیه صلی اللہ ناراحت شد این چکاریه قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس تو کشت یک نفس پاکی را پاک یعنی بگو بدون اینکه نفس دیگ را کشته باشد در عوض نفسی نیست همینطور به نغ چه را کشتی لقد جئت شيئا نكرا انکار نا, نا معقولی انجام دادی منکری انجام دادی ناپسنده کارت خوب نیست این چه کاری که تو داری میکنی حضرت خضر علیه الصلاۃ والسلام این بار با تاکید بیشتر گفت اول گفت اللم اقل ان نک میگه اقل لکه موسیم اگه به خودت نگفتم انک لن تستی مع صبره تو نمیتونی با من صبر کنی تو که تحملش را نداری نه با من همراهی نکن. موسی الان متوجه شد که من نباید اعتراض بکنم. من باید خودم را کنترل بکنم چرا کنترل نمیتونم بکنم ببینم جریان چیه؟ بنابراین موسی این بار عهد کرد عهد موسیوی پیمان موسی قال ان سالتك عن شيء بعدها گفت اگر من از تو سوال کردم از چیزی بعد از این بعد از این جریان بعد از این واقع اگه یک بار دیگه سوال کردم اعتراض کردم فلا تصاحبني مرهم را با خود نبر دیگه مرا همراه نکن این بار سوام ببخش. همه یک بار سب کن. قد بلغت من لدنی عذرا. اون وقت از جانب من تو به عذر رسیدی یعنی معذورید حق داری من نبری. گفت باش این عهد تو هست. این پیمان را بستی عهد را بستی. من یک بار دیگه به تو فرصت میدم. فانطلقا آمدن رفتن دونا. رفتند تو همین جزیره به یک روستای رفتند اول گفتم به مردم روستا که به ما مقدار غذا بدیم ما گرسنیم راه طولانی آمده بودند و در راه مذاکرات هم زیادی بوده قرآن همون مقصودی ها را ذکر می کند اونا که غیر مقصودی هستن ذکر نمی کند فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریتن حتی وقتی که پیش یک قریه آمدن استطعما از اونها طعام خاصتا، گفتن غذا ما بده مقداری نان غذا چیزی نیست، گروسنه حسین استطعما اهلا از اهل اون طعام خاصتا، فأبو ان یضیفوهما، اونا انکار کردن که بینها مزوانین هربو کنن بینها، زیافتی بهشون بدن قضایی بهشون بدن نداردن گفتن نه نداریم نمیدیم هر چی گفتن خلاصه ندادند. نداردن اینا شدند میخواستن برم بیرون از روستا گوشه روستا دیواری بود این دیوار کج شده بود در شرف سقوط بود میخواست بیفته خیزر علیه صلی اللہ گفت بیا کمک کن این دیوار رو درست میکنیم خضر استا و موسی شاگرد دیوار را تعمیر کردند با شکم گروسنه چقدر اذیت شدند تا کار تمام شد آخر کار تمام شد بدون نتیجه نه ریالی دریافت کردند نه نا قرسنانی موسی علیه سلام اینجا اعتراض نکرد داد دیداد موسی گفت که فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَن يَنْقَضَّ انجا دیوار ردیدن که مخاص بیفتے یوریدو یعنی یکادو نزدی بود که اَن يَنْقَضَّ اَن يَسْقُتَ بیفتے فاقامه حضرت خزر علیه السلام دیوار را, را, را راست کرد. موسی گفت که خب ب خدا از صبح اینجا کار کردیم گرس ن هستیم همین رو دروازه می کردیم می گفتی دو قررسنا به ما بدید من دیوار شما رو درست میکنیم. قالاله وشه اطلت تخصه عليه اجره. اگر میخواستی بر اینت مزدی می گرفتی یه پولی می گرفتی ما خودمون گرس نه هستیم خز گفت ببین مسا دیگه بر اساس همون عهدی که تو با من بستی، و بعدی که تو با من کردی دیگه تمام بیشتر از این تو با من همراهی نمی کری قال هذا فراق بینی و بینک این جدائی هست وقت جدائی است بین من تو دیگه من تو همراه نمی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم وقتی که این آیه را می و اینجا رسیدند و داستان خزر موسی را فرمودن کاش موسی صبر می کرد کاش موسی صبر می کرد چیزی نمی گفت تا ما می جلوتر چه چی چیزهای می بینند و جلوتر چه خبرهایی هست یعنی گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم هم علاقمند بودند مثل من و شما که موسی اعتراض نمی کرد تا جلوتر ببینیم چون اینجا سه تا از اسرار را ما می دونیم سه تا اتفاق که بظاهر ناگوار بودند ولی این اتفاقات پشت سرشون چیزهایی هست. من اینجا ادامه میدم اینشالله آیات را. اما یک مطلبی را میخوام از کنم. گاهی برای ما هم اتفاقاتی میافته، حوادثی میافته که ما وقتی که به نفس حوادثه، به نفس اتفاق وقتی که نگاه میکنیم برای ما قابل تحمل نمیشه، صبر نداریم. اما وقتی که حکمت که خدا هر کار خدا حکمت داره ولی اینجا تا از حکمت ها حضرت خزر بیان کرد بقیه حکمت های کارای خدا رو نمیطوریم حکمت های خدا که داره حتما داره در هر کاری، اون حکمت ها چون وقتی که نمیدانیم و در نظر نمی گیریم داد و فریاد زیاد میکنیم بی صبری زیاد میکنیم لذا همیشه، حادثه ای که از سوی خداوند است اتفاقی که خدا پیش میاره یه تصادفی میشه یه جایی مالی را شما از دست میدهید ورشکت میکنید شما بدون قطعا حکمتی داره خیری داره اگر به اون بعد حکمتش که ما اون را نمیدونیم چیه به اون بعد حکمتش ما فکر بکنیم حتما ما صبور میشیم حتما ما تحمل میکنیم ولی اگر به بعد حکمتش نگاه نکنیم نادیده بگیریم خب انسان طبیعی خیلی غمگین میشه خیلی برای انسان فشار میاد آن. لذا این نکته رو میخواستم کنم با توجه به این داستان موسی و خزر همیشه حکمت ها را شما در نظر داشته باشید خب خیزر گفت که هادا فراق بینی و بینک ای موسیٰ این دیگه جدائی من و تو هست سا که داریم بر میگردیم، ان قریب برای تو بیان میکنم، بهت خبر میدم، به بتاویل ما لم عليه صبره. صبر یعنی توجیه کارهایی که تو نتوانست بر اونها صبر کنی توجیه انها را بیت می دلیل را می گم علت را بهت می علت اولی حکمت جریان اول اما سفینت فکانت لما اما این کشتی کشتی مال چندتا تا مسکین بود قبلا خدمت شما در تعریف فقیر و مسکین ارز کرده بودم که بعضی گفتم مسکین اونه که هیچ نداره بعضی با توجبین آیه گفتم مسکین اونه کی کمکی داره لا داره یک درآدی داره اما این درآدش کفاف نمیکنه اینا الان ببینید بعضی گفتن ده تا مسکین بودند شریک بوده یک کشتی همه با هم کرایکششی میکرد به صورت نوبتی پس اینا رو قرآن مسکین می گ پس معلوم میشه اون کسی که درآمد اندکی داره درآدی که کفافش نمیکنه و گرس میمانه، بچه‌هاش گرسنه میمانند نمیتونه از این درامدش بچه‌هاش را کاملا سیر بکنه یا نمیتونه برای اونها واقعا برای عیدشون لباس بخره یا نمیتونه با این قسط هایی که مثلا داره وامدار احس برداشت بکنه این مسکین است به این شما میتونید کمک مالی بکنید به این میتونید زکات بدهید ولو این که اون درآمد اندکی داشته باشه بساتی داشته باشه لذا می فرماید این کشتی مال مساکینی بود که یعملون فی البحر در دریا کار میکردند فاردت ان اعيبها من خواستم که اون را معیوب بکنم معیوب بشه از نظر اون پادشاه ظالمی که اونجا جده و را چک میکنه از نظر او میفته او میگه این به درد نمیخوره من میخواستم معیوبش بکنم الان ببین این کشتی معیوب که برای صاحبانش میماند فردا میتونه عیبش را بگیرن این بہتر یا نه اصلا بیکشتی بشند همون اولی بهتره دیگه پس اون چیزی که من کاری که من انجام دادم حکمتی داشت گاهی برای شما هم یک پیش پیشمیت ناراحت نباشت به عنوان مثال یک کسی ماشینش میخواد با ماشین بر شب اجل در سویچ را گم میکنه این ناراحت میشه میزنه تو گوش این بچه تو گوش اون بچه نمیدونه چه حکمتی هست اینکه با ماشین نری بهتره، تو نمیدونه در و جلو را چه خبره لذا هر کاری که انجام میگیره خدای از و جل در حکمتی گذاشته لذا برای حوادث و اتفاقات ناراحت نباشید وکانا وراءهم ملک ياخذ كل سفينه غصبا یعنی ورای اون اون طرف اون این دلیل پاره کردنی کشتی است پادشاه ظالمی بود که ياخذ كل سفينه میگرفت هر کشتی را هر کشتی صحیرا سفینه صحیحه سفینه سالمی را غصب کرد لذا من نخواستم کشتی اینایی که به منو تو اینقدر احسان کردن منو تو را مفت بدون کرایه بردن نخواستم به دست اون پادشای ظالم بیفته لذا کشتی سیم را شکستم تا بالاخره این کشتی کشتی معیوبی بشه حکمت کار دوم این بچه و اما الغلام اما این پسرک فکان ابواه مؤمنین پدر و مادرش مؤمن بودند، پدر و مادرش مؤمن بودند، اما در آینده این بچه فساد و کفر و ارز کنم شرک و اینها نوشته شده، فخشینا این یرحقهما، ما ترسیدیم که این یرحقهما تغیانا و کفرا، این بچه اون پدر و مادر را تحت پوشش قرار میده، از نظر تغیان و سرکشی و کفر یعنی اونها را اونا به دلیل محبت بچه اونا هم کافر نشند اونا هم دین بچه را انتخاب نکنند شما دیدید که بچه ها خیلی تأثیر روی پدر و مادر میذارند متاسفانه پدران و مادران کمتر تأثیر روی بچه میذارند بچه ها زیاد تأثیر میذارند ما دیدیم بعضی از پدرها و مادرها هستن که الحمدلله مومنن نماز گزارن اما نمیتونن بچهشون را نمازی بکنه البته این دلیلش علت اصلش اون تربیت اصلیه که ما بر اساس اون روشی که رسول الله فرموده تربیت نمیکنیم. خب این پدر و مادر نمیتونه در بچه تاثیر گزار باشه پدر و مادر نماز میخانه بچه نماز نمیخونه پدر و مادر روزه میگیره بچه روزه نمیگیره اما میبینیم بچه وقتی که بزرگ میشه و محبوب پدر و بادر میشه بچه تاثیر میگذاره در پدر و مادر. مثلا پدری هست که نه نماز میخونه نه توجهی داره یه میبینیم بچهش میره جماعت بچهش خوب میشه بچهش نمازی میشه چون پدر این بچه را دوست داره از همین بچه رنگ میداره، نمازی میشه این بچه کم کم پدر خودش را هم میکشه به مسیر خودش اون را هم نماز گزار می میکنه، پس بچه ها تأثیر بیشتری دارند تا اینکه پدر و مادر برور بچه تأثیری داشته باشند. لذا ما می که این پدر و مادر و مومن را این بچه فردا گرفتار کفر و شرک و گناه و معصیت نکنه پس خدا اراده داشت این بچه بمیرد یک بچه دیگری جائگوزین این صالح به آنها بدهد اونی که مقدرش این کفر و شرک نباشد لِذَا فَأَرَدْنَا اَنْ يُبْدِ لَهُمَا رَبُّهُمَا خیرا منه زَكَاطًا پس ما اراده کردیم اَنْ يُبْدِ لَهُمَا رَبُّهُمَا اینکی تبدیل بکند برای اون پدر و مادر ربشان بهتر از اون بچه زکات از نظر پاکی در دین و اقرب رحمه از نظر شفقت پدر و شفقت نزدیکتری داشته باشه یعنی بیشتری داشته باشه خدا خواست که به اینها فرزندی بده که این فرزند فردا هم شفیقتر باشه و هم از نظر پاکی دینی پاک باشه زکات شما قبلا خاندید زکات در دین یعنی پاکی از شرک یعنی فرزند مشرکی نباشه سومین جریان که دیوار را درست کردم و اما الجدار اما دیوار ای موسیٰ فکان لغلامین یتیمین این دیوار مارد دو تا بچه یتیم بود که فی المدینه تو شهر بودند و کان تحته کنز لهما زیر همین دیوار یه ای بود مال دو دوتا بچه بود وکان ابوهما صالحا پدر این دوتا بچه آدم صالحی بود فوت کرده الان یتیمن دیگه اگر این دیوار می افتاد مردم اون خزانه را می دیدن بر می فردا این دوتا یتیم از اون نعمت ارث پدر محروم می پس خدا اینجا چه اراده کرد ف آراد ربک انبلغا اشد ربت خواست که این دو بچه به سن رشد و به سن قوت برسند و استخرجا کنده هما خودشون خزانه خودشون را بیرون کنند رحمت من ربک این رحمتی بود برای این دو بچه از جانب رب ببین اینجا من چند تا نکته در کلماتی که قرآن آورده میخوام ارز کنم بیشتر برای طلاب عزیز اینجا تا حادثه هستند اما سیغه هایی که قرآن استفاده میکنه به نقل از خزر فرق میکنه در اولین سیغه که شکستن چی هست؟ شکستن کشتی هست اونجا خیز میگه فعرد تو من خواستم من اراده کردم دومین دو که کشتن بچه هست و بعد جایگزین کردنش اونجا میگه فعرد نا ما اراده کردیم سومین سو که اصلاح دیوار هست اونجا میگه فعرد ربک رب تو اراده کرد چرا این سیغه ها اینقدر متفاوته ببینید همه کار را خدا میکنه اما ادب این را تغذا میکنه که اون کاری که ناپسنده اون را به خود نسبت بده اون اولین بحث شکستن و خرابی هست اونجا میگه فرات تو من خواستم دیگه نمیگه خدا خواست که کشتیشون خراب بشه میگه من خواستم همینطور وقتی شما و یک کاری خراب میشه نگید که خدا خواسته بعضی هم میگن که چرا این انسان را به نحق کی؟ میگه خدا خواسته. یعنی چه خدا خواسته؟ یعنی خدا خواسته تو بره قتل بکنی؟ تو بری انسان را به نحق بکشی؟ درسته هر چیز بدون خواست خدا نیست رضایت خدا چیزی دیگه هست خاست خدا چیزی دیگه هست. ولی انسان یک کار نادرست را به خدا نسبت؟ نده چرا این کار خوب را کردی بگو خدا خسته این به خدا نسبت. دید. ببین خزر همین کار را میکنه. اونه که اونجا خرابی خرابی میگه فرد تو ب ظاهر هیچ اصلاحی نیست. اما در دومی دو, دو داره یک بادش کشته شدن بچه هست یک بادش جای گزین کردن این بچه با یک بچه دیگه. خب اون کشته شدن را به خود نسبت میده. اون جایگزین کردن بچه را به خدا نسبت میده چی میفرماید؟ فعردنا ما خواستیم ما خواستیم یعنی من کشتم خدا جایگزینش. بچه صالح تری داد اما ثومیم بحث خرابی نیست اونجا بحث چیه؟ اصلاحه بحث درست کردنه اینجا در ثومیم میگه فعراد رب بکنم میگه من خواستم یا منم شریک رب تو خواست متوجه شدید پس این یعنی کمال ادب انسان حتی کلماتی که نسبت به پروردگار میگه در این کلمات هم ادب را رعایت بکنه رعایت بکنه این یک نکته و نکته دیگری که برای شما پدران دارم از این آیه قرآن مجید استنبات میکنم هر کسی از ما پدر هستیم برای همه ما که پدر هستیم. اگر میخوایم بچه های ما صالح بشند، اگر میخوایم بچه های ما با ایمان بشند، بچه های ما خائن نباشند. پس از خودمون شروع کنیم، خودمون خوب بشیم، خودمون صالح بشیم، خودمون دیندار بشیم، خودمون با تقوا باشیم. این صلاح ما را خدا اطلاع در بچه ها منتقل میکنه چطور؟ ببین اینجا دیوار می خواد دو تا پیغمبر را خدا ماموریت داده بری این دیوار را درست کنید. چرا؟ چون میگه وکان ابوهما صالحا. پدرشون پدر صالحی بود. یعنی خزانه این بچه ها محفوظه به حکم خدا به دستور خدا اونم توسط دوتا پیامبر اون دیوار باید درست بشه چون پدرشون پدر صالحی بود الله میخواد که فرزندانی پدر صالح دنیایشون ضایع نشه خزانشون زائی نشه پس وقتی خدا میخواد که دنیای فرزنده یک پدر صالح زائی نشه دینشون را بطریق اولا نمی زائی بشه یعنی وقتی که پدرها صالح باشند، دیندار باشند، الا ما شاءاللہ خدا یکی را مقدر کرده مثل فرزند نو، اونجای خود را دارد. اما وقتی که پدران واقعا پدران دینداری باشند، رزق حلال بخورند، رزق حلال بخوره بچه بدند، اخلاقشون در خانه خوب باشه، در خانه دروغ نگند، تاسفانه خیلی تو خونه ها دروغ گفتن است. آقا در میزنه میگه برو بگو که اینجا نیست. خود داری به بچه دروغ یاد میدی. اینا دیگه تاثیرات منفی دارند. لذا وقتی که فرزندان پدران صالح باشند حتما فرزندان هم صالح خواهند شد. و صلاحشون تاثیر میگذارد. لذا می و کان ابوهما الصالحه چونکه پدرشان صالح بود فا اراد ربکا این یبلغا شده هما رب تو خاص که این دو بچه بسن بلوغ و سن رشد برسند و یستخرجا کنزه هما خودشان خزانه خودشان را استخراج کنند رحمتم من ربکا این رحمتی از جانب رب برای این بچه ها بود این مفعول لهوی اراده هست اراد رحمة من ربک وما فعلته عن امری ای موسا من خزر انکارها را به امر خودم نکردم من به امر الله انجام دادم خدا بمن دستور داد انکار را بکنم معلومش نبی بود که دستور خدا را اجرام می کنه ذالک تأویلو ما لم تست علیه صبرا ای موسیٰ این تأویل آن چیزی هست که تو نتوانستی بر این صبر کنی تو نتوانستی بر این صبر کنی لذا الله عز و به این صورت موسیٰ را تفهیم کرد که موسیٰ بر دانش, دانش, دانش خودت داشتهای خودت دانستنیهای خودت زیاد بالاخره خوشحال نباش که تو چیزی بلدی از تو بلاتر هست موسی متوجه شد که موسی هیچ چی نمیدونه تفسیرها نوشتن اللہ و عالم وقتی که خیزر و موسی علیه صلی و سلام برگشتند دوباره سوار کشتی شدند سوار کشتی شدند و یه پرنده آمد بر لبه کشتی و نوک یک قطر آب خورد از آب دریا خضر علیه سلام به موسی چی گفت گفت که ای موسی علمی که تو داری و علمی که من دارم و علمی که بقیه تمام خلایق داره همه این علم ها را جمع بکنیم در مقابل علم خدا به اندازه همه یک قطر آبی که این پرمده برداشت از نسبت به کل دریات چقدر است علم ما نسبت به علم الله همین قدر هم نیست واقعا انسان هر چی داره از الله داره انسان چی بلد هست این بالاترین انسان ها بودند اینا انسان های بودند که بشریت را هدایت کردند اینا در مقابل الله بعضی وقتا متاسفانه ما انسانها الله را نمی شناسیم معرفت نداریم شناق نداریم چون قرآن نمی خانیم صفات خدا تو قرآن است. قرآن نمی میاریم بندگان خدا مثل خدا قرار میدیم علی عزبالله خدا آلم میگه بنده خدا آلم الغیبه خدا از فردا میدونه بنده خدا از فردا میدونه علی عزبالله لذا این در واقع نشعت میگیره از جهل از نادانی بالاخره این شبه هم مرتفع شد که خیزر چیزی نمیدانست. بعضی میگه خیزر علم غیب داشت نه و ما تو عن امری ای موسی من هرچی کردم بنابر امر خودم نکردم بل عن امر ربی من به دستور رب این را آره کردم عالم الغیب خیزر نبود عالم الغیب اون اللهی بود که به خیزر دستور میداد. اینجا این کار بکن اینجا این کار بکن علا ای حال می رسیم به شبهی چارم سوال دیگر درباره زلقرنین الله تعالی آغاز می فرماید با این کلمات آیه را آغاز می‌فرماید و یسئلونک عن ذلقرنین ای پیامبر شما را درباره ذوالقرنین می‌پرسند قل ساتلو علیکم منه الذکرہ بگو من ان قریب درباره اون برای شما ذکری می کنم یعنی یاد می کنم که قرنین کجا رفت چی کرد چه بلادی را تصرف کرد اِنَّا مکننا له فِي الأرض. الله می فرماید ذلقرنین را ما قدرت دادیم در زمین تمکین حکومت کی بیش الله داد پس این قدرت خدایی نداشت قدرت بشری داشت الله به حکومت داده بود بنابراین شما بنازيد بقدره الله و هذا ذو الله قدير ناز بندگانی که خدا به اونها چیزی میده ان مكننا له في الارض ما بهو در زمین تمکین و قدرت دادیم و اعتیناه من كل شيء سبب از هر چیزی ما بی او اسباب دادیم اسباب یعنی چه یعنی اسباب ضروری حکومت و سلطنت اسباب ضروری پیشرفت یعنی هر چیزی که نیازش بود اسباب عادیه مثل سواری، مثل مرکب، مثل اسلحه، مثل سرمایه، اقتصاد، مادیات همه اینها را ما بهش داده بودیم به این معنی هست که ما به اون اسبابی که اسباب پیشرفتش باشه دادیم فقط به سببا اون هم اسباب را دنبال کرد یعنی با این اسبابی که خدا بهش داده بود فتوحاتی در جلوتر انجام داد کجا رفت زلقرنین حتی اذا بلغ مغرب شمس حتی وقتی که رفت به مغربش شمس یعنی به جایی که خورشید غروب میکنه. کنه اولا من در رابطه با خود کرنین مقدار کمی توضیح بدم بعضی توضیحات بعدن میآید؟ زول کرنین اون طوری که مفسرین گفتند نام یکی از پادشاهان یا لقب یکی از پادشاهان است. یک پادشاه ساله پادشاه دیندار پادشاهی که از خدا خط گرفت. الله می ما به زل گفتیم، زل این کار بکن؟ یا انکار بکن، قلنا از القرنین، اما انت عذب و اما انت تتخذ فیم عسنا، از ای القرنین اینجا داری. خدا بهش دستور میداد دستور خودش را زل قرنین از کی میگرفت؟ از خدا میگرفت. به نابرین گفتم پادشاهی، بعضی ها گفتم پیغمبری بود. زل قرنین چی بود؟ پیغمبری بود که خدا میگه ما بهش گفتیم. اما بعضی میگن نه خداوند به او الهام میکرد پادشاه صالح بود از اولیاء بود خدا در دلش القامی کرد بعضی میگن نه خداوند به وسیله پیغمبر وقت بهش القامی کرد الان زلقرنین کیه بعدا میخانیم بعضی میگن در زمان سیدنا ابراهیم علیه سلاط و السلام بوده پیغمبر وقت ابراهیم بوده ابراهیم بهش میگفت زلقرنین این کار را بکن ای ای حالین چرا بیش میگن زلقرنین چرا بیش میگویند زلقرنین اصل قرن کسانی که عربی بلد باشن به معنی شاخ زلقرنین یعنی داره دو شاخ چرا بیش میگن زلقرنین بهترین توجیه اولین توجیح هست توجیهات بعدی هم هست چونکہ دو, دو شاخ دنیا را تصرف کرد دو شاخ دنیا دو شاخ دنیا یعنی دو ابر قدرت دنیا هم فارس هم روم به این خاطر بهش میگن زلق کرنین کسانی که قدرتمند باشم بی اونها میگن شاخ نه هر دو شاخ است هم بر بلاد فارس حکومت کرد هم بر بلاد روم حکومت کرد پس مشرق و مغرب را چون اینجا که ایران هست بعد از این شرق همه جزء ایران بود اونجا که روم بود در غرب بعد از اون همه غرب مالکی بود روم بود حتی خدمت شما عرض کردم در زمان رسول الله همین کشورهای عربی امروز اینها یا جزء ایران بودند یا جزء روم بودند مصر جزء روم بود سوریه و شام جزء روم بودند از به خدمت شما عراق جزء ایران بود یمن جزء ایران بود یا هر یکی از این یا با ایران بود یا با روم بود پس اون زمان هم این دوتا شاخ بودن دوتا ابرقدرت بودن این هر دوره تصرف کرد به این دلیل بهش میگن زلقرنین این دلیل اولش است دلیل دوم فتوحات شرق و غرب بازم همون نتیجه میشه مشرق زمین مغرب زمین دلیل سوم بعضی گفتند دوتا غده داشت دوتا نشان دیدید بعضی تو اکسا هست یک آدمی دوتا شاخ دار یک اینجا یک اینجا مثل حیوانات چون دوتا شاخ در سر خودش داشت به قدرت خدا بهش میگم ظلف کرنه والله عالم دلیل چارون که ذکر کردن دوتا ظلف داشت موهایش و ظلفهایش دراز بود و تا اینجای بدنش بود به این خاطر میگفتن زلقرنین چون هر بخشی از زلف زن، زنها را میگن یک قرن است، یک شاخ است و دلیل پنجم بعضی گفتن نجیب و طرفین بود یعنی هم از طرف پدر و هم از طرف مادر حسب و نسب بسیار بالایی داشت نجیب زاده بود از هر دو طرف دلیل ششم بعضی گفتن به اندازه دو قرن عمر کرد یعنی دویست سال به این خاطر ذوالقرنین میگن دلیل هفتم بعضی میگن چون با هر دو دست می جنگید با هر دو دست مثل تیموری لنگ میگه من با هر دو دست شمشیر می زدم این با هر دو دست شمشیر می زد به این خاطر میگن ذوالقرنین این دلایل است که تو تفسیرها هست ولی همون اولی صحیح تر است خب این ذوالقرنین به مشرق زمین رفت اول به مغرب زمین رفت اونجا حکومتی بود اون حکومت ها تصرف کرد بعد از روم اون زمان حکومت ها اسمشون یک حکومت در مغرب زمین بود به نام میدیا و یک ریدیا که پایتختش ساردیس بود اونجا رفت کرد بعد از اون رفت و رفت اونجایی رفت که قرآن تعبیر میکنه اونجا اینطور به ظاهر معلوم میشد که خورشید داره تو آب غروب میکنه شما دیدید دریا وقتی کناره دریا رفتید غروب چابهار غروب قشم غروب کیش میگن نه وقتی که نگاه میکنی احساس میکنی که خورشید داره تو دریا غروب میکنه یک کودنی یک احمقی بر قرآن اعتراض کرده یکی از مسیحیان، میگه ببینید قرآن قرآن چقدر از نظر علم عقب است. که قرآن میگه تو داستان زلقرنن میگه خورشید تو دریا رفت در حالی که خورشید یک میلیون و سی ست هزار برابر زمین هست. زمین با تمام دریاها و خشکیهاش به اندازه یک میلیونوم. خورشید نمی رسد اون وقت خورشید چطور تو دریا میاد این قدر این احمق متوجه نیست که قرآن میگه وجد یعنی از نظر دید اینطور معلوم میشد نگفت حقیقتا اونجا غروب میکرد. از نظر دید و از نظر چشم اینطور معلوم میشه که خورشید داره تو دریا اونجایی که گلولای بود اونجایی که سیاه و متعفن بود احساس می‌کردی که تو اون گلولای خورشید در غروب می‌کنه خب مگر همینطور نیست هر کسی بر خورشید را از اونجا نگاه بکنه یعنی مغرب ترین اینجا کنایه از این است که مغرب ترین بخش زمین رفت به این معنی است نه اینکه اونجا حقیقتاً خورشید تو دریا می‌افتد لذا الله می‌فرماید که حتی اذا بلغ مغرب شمس حتی وقتی که رسید به مغرب زمین اونجایی که محل غروب خورشید است وجدها ببین یافت آن را نگفت کانت تغروب خورشید غروب میکرد یافت او را یعنی از نظر دید اینطور معلوم شد کنایه از این است که اینقدر به طرف غرب رفته بود اینقدر به طرف ارز کنم که مغرب زمین رفته بود که اینطور معلوم می شد که خورشید تغرب و فی عین حمیت در اون چشمهی که چشمه گلولای لای بود گل بود اونجا اونجا آخر بلاخره چش... آب بود و گل بود و وجد عندها قوم همونجا یک قومی را دید که زندگی می کنند خدای عزواجل به زلقرنین گفت ای ق... زلقرنین این شهر را که تصرف کردی این ملت که الان در اختیار تو هست اینا غیر مسلمان هستن اختیار مال تو هست اینا رو میکشی از با اینها برخورد خوب میکنی خداوند به ذوالقرنین اختیار داد ببینی آیه را قلنا ما گفتیم ای ذوالقرنین اما ان تعذب یا تو عذاب بده اینها را یعنی قتل و اسارت و زندان و و اما انت تتخذ فيهم حسنا يا انكي میگیری در باره اونها حسنا یعنی برخورد حسن باشون خوب برخورد میکنی چیکار میخوای بکنی زلقرنین گفت بار الها من اینها را دعوت میدم به سوی ایمان و به سوی عمل صالح هر کسی ایمان آورد و عمل صالح انجام داد جزای نیک اما هر کسی نکرد من اون را از بین میبرم یا او را شکنجمی دهم قال اما من ظلم فسوف نعذبه گفت پروردگارا اما هر کسی ظلم کرد ظلم کرد یعنی چه تفسیر روح نوشته یعنی لم یقبل دعوت من مانا نپذیرفت و اصرار کرد بر کفر و شرک و اصر على ما كان عليه من الظلم العظیم الذي هو الشرك گفت نه من ایمان نمیارم من شریک با خدا میگیرم من غیر خدا رو عبادت میکنم خب فصفا نوذب اونا ماش کنج می دیدیم اون رو به کیفر اعمالش میرسانیم بعدا پیش تو میای خدایا تو که عذاب همیشه می دی ثم يرد الى ربه سپس برگردانده میشه به سوی پروردگار فیعذبوه عذاب النکر خدا او را عذاب میده ایک عذاب ناگوار عذاب دردناک و اما من آمن اما هر کسی دعوت من فزیروفت ایمان آورد و عمل صالح انجام داد خب با او کار نداریم تو خود جزای نیکی بیش میدی فلہو جزا عن الحسنا برا او جزای زیباس یعنی بهشت است و سنقول له من امرنا یسرا ما در باره کار خودمون با او با نرمی برخورد میکنیم یعنی باش مراوده میکنیم برخورد حسنه میکنیم خدمتش میکنیم ثم اتبع سببا بالاخره اینجا وظیفه ذوالقرنین تمام شد از مغرب حرکت کرد آمد به طرف مشرق ببین چقدر دور است چند سال طول میکشه با امکانات اون زمان ثم اتمع سببا سپس دنبال کرد با اسبابی که ما بهش دادیم ادامه داد راه خودش را آمد و آمد یعنی سفرش را ادامه داد حتی اذا بلغ مطلع الشمس حتی وقتی که به مطلع خورشید رسید یعنی از قسمت مشرق زمین آمد این قسمت کیا بودند؟ ارز کردم اهل ایران و شرقی ها وجدها تطلعو اون زمان این زمان مال خیلی وقت پیشه دید که تلو می کند بر قومی که لم نجعل لهم من دونها ها سترا بغیر از خورشید ما برای اونها قرار نداده بودیم ستری ستری یعنی پرده ای منش این که خورشید تلو میکرد این بندگان خدا خیلی اذیت بودند نه لباس داشتند نه سقف داشتند نه چادر داشتند نه سایه بود چون که بلد نبودند انسان های وحشی بودند به این معنا هست که اونجا وقتی که آمد تطلعو على قوم تلو کرد بر قومی که لم نجعل لهم من دونها سترا این مردم امروز مردم مشرق زمین کیا هستند امین چینی ها هستند همین ارز کنم که اهل میانمار و برمه هستند همین تایلندی ها هستند همین هایی که بودایی هستند اون زمان بالاخره احالی مشرقی نه هستند اون زمان هیچ چی نداشتند لم نجعل من دنیا من دون شم سترند کذالک اینگونه شد و قد احطنا بما لده خبره ما احاطه کردیم از اون چیزی که نزد زلقرنین بود از نظر خبر یعنی ما همه چیز را به زلقرنین خبر دادیم اطلاعات را دادیم زلقرنین این هم خدمت شما بگم یه پادشاه صالح و سالم بود هر جمعی رفت آبادانی می آورد خدمت می کرد برای مردم کار می کرد خلاص تفصیلش را قرآن نگفته چون اصل جوابی این سوال است سمعت و عصب با سپس دنبال کرد با اسبابی که داشت دنبال کرد و ادامه داد سفر خودش را تا اینکه به شمال آمد شمال آمد ببینید شمال ایران معلوم میشه که اون زمان مشرقی آمد مشرق ایران شمال هم شمال ایران فارس میگویند. به طرف جنوب نرفت چرا چون جنوب همش دریاست این طرف انسانی زندگی نمی کنه دیگه جنوب به دریا برخورد میکنه اما شرق برو تا جایی که دلت بخواد زمین و انسانه غرب برو همچنین شمال برو هم ما من قبل از اینکه اینجا توضیحاتی بدن چون نیاز هست در رابطه با اینکه شمال چه خبر بود؟ توضیح بدم قبل از این خود باره خود زلقرنین قرنین کی بود؟ من در رابطه با قرنین از کنم که اختلافات زیادی هست شما اگر خودتون تو تفسیرها بریم بگردی سرگردان میشید اما یک قولی که معروف هست اول من اون را ذکر میکنم و ردش میکنم بسیاری میگویند که قرنین اسکندر مقدونی هست یا اسکندر رومی زلقرنین اسکندر رومی هست یا اسکندر مقدونی ببینید اسکندر رومی یا اسکندر مقدونی اگر زل هست چون این هم دنیا رفت کرده مشرق و مغرف فتوحاتش رفته ولی اون زلقرنینی که قرآن میگه این نیست به چند دلیل اولین دلیلش اینه که اسکندر مقدونی یک پادشاه کافر بود وزیرش فیلسوف معروف ارستو یا ارسطاتالیس که شما تو منطق خاندید اون ارستو وزیر اسکندر مقدونی بود این مسلمان نبود اون زلقرنه شما خاندید که با ایمان بود با خداون رابطه داشت از خدا خط می گرفت از خداون دستور می گرفت این تمام دنیا را به دستور خدا برای پیام رساندن پیام خدا گفت خدای هر کسی که ایمان بیاره دعوت من را قبول کنه ما باشکار نداریم هر کسی نیاره ما را شکنجه میدیم، پس کار زلقرنین نیابت از طرف خدا از زوجل بود بنابراین اسکندرز عز کنه مقدونی چون وزیرش ارسطو بود فیلسوف اینا اصلا اعتقادی به خدا نداشتند کافر هست این یک دلیل که اسکندر رومی ذوالقرنین نیست و دلیل دوم اینکه اسکندر رومی در زمان 300 سال قبل از مسیح بوده عیسی علیه الصلاه و بوده تاریخ اسکندر رومی که هست 300 سال قبل از سیدنا عیسی آلے سلَّاتُ اما اون زلقرنین اون چندیس سال، بعضی میگن که پانصد و شش سال قبل از میلاد میلادی بوده یعنی سیصد سال قبل از این اسکندر هم بوده. و بعضی بیشتر گفته در بخاری یک روایتی است که زولکارنین قبل از سیدنا ابراهیم بوده. زولکارنین کی بوده؟ قبل از سیدنا ابراهیم آلے سلَّاتُ بوده. شعره بخاری میگوید گوید وفی ایراد المصنف ترجمت زلقرنین قبل ابراهیم اینکه مصنف می فرماید زلقرنین قبل از ولادت ابراهیم بوده اشارتن الی توحین قول من زعما اشارت به اینکه کسانی که فکر می کنن زلقرنین زعما انه الاسکندر اليونانی اسکندر یونانی هست و شیحر عزیزان خاموش کنید اسکندر یونانی هست یا اسکندر رومی هست این قول قول سست و ضعیفی معلوم میشه نیست خرنین این نیست لذا ثابت شد که این نیست این اسکندر یونانی کافر بوده اما این چه کسی هست و چه زمانی بوده قرآن این رنگ الله بهتر میدوند اما بسیاری از اهل تفسیر ما کنجکاف شدند دنبال کردند تاریخ را اقوال زیادی هست بسیاری معتقدند که اصالتاً زلقرنین عرب بود زلقرنین عرب بود و به بخدمت شما از اهل یمن بود اما بسیاری دیگه معتقدند که نه عرب نبود عجم بود از عجمها یکی از پادشاهان در تاریخ شما شاید اسمش را دیدید کیقوباد کیقوباد ابن ملوک العجم بسیاری میگویند که کیقوباد بود یک کتابی از کتاب عقیدت الاسلام مال یکی از ما ماست از علماء هندوستان ایشون میفرماید که همین اقوال را زیکرد بعدا میگید و الراجح انه ليس من ازوای اليمن ازوای اليمن ازون قبایل يمنی هم نیست ولکه قباد ابن ملوك العجم ذو که قباد هم نیست ولکه هو اسكندر ابن فيلفوس اون اسكندر ابن فيلفوس که همون اسكندر مقدونی باشد هم نیست بل ملك آخر من الصالحين ایشون معتقد است که زلقرنین نام پادشاهی از پادشاهان عرب است ینتهی نسبه الی العرب سامیین الاولين نسبش به عرب سامیین اولین برمیگردد قبل از ابراهیم علیہ السلام سامیین بودند نسبش به اونجا می رسد این قول ایشون هست اما یک قولی که بنده شما را خدمت شما ارز بکنم و امروز این قول زیاد تو ایرانی ما سر صدا هم کرده اون اینه یکی از اولمای بزرگ دیوبند مثل به نام کنم که فراموش شد اسمش مولانا ابوالکلام الکلام آزاد مولانا ابو آزاد اشو معتقد است که ذوالقرنین هم کوروش هست کوروش کبیر که ایرانی ها معتقد هستند و بسیاری از تفسیرهای معاصر که نوشتند نظر ایشون را و دلایل ایشون را نسبت به تمام دلایلی که در کتاب های دیگه آمده در تفسیرهای قدیمی آمده دلایل ایشون را قوی تر مثلا حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی که کتاب قصص القرآن را نوشته تمام داستانهای قرآن را در دو جلد زخیم که انشاءالله فرضی ترجمه میشه شاید چارپن جلد بشه مرکز تحقیقات دارالوم ترجمهش میکنه ایشون کتابی نوشته در اون کتاب هم ایشون نوشته که نظر بنده هم همین از دلایلی که مولانا ابو آزاد رحمه الله ذکر می کند معلوم میشه که قرنین از به خدمت شما که کیه همین کوروش هست که در عربی بهش میگن خورس و در فارسی بهش میگن کوروش و بسیاری از مفسرین دیگر مثل یک مفسری هست که بنده این روزها تفسیرشون را مطالعه می کنم از فقها هم از مولانا خالد سیف الله حفظه الله ایشون واقعا در تفسیر کمال کرده گرچه تفسیرشون بسیار مختصره ایشون هم همین نظر را ترجیح می چون واقعا ابوالکلام الکلام آزاد دلائلی ذکر کنه که اون دلایل دلایل قوی هستن ایشون معلوم میشه که آمده خودش در همین کوهای شیراز این که محل از مرکز کوروش بوده و نماد کوروش هست و کتیبه های بی ستون را همه اینها را تک تک اینها را خانده و میگوید با اون چیزی که به عنوان یک ارز پادشاه پادشاہ سالح و سالم و عادل و اون چیزی که در تاریخ ما می خانیم با همه اینها ارتباط داره که این همین کوروش است. مثلا یکی از جاهایی که ایشون فتح کرد ما قبلا در داستان بنی اسرائیل خواندیم که خرس عرض کنم که یهودی‌ها را که در اسارت قوم که در بابل بودند بابلین به اصطلاح اهل بابل و پادشاهی بود پادشاه ظالمی بود اسم پادشاه هم رفت از کنم که کوروش اون‌ها بابل را تصرف کرد و تمام بابولیین را از بین برد هفتاد هزار یهودی یا صد هزار یهودی اونجا اسیر بودند و این یهودی ها دین موسی بودند در اون زمان اهل توحید بودند و بعد همین این یهودی ها را آزاد کرد یهودی گفتند که ما اونجا در ملک شام مسجدی داری مسجد الاقصا بیت المقدس محل عبادت ما هست ما را به اونجا برگردانید کوروش اینا را به اونجا برد برگرداند بعدن یهودی‌ها گفتن که مسجد الاقصی که با خاک یکسان کرده بودند لذا مسجد الاقصی را دوباره برای ما درست کنید کوروش این کار را کرد به همین خاطر امروز شما اگر در این فضاهای مجازی گاهی برید این پیج‌های یهودیها همین یهودی‌های که فارسی زبان هستند خیلی از کوروش تعریف می‌کنند و ممنون کوروش هستند و کوروش را یک محسن بزرگ خودشون میدانند که کوروش ناجی اونها شد و الا این نسل را اون پادشاه بابل کلا از بین برده بود اما کوروش اونها را نجات داد لذا آثاری که می فرماید در کتیبه ها هستند و تاریخ اون که می گوید بلاخره بهترین فرد همین کوروش هست یا خوروز هست و دلایل قوی وجود دارد که شهر سایرس که هم در اون مشرق مغرب زمین بود پایتخت مغربی ها بود پایتخت رومی ها بود همین کوروش اون رفت کرد و اون کوروش منشوری دارد منشوری کوروش امروز هم ایرانی ها به اون منشوری کوروش افتخار می کنند و می گویند که در اون مساوات هست برابری هست و اون منشور را وقتی که نگاه می کنیم گرچه در تاریخ نسبت به کروش چیزهای دیگری هم گفتن که بعضی معتقدند که این کروش نمیتونه اصلا مسلمان باشه ولی همه چیز که در تاریخ هست درست نیست لذا ایشون معتقدند والله و عالم که این زلقرنینی که بلاخره از شرق و غرب آوازش هست همین کوروش هستی که از پادشاهان ساله هست، این مسلمان بوده، تابع دستور خدا بوده و این از کنند که فارسیت را، اجتماعیت را، اونطوری که امروزه پیروانی کوروش دارند، تبلیغ میکنند، اجتماعیت را خودشان را در مقابل عرب میدونند، فارسیت را در مقابل بقیه اقوام نه، این را اصلاً تشویق نکرده. بلکه هر جا که یک قوم آزادی بوده یک قوم متدینی بوده یک قومی که دیندار بوده مثل یهودی ها به دادش رسیده به انها کمک کرده لذا کسانی که واقعا طرفدار کروش هستن و واقعا می که این مسیر را ببرند اونطوری که این بزرگان ما میگویند این سلف ما می تحقیق این هاست این فرد دیندار بوده این تابع دستور خدا بوده و این دستورات خدا را و دین را و تبلیغ دین را بپیش می مرده لذا هر کسی کوروش را دوست داره باید دیندار باشه باید تابع فرمان خدا عزوجل باشه حالا ای حال زل کرنین وقتی که اینجا رفت به طرف شمال رفت قرآن زیاد از مشرق و مغرب سخن نگفته از شمال بیشتر اونجا وقتی که شمال رفت حتی اذا بلغ بین سدين حتی وقتی که رسید به بین سدین دو تا سد بودن بین اون سدین وجدا من دونهما قوما دو تا سد خدای بودند اونجا قومی را دید که لا يكادون يفقهون قولا نزدیک نبود که از همدیگه بفهمند سخن را یعنی سخن هم دیگر را نمی فهمیدند متوجه نمی شدند خب با اونها حرف زد یا با وسیله مترجم یا با اشاره اونها چه گفتند؟ به ذلقرنین گفتند قالو یاد القرنین گفتند بنویسی پایش به وسیله مترجم یا با اشاره گفتند شکایت کردند گفت ای ذلقرنین این نیاوجود و ماجوجود، همانا یاوجود و ماجوجود مفسدون فی الأرض در زمین فساد میکنند، خیلی مارازیت میکنند، همیشه قتل، همش خون خونریزی، همیشه فساد، به ما حمله میکنند، یورش میبرند، فهل نجعل لك خرجا آیا ما برای تو یک حزینه قرار بدهیم؟ خرجا یعنی جعلم من اموالنا مزدی هزینه از مال که تو بین ما و بین انها سدی سد درس کنی نتونن دوباره بیاند الا انتجعلا بیننا و بینهم سد که تو قرار بیدی بین ما و بین انها سد نتونن این طرف بیاند این امکان پذیره ببینید که ذلقرنین کجا رفت این صد را درست کرد بعد این صد را می خانیم که برای اونها درست کرد بعضی ها که اطلاعات درستی از قرآن و از تفسیر ندارند میگه این صد که زلقرنن درست کرد همین دیوار چین است دیواری که امروز معروف است به عنوان دیوار چین آثار این دیوار هست این غلطه دیوار چین از نظر جغرافیایی در مشرقه در قسمت مطلع شمس است مشرق زمین است این دیواری که توسط زلقرنین درست شده قرآن میگه به طرف چی هست به طرف شمال هست اصلا جهتی این دو تا دیوار با هم دیگه فرق میکنه پس این دیواری که زلقرنین بسته در واقع این دیوار در کناره بحر کاسپیان یا همون خزر دریای خزر اسم اصلیش هست بحر کاسپین دریای کاسپین یا دریای خزر اونجا زلقرنین دیواری درست کرد دیواری که این دیوار به نام دیوار قفقاز در منطقه درمیان و در بند بین درمیان بین دربند و داریان دو منطقه هستن بین اینها زلقرنین این صد را درست کرد و اونجا این صد تا سالها بود امروز اثری از این صد نیست امروز صد زلقرنین خراب شده و از بین رفته اما این روایتی که می گویند جو و ماجوج از کنم که دو تا قبیله هستند پشت این دیوار هستند هر روز سوراخ میکنند سوراخ میکنه سوراخ میکنه همین که میخوان راهی درست کنه شب میشه دوباره اون سوراخ پر میشه دوباره همین کار را میکنن تا نزدیک قیامت و بعد نزدیک قیامت موفق میشن ان شاء می میگوین بالاخره از اونجا خارج میشن این غیر معتبر است این از دروغای اسرائیلیات هست این اعتباری نداره در میان مردم ما هم اینجا افتاده که یاجوج و ماجوج هر روز تلاش میکنند اصلش این یاجوج و معجوج کیا هستند درباره باره یاجوج و ماجوج هم خدمت شما عرض بکنم بعضی ها فکر میکنه اینا دوتا قوم عجوبه هستند تو کتابام هم اینطور آمده در حالی که اینا انسان هستند این از فرزندان آدم هند و از فرزندان حضرت یافظ ابن نو هستند اینها از اولاد یافظ ابن نو هستند چون تو بعضی کتاب ها نوشته اینها مخلوقات عجیبی هستند دو تا گوش دارند که گوششون از سرشون تا پایشون اینقدر بلنده حمید تور مردم تخیلاتی درست کردن هر وقت میخوا بخوابن یک گوششون را میگیرن برای خودشون رخت خوابی میکنند روش می خوابن. یک گوشی دیگه پ میشه اون را با اون خود بالاخر سردشون ن روشون مینداازند.یه چیزهایی از این قابل چیزها برایشون درست کردن در حالی که همه اینها خرافات همه اینها اصل و اساسی نداره. اون طوری که ولما نوشتند. قومی از اقوام آسیه میانه آسیه میانه همین بلاد امروزی که شوروی سابق اینها را تحت سیطره خودش داشت همین بلاد آزاد شده از اینها هستند در همین مناطق هستند و از اولاد یافس ابن نو هستند اما قومی غیر محذب غیر متمدن جنگلی وحشی که در زبان اروپائی به اینها گاگ می گفتند یا مای گاگ تحقیقاتی که شده علماء تحقیق کردند این قوم ریششون به چینیها، به مغولها، به تاتار اینها همه در واقع یا، یا، از یاجوج و ماجوج هستند امروز به نام مغول یاد میشند ها امروز به منوان تاتار یاد میشند و یک زمانی اینها در زمین خیلی وحشیگری کردند شما تاریخ خوندید مغول اگر جای میامد دیگه همه مردم از زندگی دل سرد میشدند تاتار اگر جای میامد اینقدر اینها وحشت داشتن اللهم ندوی رحمت الله میگه مردم اینقدر از اینها میترسیدن که وقتی میرفتن تو محله مردم را میدیده میگن بیا اینجا بیست ده نفر را ردیف میکرد مردم میلرزیدند میرفت از تو خونه شمشیر را میابد گردناشون را میزد اینا هم می اینجا از ترس تکان نمیخوردند یعنی چنان اینا وحشیگری و وحشت ایجاد کرده بودند پس اینها فقط و فقط فرقشون با بقیه انسان ها این بود که اینا جنگلی و وحشی و آدم کش بودند چنانچه هم شرح بخاری فتل باری نوشته هم علامہ علوسی نوشته ان یاجو جوماجو قبیلتان من ولده یافث ابن نوح اینا دو تا قبیله هستند دو قوم هستند از فرزندان یافث ابن نوح هستند خب همونطور که خیلی از اقوام شما شنیدید که وحشی هستند اینها هم وحشی بودند اون زمان این قومی که در شمال این شمالی ها را اذیت این شمالی ها الان ترک بودند یا از اقوام دیگه بودند اینها پیش حضرت زولقرنن شکایت کردند که اینها ما را خیلی آزیت میکنند همیشه به خانههای ما حمله میکنند غارت میکنند گوسفندان ما رمی برند اموال ما رمی برند شما کاری بکن بین ما و بین اینها ساده درست کن اینها نتونن راحت این طرف بیاند تا همیشه به ما حمله وار نشوند حضرت ذوالقرنین این کار را برایشون انجام داد اما یک مسئله اینجا باقی ماند که یکی از علائم قیامت و آثار قیامت ظهور مجدد یاجوج ماجوج است ظهور مجدد یاجوج ماجوج درست است این هست ولی به این نیست که این ها حیوان هستند الان اینها در دنیا کشورهایی دارند بلادی دارند قدرتی دارند گرچه بسیاری از علماء ما معتقد اون زمانی که روز تمام این کشورهای مسلمان ما را تحت سیطر قرار داده بودند گفته این ها از نسل یاجوج ماجوج معجوج هستند همه اینها در واقع یک نسل هستند روزها چینیها مغولها، تطرها اینها از یک نسل هستند لذا در نزدیکی قیامت ابتدا دجال ظهور میکنه ابتدا مهدی میاد و جهاد میکنه به عنوان یک مجدد دین بعدا دجال ظهور میکنه دجال که ظهور میکنه مسلمانان کم میشن جمع میشن در حرمین بعدن عیسی علی صلوات و سلام میاد دجال را از بین میبره بعدن یاجوج و ماجوج فتنه یاجوج و ماجوج دوباره ظهور میکنه یعنی اینها دوباره از مشرق زمین ظهور میکنند انسان ها را میکشند قتل میکنند غارت میکنند چند روزی خدا دوباره بهشون میده تا اینکه سیدنا عیسی دعا میکنه خدایا اینار را از بین ببر اینا غارت کردن انسانیت رو از بین بردند بعدن در حدیث میاد که خدای عزواجل اینها رو به وبای گرفتار میکنه یک قده بگردنشون در میاد مثل همین کرونا یک وبای تمامشون کشته میشند میمیرند از بین میرند لذا این علامت تو احادیث آمده که از علائم آخر الزمان است. ولی معنی این حدیث نیست که حتما اونا پشت دیوار هنوز منتظرن تا نزدیک قیام زور بکن. نه، الانم مثل ما زندگی میکنن، با ما ارتباط دارن، با ما داد و ستر دارن، ما کشورایشون رفت و آمد داریم، همین یاجوج و ماجوج. و, و تا آخر دوباره اینها به عنوان یک فتنه دوباره در دنیا رخنه میکنن، در دنیا ظهور میکنن. این هست خلاصه یاجوج و ماجوج، و این هست خلاصه اون صدی صد که حضرت زول قرنین درست کرد به زول قرنین گفتم میشه که بین ما و بین شما صدی قرار بده ما پول جمع میکنیم به اصطلاح ما چنده میکنیم حضرت زول قرنین گفت من نیازی به پول و چنده شما ندارم فقط شما از نظر نیروی جسمی و قوت بدنی بیاید کار کنید قال ما مکن فيه ربي آن قدرت و آن تمکینی که من داده آن مالی که من داده رب من خیر بهتر از اون چنده شماست فاعینونی بقوت شما پس مرا کمک بکنید بقوت با قوت بدنیتان اجعل بینکم و بینهم ردما من قرار میدهم بین شما و بین آنها ردما یعنی مانئی حاجزی سدی آتونی زبر الحدید برای من های آهن بیارید زلقن دو طرف کوه بود دو طرف کوه بود خودش دو طرف را کوه گرفته بود دو طرف را زلقن دو تا دیوال درست کرد دو تا دیوال بزرگ درست کرد و بعد ارتفاعشون را به اندازه کوها کرد بعد گفت که در وسط بیارید آهن آهن آوردند تکهای های بزرگ آهن آوردند حتی اذا ساوا بین صدفین حتی وقتی که برابر کرد زول کرنین بین صدفین صدف میگویند یک،, یک طرفی کورا دو طرف وقتی که باشه دو طرفی کور میشه وقتی که برابر کرد با دیوار و اون رپور کرد از آهن و از فلز قالن فخو گفت الان آتش بدمید شما میدونید که آتش را در گذشته به وسیله باد روشن میکردن امروز هم به وسیله باد هست اما با باد مایه همین گاز باد هست دیگه همین گازی که آتش را چیکار میکنه شعله ورتر میکنه بادو از کنه مواد توش هست لذا به وسیله به استلاگ گاز و باد گفت که اون فخو یعنی بدمید فوت کنید تا آتش زیاد بشه آتش وقتی که غوی بشه آهن را ذوب میکنه حتی اذا جعله نارن وقتی که آتش بزرگ افروخ، قال آتونی افرق عليه قطره، برای من مس بیارید، مس گداخته شده، فلز گداخته شده، که من بریزم بر اون قطرن یعنی فلز گداخته شده. خلاص یک دیوار آهانی بزرگی درست کرد که راه یا ماجوج بسته شد. فمصطاعو ان یظهرو نتوانستم بر اون بالا بیان. و ما استطاعوا له نقبا اون را سوراخ بکنن راهی درست کنن دیگه اونجا با این قوم دیگه کار نداشتن تا اینکه در قرنهای بعد بعدی هزاران سال گذشت خدای عزوجل اون دیوار را خراب کرد اما وقتی که ذوالقرنین اون دیوار را ساخت چی گفت قال هذا رحمت من ربي این رحمتی هست از جانب رب من که به من کرده به من این قدرت را و این توانایی را داده که چنین دیواری درست کردم. فاذا جا وعده ربی جعله و و وقتی که وعده رب من بیاد نرث تک تکه میکنه. این دیوار را چی میکنه تکه تکه میکنه و کان وعده ربی رب حقه وعده رب من چی هست است چنانچه هر وقتی که زمان آمد الان دانشمندان میگویند علماء میگویند که آثاری هنوز از همون دیوار در وادی داریان وجود دارد در همون دربند و داریان وجود دارد ولی سیلها و زلزلها و حوادث و اتفاقات ان سد زلقرنین را خراب کرده ولی آثاری وجود دارد و ترکنا بعضهم یوم اذن یموج في بعض الله تعالیٰ درباره آخرت گرچه این آیه را نو تفسیر کردم بعضی گفتن پشت دیوار پشت دیوار یاجوج و ماجوج بر هم دیگه حجوم می آوردن موج بود ولی نه بحث چی تمام شد بحث زلقرنین و دیوارش و یاجوج و ماجوج پشت دیوار تمام شد اینجا درباره آخرت الله بیان می فرماید تفسیر صحیح همینه که این موج موج اضطراب هست و آخرت است اونجا اینقدر شدت هست اینقدر اضطراب است که جنات و انسان ها بر هم دیگه مثل موج هستن از بس زیاد هستند اینجا درباره یا جوج و نیست و ترکنا تخویف اخروی است ما گذاشتیم اونها را بعضی شان را در اون روز آخرت یموج فی بعضین یموجو یعنی بر هم دیگه مثل موج سوار میشن، حجوم میآورند. و نفقه في اونجا سور دمیده میشند سور دوم دو فجمعناهم جمعا همگی را جمع, جمع میکنیم در اون میدان جمع کردنی لذا وقتی که جمع میکنیم و اردنا جهنم یوم اید لیل کافرین ما ارز می کنیم جهنم را در اون روز برای کافرین عرضه کردنی یعنی پردر را می داریم دور می کنیم همه کافران جهنم را می بینند همون کافرانی که تا اون روز چشمشون در غفلت بود چشمشون دید نداشت الذين كانت اَعْيُنُهُمْ في غطاء عن ذِكْرِي آنهایی که چشمشان در غلاف بود از یاد من یعنی نمیدیدند دیدند حق را نمیدیدند، دیدند وکانو لا يستطيعون سمع، هم نمیدیدند و هم نمی شنویدند بودن لا يستطيعون نمی توانستن گوش کنند لذا در اون روز قیامت چشم باز میشه گوشها گوشا باز میشه انسان جهنم را هم می بینه خروشش را میشنوه دیگه دیر شده هر هرچی توبه بکنه توبهش ایش فائدهی ای؟ نداره افحسیب الذین کفرو ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء ببین در پایان این سوره الله عزوجل وعید بیان می فرمید تخویف این همه آیات را خداوند بیان فرمودند آیات بسیار بزرگی در رابطه با اصحاب کهف بود موسی و خضر بود زلقرنین بود بعد از این باز هم کسی شبهش برطرف نشه و هنوز شرک بکنه الله تعالی درباره این مشرک که بعد از مشاهده آیات هنوز توبه نمیکنه در این آیات میفرماید اف حسب الذين كفروا اايا ميندارند کسانی که کفت کردند ان یتخید و عبادی اینکه بگیرن بندگان من را مثل ملائکه مثل عیسی مثل عزیر تفسیر جلاله نمیشه. اینها را بگیرند من دون بغیر از من خدا اولیاء کارساز مشکل کشا حامی خود بغیر از من بندگان من را کارساز خودشون میگیرند این هایی که این گونه عمل میکنند، الله و اید باید میفرماید: "انّ آتاد نّ جهنّم نزلا نُزُلَ". همانا ما آماده کردیم جهنّم را برای چنین کافرینی به عنوان میزبانی، به عنوان مهمانی، این به صورت و مسخره گفته شده که یعنی جہنم از جهنّم مهمانی آنهاست، از اونجا ازشون پذیرایی میشه. حال خدای تعالی این علت را هم بیان می فرماید ببین یکی از دلائل ش... که برای من و شما هم جاید سؤال است چرا این مشرکان توبه نمی چرا اهل شرک بسوی خدا بر نمیگردن؟ خدا را که قبول دارند درست خدا را قبول دارند اما اینها شرک خودشون را برای خودشون عبادتی می هیچ وقت یک مشرک و یک خرافاتی قابل هدایت نیست مگر اینکه خداوند او را از غیب تفیم بکند چرا؟ چون اون غیر خدا را سجده میکنه فکر میکنه من دارم خدا را عبادت میکنم خدا را راضی میکنم خب کسی از عبادت کردن خدا مگه توبه میکنه نه بیشتر میکنه روز بروز یک دوزد، یک زانی، یک شرابی، یک فلان فاسد اگر هر چی میکنه وجدانش او را ملامت میکنه هر شب میگه تو کار خوبی نمیکنی تو دلش میگه من توبه میکنم بالاخره او توبه نصیبش میشه اما این کسی که شرک میکنه و شرک را به خودش تقربی می قرب به خدا میدونه گوسفندی برای غیر خدا میکشه خوش شرکه بعد این را میگیم خدا از من راضی شده خب از این که خدا راضی بشه می میپنداره کسی میگه توبه میکنه این را الله عزوجل اعمال است یعنی از نظر عمل بیشتری خساره و ضرر و زیان میکنه چرا چون که کار بد میکنه فکر میکنه کار نیک میکنم کفر میکنه فکر میکنه که کار خوب میکنم لذا الله می فرماید قل هل ننبئكم بالاخرين اعمالا ای محمد بگو آیا بشما شما خبر بدهم بالاخرين اعمالا بزيان کارترین انسان از نظر عمل از همه بیشتر عمل بد دارد الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ان هايك تلاششان برباد شد ضایع شد در زندگی دنیا چرا؟ چونکه و هم یحسبون انهم یحسنون سنعا انها می پندارند که آنها کار خوب میکنن یحسنون کار خوب میکنن سنعا از نظر کار کردن و عمل کردن چون فکر میکنن همین خرافات و شرکشون حق است وهم هم یحسبون انهم یحسنون سنعا اذا اینها چی میشه جزای انها, انها اولائک الذين كفروا بایات ربهم اینها کسانی هستند که کفر کردن نسبت به آیات رب آیات رب را نگاه نمی کنه همون خواهشات نفس و رسومات ابای و اجدادی را نگاه می کنه کسانی هستند که کفر کردن نسبت به آیات رب ولقائه کفت کردن نسبت به ملاقات رب یعنی قیامت را هم قبول نداره فحبطت اعمالهم اعمال اینها زائم شده اعمال اینها برباد شده فلا نقيم لهم يوم القیامت وزنا در روز قیامت برای اینها ما وزن قائم نمی کنیم ترازو نمیذاریم زاریم ترازو اعمال چون ما قبلا خاندیم وقتی که مشرک شرک می کند اعمال تمام زائم میشه. اعمالش به درد شینه نمیخوره ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا الله میفرما این افراد جزایشان جهنم است چرا به سبب کفر همین شرک کفره و دیگه یکی دیگر از کفرشان آیات من را و پیامبران من را به بعد مسخره گرفتند و واتخذوا آیاتی و رسولی هوژوا آیاتی من را گرفتند و پیامبرانی من را ببادی مسخره لذا اینها جزایشون جهنم است و در پایان الله عزوجل در مقابل اونها مؤمنین را کسانی که اعتقادشون عملشون مطابق رضاي خداست بهشت اونها را تعریف میکنند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدون شک انهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن کانت لهم جنات الفردوس نزلا برای انها جنات فردوس مهمانی هست جنات فردوس بالاترین طبغه بهشت است بهترین جایگاه در بهشت جنات فردوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود هر وقتی که از خدا بهشت خواستید جنات فردوس بخواهید این همو عالی ترین اش هست این همین به استله باکیلاست هست اللہ الله فرماید کان طلاهم جنات الفردوس نزولا مهمانی او انها جنات فردوس هست بر چه مدتی خالدین فیها همیشه در آن میمانند لا يبغون عنها حولا نمیخواد از اون جا جابجایی را حول یعنی تغییر ببین بلا تشبیه گای شما مسافرت میرید میرید یک جایی که بهشت همین دنیاست مثلا میری شمال بهترین شهرش میری اونجا بهترین بلاخره آبادانی هست جنگل هست دریا هست ویلا هست همه چیز هست ولی ده روزی که میمانی بچه ها میگم بریم یه جای دیگه اینجا عیبی داره نه عیبی نداره ولی میخوام یک تنوعی باشه این طبیعت انسانه نه هر جایی میره شاید جای دوم مثل اولی نباشه ولی خب بعضم برای بچه خوشایند خوش است اما اونجا نه اونجا از بس خوش میگذرد الله میفرماید لا یبغون عنها حیولا ولا نمیخاند از اونجا تغییر بیابند جا به جا جای دیگه بر نمیگه از اینجا از جا بهتره اصلا از اونجا تکان نمیخورد لذا الله تعالی به مؤمنین شما مؤمنین ان چنین جنات فردوسی را که برای همیشه به این ایت میفرماید قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی در آخرین آیات الله عزوجل از و تعریف خودش میگوید خدای عزوجل زیبنده تعریف است اما این تعریفات را ما بلد نیستیم چون ما واقعا اقل ما بسیار قاصر محدود ما اونچی که باید بشناسیم باید برسیم، امی رسیم از به معرفت پروردگار. مگر به اندازه که برای ما در قرآن تعریف کرده، یکی از بهترین تعریفات خدا که لایق پروردگار است. باز هم این منتهایش را انسان متوجه نمیشه. همینه. الله میفهمه کل لوکان البحر مداد لکلمات ربی بگو اگر همه این در چی باشد. مداد باشد مداد یعنی مرکب جوهر جوهر باشد برای کلمات رب یعنی صفات رب کلمات را شیخ مامی فرمد کمالات رب صفات پروردگار همه این دریا جوهر باشد و همه این درخت ها باشد در آیه دیگه فرموده و نه تنها این دریاها که الان مثلا چهار پنجم زمین یا سه چهارم زمین تمام دریا است یک چهارم خشکیه یا یک پنجم خشکیه چقدر دریا زیاد هست ما ما هنوز دریا را ندیدیم ولی خشکی هر چی رفت تیم تمام نشده خب چند برابرش پنج برابرش دریا است در آیه دیگه الله فرم الله عزوجل می حفت هفت برابری این دریاها دیگه دریا باشه ولو انما فی الارض من شجره اقلام هر چی که در زمین درخت است همه اینها قلم بشه والبحر یمده والدریات تبدیل بشه به مداد بشه به دواط بشه و دریا من بعده سبعه ابحر بعد از هفت تا دریا دیگه یعنی هفت برابر همه اینها را شما بعد در درخت‌ها نیکن در درخت‌ها قلم درست کن و دریاها را دوات بنویس و بنویس و بنویس تا میلیاردها سال صفات پروردگار را علوم پروردگار را کمالات رب را همه اینها تمام میشه ما نفت کلمات الله اون صفات پروردگار تمام نمیشنی. ولی دریا خشک میشه قلمها تمام میشه لذا الله میفرماید قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی بگو اگر دریا باشد مداد دوات برای کلمات رب من و صفات رب من لنفذ البحر تمام میشه دریا خشک میشه دریا قبل ان تنفذ كلمات ربی قبل خب از این که بپایان برست کلمات و صفات ربم ولو جئنا بمثل هی مددا گرچه ما بیاوریم مثل این دوات دیگه دوات بیاریم دو برابر سه برابر عفت برابر لذا صفات پروردگار کمالات رب خیلی بلند و بالا هیچ کسی به خدا نمی رسد از مخلوقات کجا خدا و کجا مخلوق انسان بیچاره چقدر غافل که گایی یکی از مخلوقات که محبتش در دلش میوفته محبت دوستان خدا جزی ایمانه محبت انبیاء جزی ایمانه ولی نه محبت اندازی که فرق بنده خدا و خود خدا را ندونی بنده خدا را هم برابر خدا قرار بدی بی بیایی بگی که هم خدا علم غیب داره هم به این بخشی از علم غیب داده هم خدا اولاد میده، هم به این اختیاراتی داده، هم خدا شفا میده، هم به این این قدرت شفا را داده علیه الله. بندگان خدا را شما خدا را نشناختید که بندگان خدا را مثل خدا می دونید، هم صفت خدا می دونید. لذا الله می فرماید، اینجا ببین درباره رسول الله است از رسول الله کی می تونه بالاتر و أفضل تر باشه؟ سید اولاد آدم، امام انبیا. و خلاصه تمام موجودات این پیانبر را اللہ عز و جل می فرمات تو اعلام کن قل انما انا بشرم مثل کم اے محمد بگو جزی نیست که من بشری هستم مثل شما اما فرق من نبوته یو حائلی بمن وحی میشه اما اون وحی و خلاصه وحی چیه ببینی خلاصه کل قرآن خلاصه وحی الهی انما الهکم اله واحد انکه معبود شما معبود یگانه هست بعضی همیشه به ما میگن هیچ چیز شما بلد نیستی بغیر از این توحید توحید مسائل دیگه هم هست اخی جامع مشکل داره ولی درست مشکل اصلی اینه خلاصه کل قرآن خود قرآن میگه خلاصه وحی رسول الله خلاصه پیام هایی که خدا به وسیل رسول الله فرستاد تا سیزده سال در زندگی مکی هیچ عبادتی را خدا نگفت انجام بدید بری زکات بدید بری روزه بگیری بری حج کنید نه جهاد کنید حجاب کنید هیچ یک را فقط خدا را یگانه بدانید خیلی مهمه فقط و فقط در زندگی مکی نماز فرض شد که نماز هم مظهر عبدیت بود و ومزهر توحیده یعنی تو نشون میدی که من بندی اوستم پس خلاصه تمام قرآن و خلاصه تعلیمات تمام انبیاء الهی همینه انما الهکم الهن واحد این ازمون کمالات است گفتیم که اگر همه بیان بنویسن کلمات رب را کمالات رب را یکی از اونها اینه الهکم الهن واحد فمن كان يرجو لقاء ربه الله می فرماید هر کسی که اعتقادی دارد و امیدی دارد به ملاقات رب فردا قیامت می خواد خدا را ببیند و در محضر رب حاضر بشه اون دو کار بکنه یکی ایمان شرک نکند با خدا ایمانه ایمان به توحید یعنی شرک نکند دوم دو بعد از ایمان عمل صالح زفل یعمل عملا صالحا عمل کند عمل صالح ولا لا يشرک به ربه احدا و شریک نگیرد با عبادت رب احدیره یعنی با خدا در عبادت کسی را شریک نسازد تعریف عبادت رب ببینید ما تو سور فاتح هم میخانیم ایاک نعبدو خدا فقط تو را ما عبادت میکنیم عبادت چه عبادت زبانی باشه نام خدا را ذکر می کنی ورد میکنی، الله اللہ سبحان الحمد الحمدللہ الله اکبر دیگر نام غیر اللہ را ورد زبان نکن عبادت چه عبادت بدنی باشه برای خدا رکوع، برای خدا سجده برای خدا تواف تمام عبادت ها و در رأس انها دعا، الدعا و هوالعباده، الدعا و مخلعباده برای غیر خدا نکن، غیر خدا را صدا نزن به عنوان دعا از او کمک نخوا که این میشه عبادت او و سوم عبادت مالی، برای خدا نظر و نیاز، برای خدا خیرات کردن ارز کنم که نان پختن و تقسیم کردن برای رضا خدا آش دادم برای رضای خدا شربت دادم برای رضای خدا برای رضای خدا بله ولی نه برای رضای غیر خدا اگر برای رضای خدا به برای خشنودی فلان شخص این میشه عبادت اون شخص لذا انسان نمیدونه معنی عبادت را میگه من عبادت نمی غیر خدا را ولی ناخواسته عبادت میکنه. باید از این مسائل آگاه باشیم متوجه باشیم تا ایمان ما ایمانی که خالص باشد از آمیزش شرک پاک باشد الله تعالی همه من و شما را مؤمن واقیب گرداند